و دیگر آزادندیشان به حق و قابل تکریم گردد به امید آزادی و رهایی همه جانداران. متن کتاب. در میان بیابانی برهود که همه جایش را شن و ماسه پوشانده بود جماعت بیشماری به گرد هم جمع شده بودند در میانشان آتشی روشن بود و زبانهای آتش به آسمان می رفت. این جماعت بیشهار گردآگرد یکدیگر در کنار آتش بر خاک نشسته سربرشن های کویر میکوفتند و مدام خود را بر زمین میکشاندند. آتش شلوور میشد و به هر با ارتکان خوردن آدمیان بر زمین و سجود بر خاک زبانه میکشید. کمی دورتر از آنان در میان کپری که زیلوی صحنش را پوشانده بود زنی دست و پا میزد. مدام خود را تکان میداد. درد داشت. برنج رنج دست برزیلومی زیلو کشید و خود را تکان میداد. کسی در اطرافش نبود و او باید که به تنهایی از پس این روزگار سخت بر می آمد. به فاصله کوتاهی از چادرش جمع آدمیان هنوز خیش را بر زمین می کشندند و سر بر خاک می سایدند و این روز والا را گرامی می داشتند امروز سال روز بزرگ داشت از سرزمین مادریشان بود و آنان وظیفه داشتند تا در این روز خجسته احترام خود را به خاک و سرزمین نشان دهند و در پی این مراسم از یکدیگر پیشی بگیرند. هر کس باید جان بر خود را به خاک اجدادی نشان میداد. باید به اثبات میرساند که تا چه اندازه از بودن در این سرزمین و زاده شدن بر آن برخیشتن مفتخر است. تا چه اندازه خیشتن را مدیون این خاک اساطیری میداند و تا چه اندازه شکوه و بزرگی آن را می ستاید. یکی برخاست و در برابر دیگران شروع به خواندن کرد ندای وینا معلوم و گنگ آسمان را پر کرد ناله میکشید و خاک اجدادی را می ستود این تصنیف خونیاگران پیری بود که در دهور دستها به زبانی کهن برای بزرگداشت خاک مادری آن را می خواندند و او این ارزش والا را از پیشینیان به ارث برده بود و حال می توانست تنها کسی در جمع آنان باشد که با این مهارت با زبان پیشینیان خاک اساتیری را ستایش کرده است. بعد از خواندن های و ناآشنای او همه چند بار سر را بر زمین کوفتند و به فاصله کوتاهی مشتی از خاک بر دست گرفته و رو به آسمان بلند کردند و در آسمان رها کردند. خاک آرام آرام از دستانشان به زمین ریخت و به جای خیش بازگشت یکی از جمعشان فریاد زد این خاک اجدادی ما تا جهان باشد از آن ما خواهد بود همه به پشتبانی از او و در حمایتش فریاد زدند زنده باد میهن و سلامت باد هم میهن یکی دیگر از جمعشان برخاست و با صدای بلند رو به جماعت شروع به خواندن اشعاری از گذشتگان کرد جنجینه ای از شهرهای شعران دیرین که در مت و سناه سرزمین مادری سروده بودند ای سرزمین مادری جانم همه از آن توست ای یادگار مادری دنیا همه از آن توست ای خاک ای خاکم همه دنیای من از آن توست ای معبد و مبنای ما جان همه از آن توست شعرها را یک به یک میخاند و بینام بردن از نام شعرا از کنارشان میگذشت و جماعت دیوان وار تر از پیش مستان سر بر زمین میکوفت و خاک را عبادت میکرد. او به خواندن شعرها ادامه داد تا یکی از میان جماعت در حالی که سر به خاک داشت از حال رفت و بر زمین دراز شد. چندی از خاک ماندنش نگذشت که برخاست و از ادامه شعر او اینگونه رو به جماعت فریاد زد، همه دنیا همین خاک پاک ماست و باید تا جان داریم برایش بجنگیم و به راهش بمانیم جماعت پرشور سر از خاک برداشتند و فریاد زدند جاویدان سرزمین مادری او ادامه داد به خواب دیدم الهام بر من روان شد و خاکدار جهان من گفت باید راهم جان دهید و به مانایی این سرزمین از همه دنیا گذر کنی. تیر روزیتان از میان رفتن این خاک پاک خواهد بود جماعت همه به دهان او چشم دوخته بودند و حاج و را نظاره می کردند که این گونه فرمود دشمنان در کمینند می خواهند این خاک پاک را هزار پاره کنند از این رجیمان دوری کنید که دنیایتان را به آتش خواهند کشید جماعت فریاد زد مرگ بر اجنبی، مرگ بر دشمنان، مرگ بر خارجیان خونخار مراسم بزرگ داشت از خاک مادری در سراسر سرزمین جریان داشت مردم در جنگلها، در کوها، در آبادیها و شهرها، در روستاها و برابر دریاها به جای جای سرزمین و خاک اساطیری برون آمده و بر خاک نشسته بودند تا این ارزش والای هزاران ساله را عبادت کنند آمده بودند تا با این خاک کوهن هم پیمان شوند و با خون و جانشان حفاظتش کنند. آمده بودند تا جان در بدن دارند، در رهش خون دهند و خون بریزند تا بدکاران را از خاکشان برون کنند، تا حافظ و حامی این خاک کوهن بمانند و آمده بودند تا به راه خاک جان دهند. سرها سرزمین همین مراسم به گونه‌های خاص برگزار می‌شود. جایی به رقص می آمدند و سرودهای ملی پخش می کردند جایی به شعر خانی می پرداختند و جایی از تاریخ کوهن می خاندند. از حماسه ها، از جنگ ها، از شکوه دیر بازان، از مستعمرات، از حمله ها، از کشور گشایی، از پیش رفت از دلاوری پیشینیان که در راه خاک به خون کشیده شدند همه جا پر بود از ندای سرزمین مادری همه جا پر بود از فریات های هموطنان به راه وطن دیرین. همه جا پر شد از صدای فریاد ها که به آسمان می رسید. اما آن بیابان در این سرزمین مراسمش رنگ و بوی دیگری داشت. آری به زیبایی و شکوه دیگر مناطق سرزمین نبود. به عظمت شهرهایی که میدانهایش میلیون آدم به خود داشت نبود. به هنرمندی دیگر نقاط سرزمین نشد که شعرا شعر بگویند، علما نصر بخوانند و عرفا به بافند اما این کویر و این برهود که بخشی از سرزمین مادری و کوهن دیرینیان بود به مجلس بزرگ داشتش هزاری را به خاک نشانده بود هر که از هر سن و هر قشتی بود به میان آمده و به کنار آتش نشسته بود همه آمده بودند و هیچ تن از کویرینیان کم نبود تنها زنی به کپر درد می کشید و به خود و به تنهایی رنج می خاند. همه بودند و کسی از نبود او باخبر نشد. او کسی را نداشت تا بفهمد، نه همسری به کنارش بود و نه همسایهی به نزدیکیش. او تنها و بی به دور از دیگران زنده به همین سرزمین مادری بود. اما حال این جماعت بیشمار که برای بزرگ داشت آمده بودند به نزدیکی کپر او منزل کردند. هیچ کدام ندانستند. او در آن کپر تنهاست و درد میکشد. هیچ کس ندانه سو در چه حال و به چه طریقتی است همسرش به راه همین خاک و برای پاس داشتان چند ماه پیش از جان گذشت و ترک دیار کرد ترک دیار کرد تا دیارشان به جای بماند تا هیچ از بزرگیش کاسته نشود او به میدان رزم رفت تا ای از خاک آنان به دست اجنوان نماند و در میان همان کارزار به سرب و گلوله سینه شکافته شد به خاک نشست و در خون از جان گذشت تا خاک بر جای بماند چگونه مرا از یاد بردند چگونه به یاد من نیستند چگونه نمیخواهند تا یادگار او را کمک کنند چرا به فریاد من نمی رسید چرا مرا از یاد برده اید او همسر من بود که جانش را برای همین خاک فدا کرد و حال که فرزندش در حال آمدن است چرا او را در نمیابید چرا او از خودگذشتگیش را از یاد برده اید آری، بسیاری از سرزمین به خاک و خون کشیده شدند بسیاری جان دادند معلول شدند کشته شدند و حال همه را از یاد برده اید و همین خاک کویر چند تن به خاک و خون کشیده شدند چند تن از جماعت ما از میان رفت و حال به یاد کدامینشان هستید آنانی که رخت بستند و ترک دیار گفتند آنان که در درد و رنج به فقر زندگی گذراندند آنان که بی پدر شدند بی همسر و بی اولاد شدند آنان را هم از یاد برده اید فرسند مرا هم از یاد برده اید در حالی که مدام فریاد میکشید خود را آرام آرام به سمت درب کپر می رسند. بر زمین تا شاید بتواند یکی را متوجه خود و درد عظیمش کند. صدای فریاد وطن پرستان به دور از آنقدر زیاد بود که هیچ صدایی از زن آبستن نشنوند و به براسم خود ادامه دهند. آنقدر فریاد زدند، آنقدر شعار سردادند تا هیچ صدایی به بیرون درز نکند. تا هیچ صدایی شنیده نشود و تنها صدایی آسمان را بدرد که میهن یک داست. زند و دستش را بر زمین می مدام به زمین مشت می زد خاک بر زمین مانده تکان می خورد و هیچ در بر نداشت تا از خود بروز دهد نمی توانست پاسخی به او بگوید نمی توانست عکس از خود نشان دهد و تنها خاموش ضربات او را به صورتش می کشید زنگ کلافه بود درد می کشید و حال می خواست انتقام درد تنهایی بیشوهر شدن، مرگ و به دنیا آمدن فرزند هرچه چه که بود را از همان خاش باز پس گیرت. خاکی که هیچ برای گفتن نداشت، هیچ برای کردن نداشت و تنها مسکوت سر به زمین کوفته ضربات را به وجودش می‌خرید و دم بر نمی‌آورد. زن آرام نمی‌گرفت، مدام ضربه می‌زد. از پس هر کدام از مشتهایش مشت بعدی را میکوفت تا شاید ذره‌ای آرام شود. اما چیزی توان مهار رنج او را نداشت که در میان همین تقلا از حال رفت و چشمانش را بست. دورتر از کپر جایی که جماعت به دور آتش جمع بودند تکاپو جریان داشت. نمایشی برپا بود. جماعتی نقش اجنبان را بازی می کردند و جماعتی هموطنان بودند. آنان به جنگ آمده در برابر یک دیگر سفارایی می کردند. هموطنان خوشبوش با لباسهایی برازنده و زیبا به دست شمشیر پولادین و سپر به سر کلا خود های به تنجامه رزم و برابر دشمنان و اجانبی بدتینت و بدسیرت و بدصورت و بدزاد بعد شمایل با لباس پاره با کلاه شاخدار، های گاه دومی از آنان آویزان بود با شمشیرهایی هایی کج و نامتوازن به سوی هم یورش بردند و در چش هم زدنی هموطنان آنان را به خاک نشاندند به خون بردند، در خون قرقشان کردند و جماعت فریاد شادی سرداد سود کشید، هور را گفت، فریاد زد و به خیشتنش بالید اما ماجرا به اینجا ختم نشد با دشمنان به یورش بعدی هموطنان گریختند پا به فرار گذاشتند و از میدان رزم دور شدند و فریاد هموطنان جهان را پر کرد همه مستانه برخواستند، فریاد زدن و برخیشتن بالیدند، با صدای بلند گفتند جاویدان وطن، زنده باد، هموطن، نابود باد، دشمن در کفن. زن به حال آمد، سر از زمین بلند کرد، دوباره کابوس کشته شدن همسرش را دیده بود تنها دیدن آن صحنه در این حال بود که می توانست او را در این وضعیت و با این درد از جای برخیزاند نفس نفس می زد عزیز دلم چرا تنهایم گذاشتی؟ مرا در این حال و روز چرا تنها گذاشتی؟ من بدون تو چه کنم؟ بدون تو چگونه این فرزند را بزرگ کنم؟ اصلا تو به من بگو چگونه او را در این تنهایی و برهوت به دنیا بیاورم؟ بعد از گفتن همین جمله بود که دوباره به زمین افتاد و دراز کشید. فریاد زد: فریادهای بلند و گوش خراش طوری فریاد میزد که اگر شور و هیاهوی مراسم نبود حتما تا چند آبادیان آن در صدایش را می شنیدند. اما حال کسی صدای فریادهای او را نمیشنید و او مدام به فریادهایش ادامه میداد. با دستانش زمین را چنگ می کشید. خودش را از روی زیلو به آن سوتر رسانده بود و حال بر خاک نشسته بود برخاکیش او را برخیش نگاه داشت تا باز هم فریاد بزند تا هر چه می تواند فریاد برآورد و هیچ نشنوند هیچ نیایند و او باز چنگ بزند این بار صورت خاک را زخم گون کند بخراشد و باز خاک بر نیاورد هیچ نگوید تا زن در میان فریاد بار دیگر از حال برود در برابر جماعت برخاک گروهی بزرگ گرد آمدند و شروع به خاندن کردند سرزمین ما، دیار دور راهان پر امید، دیار جنگ جویان دل سپید، سرزمین ما چنین جهان باشد از آن ما، برای ما، تا جان برای ما صدای آواز خانان با صدای جماعت که تکرار می در هم میپیچید و هر صدای دیگری را در خود می نشاند تمام صحرا از این سرود پر شده بود و همگان با حرارت و قدرت از سرزمینشان می خاندند. با هیاهو فریاد می زدند و برای ادامه دادنش سر از پا نمی شناختند برایشان دلچسب بود که چند بار آن را تکرار کردند هر بار از نو و دوباره حتی بعد از پایان یافتن آن توسط گروه خوانندگان ادامه پیدا کرد و جماعت آن را خواند تا هیچ صدای دیگری جز فریاد برای خاک مادری به گوش نرسد. صدایی به گوش نرسید و زن دوباره فریاد زد. آنقدر فریاد زد و تکرار کرد، آنقدر دست بر زمین کشید و ناخون شکست، آنقدر زجه و مویه کرد، آنقدر بر زمین کوفت، آنقدر پاتکان داد، تا سرآخرش صدای فریادهایش به صدای فریادهای کودکی در همامیرد. رحیم به دنیا آمد در میان فریادها، فریادهای جانکاه مادرش، فریادهای هموطنانی که برای بقای سرزمینشان فریاد میزدند، او به فریاد زاده شد بر خاک سرفروود آورد و به خاک نشست خونش را به خاک تلاقی کرد و به خاک پیوند زد او در خاک سرزمین کوهن مادری چشم بر جهان گشود و اولین لمسش به جهان خاک پاک گذشتگان بود رهیم دنیا آمد و به خاک نشست و به آمدنش دنیای طوفانی شد. آسمان قرید و باد همه جا را فرا گرفت. تمام صحرا را به خود بلید و با خود تکان داد. باد راه رفت و به پیش آمد. هرچه در برابر بود را با خود از زمین برخیزاند. باد آمده بود تا خاک را با خیش به آسمان ببرد. آمده بود تا قیامت بپا کند. جماعت بیشمار در برابر آتش در مراسم بزرگ داشت باد را از دور دست دیدند که به پیش می آمد. همه بود زده بر جای ماندند و هر حرکت پیشترها را از یاد بردند تنها به باد در کمین نگاه کردند و بر آن چشم دوختند باد میامد به بین آتش را خاموش کرد و به همراه خاک بیکرانی که دربر گرفته بود نزدیک و نزدیک تر شد جماعت به دیدن طوفان و گردباد در برابر خاک نشستند و سر بر زمین سایدند. برخی هنوز ایستاده و آمدن گردباد را نظاره می کردند. آنقدر نگاه کردند که باد و خاک نزدیک شد و در برابر دیدگانشان خاک را به آسمان برد. به چندی فاصله از آنان خاک به همراهی باد به آسمان رفت. هموطنان فریاد زدند. خاک قدسی ما به آسمان میرود این معجزه سرزمین ماست تمام جماعت بر خاک افتاده سر بلند کردند و حرکت خاک بر آسمان را دیدند دیدند که چگونه خاک به آسمان میرود اما نه هر خاکی که خاک اجدادی و باستانی آنان این خاک پاک و قدسی جایگاهش افلاک است و حال در این روز قدسی به آسمان میرود تا فرمان روایی کند یکی از هموطنان فریاد زنان گفت خاک قدسی ما فرمانروای همه جهانیان است و حال برای فرمانروایی به آسمان می رود این است خاک اجدادی ما به پشتبانی او دوباره همه فریاد زدند و شعار دادند در همین میان یکی از هموطنان که از ترس گردباد دور شده بود کپر رحیم را دید و وارد شد فریاد کنان به سوی هموطنان آمد و گفت اینجا زنی مرده است بشتابید او به کمک نیاز دارد رحیم خونین بر زمین بود مادرش به خون غرق شده از رنج بیهوش بود و با بدنی دریده شده از درد بی حال دیگر نای فریاد نداشت که هموطنان به فریاد آمدند تا او و رحیم را دریابند رحیم زنده بماند و پایان مراسم میهن به تولد او مفتخر شود. روزی که باد و خاک و رهیم به آسمان رفتند و باز به زمین باز گشتند. کتاب کاخ، اثر نیما شهزواری، بخش دوم رحیم جان کدام را انتخاب می کنی؟ از آن سرمه بیشتر خوشم آمده است در میان همین انتخاب لباس بود که ناگاه صاحب فروشگاه به نوت خامد و رو به رحیم گفت بهتر نیست آن یکی را انتخاب کنی، آن ساخت هموطنان خودمان است کارگران کشور خودمان برای تولیدش زحمت کشیدند و منفعتش به جیب هموطانان خودمان میرود نه اجنبیان و دشمنان رحیم نگاهی به مادرش کرد و رو به او گفت چرا اجناس اجربان را در این فروشگاه میفروشند مرد صاب مغازه بدون آنکه توجهی به مخاطب پرسشش داشته باشد به سرعت به میان حرف رحیم آمد و گفت به خاطر این که خیلی از هموطنان دنبال اجناس خارجی هستند و من هم مجبورم برای ممری درآمد از اجناس وطنی و اجنبی استفاده کنم تا خودشان انتخاب کنند. اما پسرم تو با همین سن و سال کم میفهمی که باید برای تولیدات وطن خودمان هزینه کنیم و سود و منفعت را به جیب مردم وطن خود بریزیم نه اجنبیانی که در کمین نابودی و بدبختی ما نشستند، مادر رحیم بدون آنکه توجهی به صحبتهای فروشنده داشته باشد رو به رحیم گفت عزیزم همون سرمه ای را پسندیده ای؟ رحیم که به فکر فرو رفته بود گفت مگر اجنبیان نیاز به درآمد ندارند مگر آنها برای ادامه زندگی خود و خانواده نباید کار کنند و اجناسشان را بفروشند. مرد فروشنده با حسابی خراب و نگاهی غذابالود رو به مادر رحیم کرد و گفت چنین تربیتی که حتی ذره ای برایش مغفرت هموطنان شرط است چنین فرزندی هم به بار خواهد آمد. او کماکان داشت قُرول کنان ادامه میداد که مادر رحیم با صدایی بلندتر و از سر تحکم به رحیم گفت: مادر جان کدام را انتخاب کرده ای؟ باید برویم بیشتر از اینها زمان نداریم. رحیم که کلافه بود و در پی پاسخ به پرسش هایش میگشت، رو به مردم صاحب مغازه گفت: یعنی yani نباید جنس اجنمان را بخریم؟ چه به روز آنها خواهد آمد؟ مرد عصبی و کلافه بود و خود را آماده میکرد تا چندی دیگر پاسخی دندانگیر به مادر و پسر دهد که مادر رحیم دست رحیم را گرفت و به سرعت از مغازه خارج شد مرد با عصابی خراب قرلند کنان اما طوری که صدایش به بیرون مغازه هم می رسید گفت؟ همین خاهنان و ما را این گونه به بدبختی بردهاند معلوم نیست به فردا از این بچه چه خیانتکاری خواهد ساخت و چه بلایی؟ صدایش با دور شدن آنان کم و کمتر می و بعد از چندی دیگر هیچ از حرفهایشان به گوششان نرسید و مادر و فرزند از مغازه او دور شدند. در مسیر مادر از رحیم قول گرفت که در مغازه های دیگر صحبت و سؤالی نکند تا لباس مورد نظر برای مدرسه را تهیه کنند. رحیم هم با میمیلی سری تکان داد و عهد بست اما به طول مسیر مدام به حرفهای صاحب مغازه فکر می کرد. به اجنبیان به کارخانه هایشان، به کارگران در سراسر دنیا، به حقوق، به درامت به خرج زندگی، به هر چیز که خودش در کنار مادر در طول تمام این سالها با آن دست و پنجه نرم کرد. به همه روزگاری که خودش هم به مانند همه مردمان شهر زیاد و کم با آن درگیر بود و حال با ندای صاحب مغازه بیشتر به آن فکر می کرد. از آن سالیان و زندگی در کپر چند صبحی بود که دور شده بودند بعد از به دنیا آمدن رحیم مادرش رفت تا حق شوهر از میان رفته اش را از وطن بگیرد و اینگونه به او کمکهایی شد کمیته ها شوراها دولتیان همه و همه کمک کردند تا او راحت تر یادگار مرد کشته شده برای وطن را زیر بال و پر بگیرد از همین رو بود که شرایطی برایش فراهم شد تا به یکی از کلان شهرهای وطن نقل مکان کند آری چند سالی از به دنیا آمدن رحیم نگذشته بود که ترک کویر کردند و به شهر منتقل شدند مستمری برای خون همسرش دریافت می کرد که کفاف زندگی را نمیداد. از این رو بران شد تا دست به کار شود و شرایط بهتری را برای ایگان فرزندش به بار بیاورد کار که آر نبود و هرچه در برابرش بود را با جان و دل انجام میداد تا درآمد بیشتری به خانه هم وار سازد کار در کارخانه ها. کار در خانه ایان و اشراف تمیز کردن، بستبندی، اتو کشیدن، رخت شستن هر کاری که از او بر می آمد هر کاری را انجام داد تا فرزندش روز به روز از آب و گل بیشتر برون آید و به زندگی تازه درود فرستد و حال چند سالی بود که دیگر این شهر وطنشان بود به بوی دود و ماشین ها عادت داشتند صدای آژیرها، صدای بوغ ممتد ماشین ها صدای آبران در هر گوشه و کنار دعواهای گاه و بیگاه باری برای سفنان باری به راه اتومبیل و سبقت از حق دیگران این صدای شهر جزی از زندگیشان شده بود رحیم در همین شهر به مدرسه می رفت. درس می و می خواست به آینده کار بزرگی انجام دهد می خواست تا مادرش را سربلند کند شاید هم نمی خواست، اما مادرش مدام به گوشش می که تو مایه افتخار من خواهی شد. برایش لالههایی از درس خواندنش میگفت از فردایی که همه چیز از آن او خواهد بود از پست و مقامهایی که برای او به کنار نهاده‌اند تا به فردا آنها را تصاحب کند از وزارتش از وکالتش از ریاستش از همه چیز آینده دنیا برایش تا می میگفت او را تا عرش آسمان به هوا می فرستاد تا باز به فرواز درآید و در دور زمانی به زمین بازگردد رحیم همه را میشنید، آنقدر شنیده بود که همه را باور کرده باشد شاید به دلش هر روز افتخار ای کسب می کرد شاید به افکارش خود را در مقام های والا میدید و مادری که از دور دست برایش دست تکان و به همگان می او فرزند من است همه را میدید دید که برایش رقم خورده بود و باید آن را کسب می کرد از این رو بود که به درستی درس را می خاند. برای یادگیری زمان صرف میکرد و برای آموختن از همه چیز میگذشت. مادر به گوشش خوانده بود که تمام موفقیت از راه همین خاندنها که از خواهد شد و او اوش آرزوهای مادر را به چشم دیده بود میخواست تا از هر روی که شده آرزوهای او را برآورده کند. پس درس میخاند، از هیچ فروگذار نبود و اینگونه شاگرد ممتاز مدرسه لقب میگرفت. و حال آمده بودن تا لباس لازم برای شروع سال تحصیلی جدید را فراهم آورند رحیم به قولی که داده بود عمل کرد و در مغازه بعدی بی حرف و گفتار اضافه بی پرسش و پاسخ به سرعت یکی از لباسها را انتخاب کرد همان رنگ سورمهی که به آن در مغازه قبلی علا شده بود صاحب این مغازه هم دل و دماغ بسیاری برای مجادله و حرف زدن با آنان نداشت و هیچ کدام ندانستند این لباس از تولیدات وطن و هموطنان است و یا به دور دستری از این وطن اجدادی ساخته و منفعتش برای اجنبان است تنها دیدند که زیباست و مورد علاقه رحیم واقع شده است و رحیمی که از داشتن آن برای چند ساعتی شادمان شد شاید از چند ساعت هم گذشت و آن را برای شب زیر بالشتش گذاشت تا نزدیک او بخوابد. شاید از یک شب هم فراتر رفت و چند روزی به داشتن آن شادمان شد و تا آخرش نفهمید که ساخته یک کیست؟ اما میدانهست که آدمیزادی آن را ساخته و بیشک در ازای ساختن آن لغمنانی به خانه برده است همان نانی که مادر در طول این سالها به سختی برای او فراهم کرده بود و شاید بیشتر از این شادمان از آن بود که او هم در رساندن این نان به دیگران نخ شیفا کرده و به پوشیدن این لباس کسی در جهان لغمنان بیم را به خانه برده است. بعد از خریدن لباس از بازار که دور میشدند خیابانها شلوغ و شلوغتر میشد خیابان خیابانها را هموطنان پر میکردند شادمان به این سو و آن سو های پرچمهای کشور را به دست میگرفتند و سرودهای ملی میخواندند برخی بر سر و صورت پرچم کشورشان را نگاشته بودند و سرمست در خیابانها به رقص و پای می میپرداختند رحیم از مادر پرسید چه شده است اینها ها چرا اینگونه به خیابان آمده اند؟ مادرش گفت فکر می کنم دوباره در ورزشی پیروز شده این که اینگونه مردم به وجد آمده هند. رحیم گفت در چه ورزشی؟ مادرش سر را به نشانه ندانستن به این سوهان سو داد و رحیم کنج کافتر از پیش شد. به مردمان در خیابانها چشم دوخته بود. همه شادمان و مستانه فریاد می کشیدند. برخی عشق می ریختند. گوزه بر پرچم ها می زدند و از شیشه اتومبیل ها بیرون آمده پرچم ها را به اهتزاز در می آوردند. به یکباره شهر رنگ پرچم وطن را گرفت. همه جا عطر وطن و هموطنان پر کرد. همه فریادها و شعارهای ملی سر می دادند. از غرور ملی و کشورشان می گفتند. از پیروزی بر حریفان، از شکست دشمنان، از غلبه بر اجنوان و مدام شعارها تکرار می شد. و رحیمی که مست شده به جماعت چشمی دوخت از کنار مادر دور شد و به سمت جماعت رفت از یکی در میان شادمانان وطنی پرسید چه شده است مرد در حالی که فریاد وطن وطن سر می‌داد گفت اجنبان را از بین بردیم سه گل به آنها زدیم دیگر برایشان آبرو و شرفی نمانده است رحیم گفت در چه زمینی پیروز شدیم داشت جملهش را تصیم می کرد که بداند چه رشته ورزشی است که مرد به میان حرفش آمد و گفت در زمین خودشان در کشور خودشان نابودشان کردیم اینها در حد و اندازه ما نیستند که رهیم که به با پاسخش نرسیده بود از کنار مرد دور شد و به یکی دیگر از هموطنان خود را رساند رو به او پرسید ببخشید چگونه دشمن را شکست دادیم هموطن در حالی که داش فریاد می کشید و پرچم را در دستان اشتکان میداد گفت به خاری نابودشان کردیم در برابر من به خاک نشستند، سر تعظیم فرود آوردند، سه گل به آنها زدیم، آن هم در خانه خودشان، بازی را ندیدی؟ رحیم که کلافه بود گفت نه، چه بازی؟ هموتن در حالی که لبخند بر لب داشت، با حالت تمسخور گفت، شترنج. مادر رحیم از گم کردن او در جمعیت هراسناک شده بود، به این سو و سو سرک می کشید. اما نمی توانست در میان این جمعیت انبوه او را پیدا کند. هر بچه ای را که می دید با خودش فکر می کرد رحیم باشد اما بعد از رو, در رو شدن با او می فهمید که راه را به اشتباه رفته است رحیم دیگر از هموطنان را دید و از او پرسید ما در چه ورزشی بردیم؟ زن هموطن در حالی که نگاهی با تعجب به او داشت گفت فوتبال تو اصلا جعبه جادو نگاه نمی کنی؟ بعد هم با قورولوند از کنار رحیم دور شد و گفت اینها دیگر هستند؟ حتی نمیدانند ما در چه رشته ورزشی پیروز شدی. رحیم به یاد مادرش افتاد. خود را به جایی که آمده بود رساند. در میان جمعیت نمی توانست که مادرش را پیدا کند. قلبش به تندی می‌زد. در جستجوی مادرش بود که در همین میان یکی او را به سمت خود بازگرداند. دید که مادرش است. او را به آغوش کشید و بیمهابا گریه کرد. بریده بریده می‌گفت: "رحیم جان کجا بودی؟ کجا رفته بودی؟" اگر گم می شدی چه؟ رحیم در حالی که به آغوش مادرش بود و به سختی فشرده می شد پرسید مادر اجنبان حال گریه می کنند مادرش سرتکان داد و عشقایش را پاک کرد رحیم گفت یعنی yani آنها به ناراحتی تو هستند مثلا فرزندانشان را گم کردند مادر رحیم دستان رحیم را گرفت و از میان جماعت دور شد دیگر چیزی نگفت و رحیم هم حرفی نزد تنها دور شدند و به سمت خانه رفتند. در طول مسیر باز هم جماعت بیشمار را میگیدند که شادمان در خیابانها فریاد میکشیدند. همه جا را پرجمهای سرزمین احاطه کرده بود. از همه جا سرودهای ملی به گوش میرسید. برخی از مغازهداران زبط صوتها را بیرون گذاشته صدایش را زیاد کردند و آهنگهای پیروزی گذاشتند. همه جای وطن پر شده بود از نام و یاد وطن. خیابانها همه جای شهر به نام وطن مزیم بود که رحیم و مادرش به خانه رسیدند بعد از چندی آماده خوابیدن شدند رحیم بر زمین بر روی تشکش چهرهی اجنبان را دید که به سر و روی خود میکوبند عشق میریزند گریه و ماتم سر میدهند رحیم همه را دید که خاک بر سر میریزند از خاک سرزمینشان بر روی خود ریخت فریاد و ناله سر میدهند در برابرشان هموطنانی ای ساده که بر آنان فخر میفروشند. مدام به آنان کنایه میزنند که در خانه خود در سرزمین خود مغلوب شده اید. همه عدد سه را با دست نشان میدهند و رو به اجنبان به آنان میفهمانند که در این مبارزه شکست خورده اند. رحیم در میان همین افکار و با دیدن صورت هموطنان و اجنبان به خواب رفت تا فردا در روز اول سال تحصیلی به مدرسه تازه خود نقل مکان کند برود و با هموطنان در کلاسی بنشیند که در مبارزهای برای تصاحب بهترین ها باز با هم مبارزه کنند و جهان همواره به دنبال برترین ها بگردد و هر بار برخی را پیروزمند و برخی را شکست خورده سازد فردا صبحان روز رحیم به همراه مادرش به مدرسه تازه رفت مدرسه‌ای که از مدرسه گذشتهاش بزرگتر بود چای بیشتری داشت حیات بزرگتری در اختیارشان بود و تعداد شاگردها بیشتر بود او دورهی از تحصیل را پشت سر گذاشته بود و حال به مرحله تازهی از دانستن و دانش رسیده بود در مدرسه بزرگتر با هم شاگردیانی بزرگتر و بالغتر دوست نداشت مادرش در کنارش باشد دوستاش هر چه زودتر از کنار او دور شود و همشاگردیان مدرسه به او با چشم خرد و حقیری ننگرند. وقتی داشت از حیات و از میان هم مدرسه ای ها میگذشت صدایی شنید که می گفتفت چنانه به همراه مادرش به مدرسه آمده یکی دیگر از دو گفت نکند موازه به دزدنش مواظب او باشید کنایه ها را میشنید و دست مادرش را رها کرد بعد از شنیدن ها بود که به مادرش گفت می شود به سر کار خود بازگردی؟ می خواهم در مدرسه تنها باشم. مادر با بیمیلی پاسخ داد بگذار به مدیر مدرسه بگویم که تو را آوردم بعد از آن به سر کار خواهم رفت. بعد از مکالمه کوداه مادر رحیم و مدیر مدرسه مادر از سحن مدرسه دور شد و رحیم به حیات مدرسه آمد. به گوشه ایستال و در چشم برهم زدنی جماعتی از هممدرسی ها به نزدش آمدند یکی از آنان گفت من او را دیدم او با مادرش به مدرسه آمده است پسر خوبیست فقط کمی مامانی است. یکی دیگر گفت سیاد سر به سرش نگذارید شاید گریه کند من حوصله ونگ ونگ زدن کودکان را ندارم یک به یک میگفتند و به فاصله کوتاهی از گفتنها همه میخندیدند و رحیمی که هیچ پاسخی برای گفتن نداشت مدام با خود فکر می کرد که تا جزمان این کنایه ها ادامه خواهد داشت که انتظارش به پایان رسید. بچه ها سوشه تازه ای جستند تا به سوی او بروند و زمان تفریح کوتاه تا شروع کلاس ها را بگذرانند. همه با هم و در کنار هم به سوی یکی دیگر از بچه های تازه وارد رفتند. رحیم هم به تبعیت از آنان به دنبالشان راه افتاد. شاید می خواست انتقام این حقیر گیرد. شاید میخواست از آنان آجزانه بخواهد که او را به جمعشان راه دهند و شاید این بار مدرسه شاگرد تازهی به خود داشت او با دیگران متفاوت بود کسی که از چند فرسخی قابل شناسایی بود با تفاوتی فاهش از دیگران مثلا اگر همه بچه ها چشم رنگی داشتند او چشمانی سیاه داشت یا شاید اگر همه کودکان سفید پوست بودند او رنگ سیاهی بر تن داشت یا شاید اگر همه چشم یکسان داشتند او چشمانی تنگتر و گشاد تر داشت. هرچه بود او با دیگران متفاوت بود و این تفاوت شروع کنایه ها شد. یکی از جمعشان گفت تو اجنبی هستی؟ پسرک تازه وارد چیزی نگفت و سر به زیر انداخت. یکی دیگر به سرعت گفت او از دشمنان است. او دشمن هموطنان است. او از کهتران است. از حقیران است. کسی نمی خندید دیگر جایی برای خندیدن نبود رحیم تنها میدید. چیزی برای گفتن نداشت تنها می و کرده ها را به چشم می دید یکی گفت آیا شناسنامه داری؟ به تو ویزای بودن دادند؟ اجازه اقامت داری؟ یکی دیگر به سرعت گفت اگر نداده اند می خودمان برایت ویزا صادر کنیم از این پس باید با اجازه ما تردد کنی. یکی دیگر به تندی گفت نکند از روسیاهان دیشبی از همانان که در کشور خود شکست خوردند تو از همان بزدلانی تنها بزدلان این گونه خموش میمانند و دم از دم نمی گشایند. رحیم کماکان بیننده بود تنها میدید و با خود به خیشتنش لعن می فرستاد که چرا به جمع آنان آمده است. در همین میانه سعی کرد از میانشان دور شود که یکی او را دید و فریاد کشان گفت. به به امسال چه مدرسه ای داریم بچه چنانه و دشمن و بزدل اینجا دیگر جای ما نیست باید به همین بزدلان واگذاریمش یکی از جمع محصلان که از باقی جدسه بزرگتری داشت گفت او را با این اجنب مقایسه نکن هرچه باشد از هموطنان است نه به حقارت و پسی اینان پسرک اجنبی در حالی که سرش را بالا می گرفت گفت من از کشور همسایه هستم در همین نزدیکی شما چند سال اینجا خواهیم بود یکی به میان حرفش آمد و گفت دلش را نشکنید او به ما پناه آورده است خودشان که ورزه هیچ کاری ندارند آمدهاند تا اینجا مفتخاری کنند پسر همسایه دیگر نتوانست خودش را کنترل کند به سمت او هجوم برد حمله کرد و با او گلاویز شد به صورتش مشت میکوفت، و با فریاد هوار میزد. ما مفتخار نیستیم ما مفتخار نیستیم در چشم برهم تمام کودکان به مدد هموطن آمدند و پسر اجنبی را غرق زمین کردند هر کسی به او زربه میزد. با زدن ضربت به او کنایه می گفت اجنبی، دشمن، مفتخاره همه می گفتند و به او ضربه می زدند و هم سمرهیم همه چیز را می دید. کوتک خوردن و زدن زدنها را فریاد کشیدن و زدن زدنها را عشقها و لبخندها را همه چیز را میدید و بر سر جایش خوشک مانده بود یکی از هموطنان رو به او کرد و گفت تو مگر غیرت نداری؟ چرا زربه ای نمیزنی؟ رحیم آرام به جای خوشک مانده بود و چیزی برای گفتن نداشت هیچ حرکتی نمیتوانست که انجام دهد تنها بر جای خوشک مانده و چشم بر دریده شدن اجنبی دوخته بود که همه از هر سو بر سر و صورت او می کفتند. هموطن دوباره جمله را تکرار کرد و رحیم را هل داد تا شاید به سر قیرت بیاید اما او خشک بر جای مانده بود که صدای سوت نازم مدرسه در حیات بلند شد. در چشم بر زدنی از صدای سوت همه از جنازه اجنبی برخاستند. تن رنجور و دردمند او را به زمین رها کردند پسری اجنبی به زمین افتاده در خاک وطن اجدادی و اساتیگی آن هم به دست غیرت هموطنانی که از کودکی به راه وطن جان میدادند. اینجا مگر لاتخانه است چه می کنید؟ بر سر چه موضوعی به جان هم افتاده اید؟ همه به دفتر بروید تکلیف شما را در همین روز نخست روشن خواهم کرد نمیگذارم اینجا را لاتخانه کنید. همه ی کودکان خاطی از جمله رهیم که در دعوا شرکت نداشت اما به نزدیکی رویداد بود به دفتر مدرسه برده شدند. نازم ایستاد در برابرشان. مدیر بر تخت ریاست تکیه زد. شروع به نطخ کردند. چه خبر شده است؟ سر چه موضوعی در همین اول آمدن به مدرسه به جان هم افتاده اید؟ یکی از کودکان بلافاصله پاسخ گفت اجنبی به مملکت ما توهین می کند به پشتبانی از او دیگرانی گفتند نان ما را می خورد مفتخاره و به ما ناسزا می گوید کودک همسایه که حال خوشی نداشت به سرعت فریاد زد ما مفتخاره نیستیم نازم بلافاصله فاصله رو به او گفت ساکت باش با همه شما هستم ساکت باشید من حوصله این جنجال ها را ندارم مدیر به میان حرفش آمد و در حالی که اینکش را بر صورتش تنظیم می کرد از جای خود بلند شد. آرام, آرام به سمت پسر همسایه آمد و رو به او این گونه گفت: اگر تو را در این مدرسه ثبت نام کردم دلیل نمی شود هر غلطی بکنی و هر چه دلت میخواهد را به زبان برانی. پسر همسایه در حالی که سرش را پایین انداخته بود چیزی نگفت و دوباره به حالت دفاعی خود بازگشت. حالا نوبت بزرگان مدرسه بود تا او را به هجوم خود بدرند. کودکان همسن و سال در حالی که به دلشان آب غنج می رفت، مدام ریسه می رفتند که نازم فریاد کنان همه را ساکت کرد. یکی از جمعشان فریاد زد اما آقای نازم او به نژاد همه ما توهین کرد او خاک ما را میهن ما را مسخره کرد. نباید او را می زدیم؟ رحیم تمام مدت ساکت و مبهود تنها نظاره می کرد. خاک اجدادی همیشه همراهش بود. همواره از وطن و هموطنان شنیده بود اما این نخستین بار روگاروی روی حقیقین او با اجنبان و هموطنان بود زبانش بند آمده بود دیگر به مانند شب گذشته سوالهای فرایی نداشت و از حاضران بپرسد تنها به یاد عشق کامی افتاد از چش اجنبان ناله های اجنبان شکست در کارخانه بیپولی و بدبختی تحریم و سایل ساخته به دستشان شکست در خانه فضاحت مرگ شرافتشان عشقاب و بیفرزند شدنشان گم کردن بدبختی و مصیبت به خاک نشستنشان مفت خارگی بزرگی خاک اجدادی فروختن منت به همسایگان در خاک نشاندن به جنازه ها لعنت فرستادن کتک زدن غیرت همه به ذهنش هجوم می آورد و او باز هم ساکت بود و چیزی برای گفتن نداشت. نازم فریاد زنان رو به پسر همسایه گفت بار آخرت باشد که پرویی پر می کنی. بار دیگر نمیگذارم به مدرسه بیایی. به مانند دیگر هموطنانت باید کار کنی. می حمال باشی؟ مدیر در حالی که به سمت میزش باز می گشت قرولوند کنان گفت همین است. وقتی این اجنبیان را در مملکت راه می همین می شود. به آنها لطف می کنیم و در آخر دو گرتونیمشان هم از ما باقی است. رو به آنها به آستر هم می خواهند. رحیم دیوانه شده بود. دیگر نتوانست به دوست دوستاش دستانش را به دستان پسرک گره بزند و با هم پرواز کنند. به آسمان بروند. از میان آنان دور شوند. به سمتش رفت. دستش را گرفت و با او از سالن خارج شد. می دوید دورتر و دورتر میشد. پسرک همراهش بود، به دنبالش می‌آمد. نمیدانست چه باید بکند. باید او را به سرزمین خود ببرد. باید او را دوباره بیافریند. باید به او چهره‌ای همسان ببخشد. باید در برابر هموطنان از او هموطنی بسازد یا باید هموطنان را از وطن دور کند. به جسم و به فکرهایشان دوباره اندیشه بسازد. نمیدانست چه بکند که رو به مدیر گفت: «ببخشید می توانم به دستشویی بروم؟ مدیر گفت برو: و بعد به کلاست برو و بعد با صدای بلند در حالی که رحیم از سالن دور میشد گفت؟ این بار آخرت باشد که بلبل زبانی میکنی ما به تو رحم کردیم ما به تو لطف کردیم. ما به تو؟ و باز ادامه داد و به آخرش همه را به کلاس ها باز پس فرستاد تا درس بخوانند، تا به درس ها همین تعالیم را فراگیرند و به فردایش نازمی با تدبیر، مدیری با فرهنگ، معلمی با شعور، دکتری خوشنژاد مهندسی هموطن و هزاری با مملکت شوند و به راه خاک اجدادی و باستانیشان از جان و جهان بگذرند. کتاب کاخ اثر نیما شهرساری بخش سوم با صدای زنگ ساعت از جای برخواسته بود و در حالی که چشمانش را به آرامی میمالید ابتدا جعبه جادو را روشن کرد و پس از آن به سمت مبل رفت پیش از آن که او از خواب برخیزد مادرش خانه را ترک کرده و به سر کار رفته بود حالو هم باید خود را به یکی از کلاس‌های آمادگی برای حضور در دانشگاه در حالی که به آینه نگاه می‌کرد، صدای جبهه جادوخانه را پر کرد و مجری برنامه صبحگاهی با شور و حرارت به مخاطبین اینگونه خوش خوشامد گفت: سلام به همه‌ی هموطنان غیور و دلاورم، ای مردمان سرزمین کهن، روز تازه‌ای برآمده و خورشید دوباره بر فلاتمان چهره گسترانده است. بیایید تا سپاسگزار این خاک اجدادی باشیم. بلافاصله فاصله بعد از خاتمه این خوشامدگویی آمدگویی موسیقی فضای خانه را پر کرد که جعبه جادو تدارک دیده بود. موسیقی وطنی با شعری برای هموطنان گفتن از دلاوری و رشادت های آنان سخن از جان برکفودن برای این خاک پاک بیدار کردن غرور ملی و احساس حب به وطن و هزاری عناوین که با واژگانی نزدیک از رگ گردن به خون جاری در رکای مخاطبان نفوذ می کرد. اما رحیم در برابر آینه به صورت خود نگاه می کرد. به ریش های تازه رویده که صورتش را تغییر داده بود. به چهره تازه ای که با آن بی میل نبود. با خودش خود را با ریش های انبوه تصور کرد. بعد در چشم برهم زدنی هران ساخته بود را با تیخ، تراشید و بیال و کوپال به خود نگریست. این تغییر چهره را دوست داشت این بدل شدن از یک سیما به سیمایی در دورده را خوش داشت اما فریادهای خاننده در جعبه جادو افکارش را به هم زد و تن جانم همه از آن تو باد به خاکت ریشه دارم قلب تو شاد و تن ایمان من ای جاه پیشین رحیم خود و شعر را تغییر داد بگو تغییر باید از تو تغییر شعر خوانده شده به فریادهای خاننده در فضا گم شد و هموطن با تکرار واپس این نه نبرهیم که به همه فهماند باید چگونه خواند و چگونه وطن راست تایید همه دنیا توی ای جام شیرین رحیم صورتش را شست و از خلا بیرون آمد مقداری نان و مخلفات صبحانه روی میز گذاشت و در برابر جعبه جادو جا خوش گرد و به تصویر زرین در برابر چشم دوخت در همین بین در میان نگاه ها لغمه ای دهان برد که گوینده با میهمان وارد سر شد. میهمان این گونه رو به هموطنان خواند. سلام میکنم خدمت تمام هموطنان گرامی و برای همه هموطنان در جاجای دنیا آرزوی سلامت و بهروزی دارم. رحیم در حالی که لغمه ای را در دهان میجوید جملات او را سبکسنگی می کرد. به واجه ها دقیق می و از خود تغازای پاسخ داشت آیا آرزوی سلامت برای هموطنان و نداشتن چنین آرزویی برای تمام ابنای بشر و یا فراتر از آن تمام جانها به معنای نفی سلامت دیگران است یا فراتر از آن به معنای آرزوی بیماری برای دیگران محسوب می شود یا اینها خاستش مردن هموطنان در برابر دیگران است و نفی آنان را در بر ندارد آیا تنها هموطنان ما گرامی و بزرگوارند؟ آیا در دیگر نقاط جهان نیستند انسانهایی بزرگوار و محترم که لایق سنا باشند؟ آیا تنها به واسطه زاده شدن در این خاک به مراتبی میرسیم که لایق سنا و تکریم باشیم؟ آیا این سنا گفتن به هموطنان نفی دیگران و پس شمردن اجنبان نیست؟ به یاد یکی دیگر از خاطراتش با جعبه جادو افتاد، به یاد یک بار که یکی از گزارشگران ورزشی در همد و ستایش هموطنان در قیاس با اجنبان مردمان دیار کهان را با شعور خطاب کرد و او اولین برداشتش بی خوانده شدن اجنبان بود. نه مگر ما برای خطاب کردن هر فضیلتی در مقام قیاس برمیآییم و با مخاطب قرار دادن دیگری خود را به مرتبتی والاتر از آنان می رسانیم. چرا تا به این حد دنیایمان جهان قیاس است؟ جهان رقابت است و چگونه ما را به دنیایی خانده که در آن باید برترین باشیم باید برای برتری دیگران را پست کنیم و به دوشهای خمیده آنان جهان را فتح کنیم جعبه جادو کماکان در حال افاظه فض بود و رهین در افکارش بوته می خورد برای پاسخهای بیشمارش جواب دندانگیری نداشت و با گفتن یک جمله دیگر از مجلی به افسون سوالاتش افسوده شد هم شهریان عزیز شما پای باید در بسیاری از رفتارهای اجتماعی الگو باشید مجری و میهمان کارشناس و عالم می و تکرار میکردند بیشتر بر سوالات طول و دراز رحیم میافزودند افزودند رحیم با چالش دیگری روبرو شده بود و گذر زمان را از خاطر برده بود با خود به یاد این برتری جویی و بزرگ پنداری های هموطنان افتاد که تنها به آن سوی مرزها و اجنبان خلاصه نمی شود آنان مراتب بیشماری را به وجود آورده و بران می بالند این طبقات بیشمار اجتماعی از مرزها ها آغاز شده و به هرکس کس حوییتی در خور زادگاهش می بخشد که به همراه او متولد می شود و بسته به خاک زادگاهش در وطن جایگاه پیدا می کند پای تخت نشینان این قدیسگان بزرگوار بشریت آنان در پای تخت مهمترین کشور جهان زاده شدند و حقا دارای ارزشی فراوانتر هم هستند. از نحوه سخنگفتنشان تا زبان مرسومشان بر همگان برتری دارند. زیرا که این والاترین زبانها نه در خاک اجدادی که به سراسر دنیاست. است. این قاعده است که همگان آن را پذیرفته و نمیتوانند به احتمالات آیندهش منتقد باشند. زیرا اصل این بازی و تقسیمات، مورد قبول اکثریت است حال با قبول این قواعد بازی به دنیایی گام نهاده که در آن برای برتری همدیگر را به خاک و خون می کشند. در این تقسیمات از یکدیگر پیشی گرفته و به هر ابزاری متوصل می شوند تا نه به واسطه اکتساب و تلاش که به واسطه جوهره ای ذاتی بی و انجام دادن کاری به مرتبه والانشینی دست یابند این شرایط غالب بر جهان است که گهگاه نکوهیده هم می شود اما اصل پابرجاست و ارزش برای آن اقلیت روشنفک در اکتساب و تلاش کردن نهفته است با همان قایده پیشترها که بازگشت به برتری جویی و خود بزرگ بینیست رحیم با فرو رفتن به افکار و درک پیچیدگی ها به نکات در برابر چشم دوخت و آنان را از زیر زربین گذراند به یاد مردم روستاها افتاد، همان روستا زادگاهش به یاد آنانی افتاد که در مقام قیاس با پایتخت نشینان خرد و حقیرند. رسیدن به این مرتبت بزرگی را آرزو می کنند. اگر کسی از آنان به این پایتخت بزرگمندان دست یابد مورد احترام عموم قرار خواهد گرفت و وسلت با این بزرگمندان جزء افتخارات قومی به حساب خواهد آمد. اما قائل تنها به همین خودپسندی ها و خودپست بینی ها خلاصه نمی شود و این قاعده بازی ادامه دارد. حال مردم روستایی که به هقارت در برابر بزرگان سر فرود آورده اند باید که این احساس تحقیر را به نوعی مهار کنند. باید جماعتی را بجویند که در برابر آنان نقش خودشان در برابر پای نشینان را ایفا کنند. می تواند روستای کوچکی در اطراف باشد و یا قومی دورتر از آنها شاید مردمان کشور اجنبی همسایه و یا هر قوم و تیره و نژاد دیگری مهم چه کسی بودنش نیست مهم وجودش است به عناوین و اتفاقات تاریخی بسته است مثلا زندگی کردن قومی در کنار آنها که سالیان دراز در کوه زندگی کرده اند دستاورد خوبی برای تمسخر و تحقیر آنان است تا هم حس حقارتشان که از بزرگان کشیدند مهار شود و هم به احساس خوش خود بزرگینی دست یابند و باز به ای در خیش ببالند که هیچ ارتباطی به وجود آنان ندارد هر پیشینه تاریخی و هویتی می تواند بروز این پس شمردن میل به بزرگی و احترام باشد موضوع مهم وجود این احساس و گسترش آن است که در سرزمین اجدادی رهین جاری و ساری است او هر کدام از شهرها و روساها را که در زندگی به خاک اجدادی دیده است به خاطر می آورد و این دومینو را در برابر ترسیم می کند پس شدن از سوی و پاسخ به پس گردن از سوی دیگران در یک نگاه کلی از بالای مردمان سرزمین کهل، والاترین جانها هستند و به میانشان مراتب همان گونه سیر می کند و باز والاتر از همه را پدید می آورد که در همه جای زندگی بشر جاری و ساری است. رهیم باز بیاد یاد افتاد، شهرسانی بودن، کوچک و حقیر شمرده شدن، سفیه خانده شدن، دوز و چاپلوس و هزاری عناوین که هر کدام از این اقوام به هم می نامند. و به خود می به یاد همان صحرای دور دست افتاد که در میان کویر جگونه قومشان، و همسری بردن و همسری دادن به پای تخت نشینان به خود میبالند و به قومی که در اطراف اوست می تازد و حاضر نیست جنازه هم قومش را به دوش قوم برابر دهد رسد به ازدواج و در همامی به آنان که بزرگترین پسی هاست. میهمان و جعبه جادو شماکان سخن میگفت از همشهریان تا هموطنان شاید در دردیر سری از همسنفان هم گفت و باز در این دوار گردون آمد و به دنبال تقسیمات بیشتر گشت تا به واسطه از دیگران پیشی گیرد و برتر شود. برام ببالد که در این دار رقابت ساخت شده او مقام والاتری کسب کرده است رحیم لغمنان را چندی بود که در دهان نگاه داشته بود و نمی جوید از یاد برده بود که در حال انجام چه کاری است و تنها به افکارش خرق بود سخنان جعبه جادو را هم نمی شنید و یا ذهنش تنها به کلمات پالای شده واکنش نشان میداد یعنی اگر میهمان مطلبی میگفت رهیم تنها کلمات هموطن خاک دیرین خاک اجدادی همشهری و کلماتی از این دست را شنید و بیشتر به فکر فرو می رفت. دوباره به یاد صحرا و پایتخت میافتاد دوباره همه را با هم مقایسه می کرد. دوباره به علایمی که آنان را به هم پیوند میداد متمرکز میشد و دماره همه ی جورچین ها را به کنار هم میشید ناگاه به ساعتش چشم دوخت و متوجه دیر شدن کلاس درسیش شد شتابان از جای برخاست و به سرعت لباسهایش را پوشید در کسری از دقیقه در حالی که جعبه جادو را خاموش میکرد رو به میهمان و مجری گفت بدروت هموطن هم در خیابان بود در خیابان یکی از شهرهای کوهن و دیرین و آدمیان در شهری که مردمش باور داشتند زاده شدن در این خاک افتخاری است. افتخار به خاک و خون و نجات افتخار به هموطن بودن با فلان شاعر فلان نویسنده فلان فیلسوف و هنرمند و سیاستمدار مدار که اتفاقا همه اشان هم از دنیا رفته بودند و یا اگر کسی از آنان در حال حاضر زنده بود باید در آب نمک میخوابید تا در دور صبحی بعد از مرگ به جایگاه رفیع قابل ستایش توسط هموطنان دست یابد و به او هم افتخار کنند. رحیم با خود گفت در واقع به آنها افتخار نمی کنند، به خودشان افتخار می کنند. یعنی آنان زاده شده در این خاک تا مرتبه این خاک و نژاد را افزایش دهند. تا در دیر صبحی باشند مردمانی که به واسطه حضور همانان بر خود ببالند که ما هم نژاد آنانی یا هم خون آنانیم یا آنان اجداد ما هستند نه دیگران در دور دستها آنان در این سرزمین به دنیا آمده اند رحیم از خود پرسید آیا آنان به واسطه این خاک اینگونه پرورده شدند؟ آیا وطن به داشتن آنان مفتخر است یا آنان به داشتن این وطن؟ اگر این خاک اینگونه می پروراند چرا همگان همتای آنان نشده اند؟ در جا جای دیگر دنیا که بودند هم و چه بسا والاتر از آنان ترکیب خاک و خون و نژاد را چه کردند؟ رحیم به خود لعنت فرستاد و گفت ای جعبه جادو کار خودت را کردی ای فرهنگ دیرین و والا خاکش دادی این برتری تلبی و والا انگاری را به من نیز تزریخ کردی و حال در جستجوی والاش مردن و تراس پنداری همگان بر آمده رحیم در حالی که از کنار مردمان میگذشت به چشم تک, تک آنان چشم دوخت به آنان خیره شد و از خود پرسید آیا اینان به زاده شدن در این خاک به خود می بالند؟ آیا اینان خود را والاتر از دیگر ابنهای بشر و جانها می‌پندارند؟ بعد به خود نهیب زد و گفت بیشک آنان خود را والاترین جانهای جهان شمردند و بر این ارزش بر خود بالیدند؟ اما سوال آنجاست که آیا این خود چیزی هم به آنان افسوده است. مثلا به ارزش افسوده، فرهنگ بیشتری به آنان تزریق شده، بعد بلافاصل پاسخ داد و اینگونه به خود خطاب کرد. آری به آنان فرهنگ والانشینی را عطا کرده، که همواره به برتری بیندیشند، برتر بپندارند و کهتر بدارند، گاه خود را کهتر بشمارند و گاه در برابر کهتر از خود فخر بفروشند، آماده شوند تا در برابر بزرگان سر تسلیم فرود آورند و فرهنگی به جانشان رسوخ کند که فرمانبرداری و احترام والا ترین ارزش ها در آن شمرده شود. رهیم در حالی که کسی از کنارش میگذشت به یاد داستانی که در پیشترها خوانده بود افتاد. در دور زمانانی که برترین اقوام بر دیگران حاکم بودند، همه برده شمرده میشدند و آن قوم والا و برتر ارباب بر دیگران بود. به یاد آورد که در آن داستان گفته میشد اگر برتری به خیابان بود، آن وظیفه به دوش کهتران بود که در برابر آنان کرنش کنند. از خیابانی که آنان عبور می کنند عبور نکنند و در دل یکی از همان روزها به واسطه آن که کهتری خواست از برابر دکان برتری عبور کند، مجبور شد تا به نردبان در حتی پای بر خاک قدسی والان شینان مگذارد، رحیم به دوره این داستان دور بود که خیشتن را در لباس برتری تصویر کرد رکوزاران را کهتر انگاشت حکم بز کرد تا کهتران برابر او که برتر از دیگران بود کرنش کنند او بادی به غبغب انداخت و در حالی که از کنار آدمیان می‌گذشت، خاری و خفت آنان را نظاره کرد و باز به خود بالید و باز بزرگتر شد چه مستانه راه می رفت که به خود می بالید. و چه از این اوضای ساخت شادمان بود همه وظیفه داشتند در برابر او کرنش کنند دستش را ببوسند به پایش بیفتند و در همین میان و در این تصویر برامده باز پرسش ها حجوم آورد و تکرار کرد این برتری به ذات و نجات چه ها خواهد کرد که در برابر او چه سرنوشتی خواهند داشت به فردا که چه خواهد کرد و این عقده و انتقام را چگونه باز خواهند گرفت چه کسی است که جای بر پای برتر گذاردن را نفع کند و به آن بیمیل باشد بعد در حالی که از چهره تصویر شده به ذهن خیش از خیشتن اش شهر نیمبوت خواند جا به پای برتران گذاردن آرزوی آدمی است یگانه آرزویی که به طول یک و یک تاپنداری به خوردشان دادند و حال تمام شکوه را به همین والانشینی خلاصه کردهند. اما چه شکوه، به سختی و سخت است؟ ایستادن و تغییر، سخت است و با شکوه. رحیم در حالی که آنقدر در افکارش غرق بود که کلاس را فراموش کرده، در خیابان‌ها مقصدی معلوم راه میرفت از مقصدش دور شده بود و به هدفی در دور دست ها می دوخت. تمام جانش سوال بود. از همان ابتدا هم سوال می کرد. به همه چیز شک داشت. برای همه چیز به دنبال پاسخهای بیشمار می گشت و به قانه نبود. و حال که باز دریای از افکار در برابرش بود باید راه می رفت و فکر می کرد. باید بی سر انجام تنها به ادامه مسیر می پرداخت. باید ادامه میداد و بیشتر فکر می کرد که پاسخها به فکرهای طویل نهفته بود. مسیر بی فرجام را طی می کرد و هر بار با نگاه کردن به یکی از آدمیان او را در این دومینوی طول و دراز تصویر می کرد. او در کجای نقشه جای گرفته است؟ آیا جز پای تخت نشینان والا و بزرگوار محسوب شده؟ آیا از فرودستان در روستاهاست؟ هاست؟ اگر از آنان به میان آمد؟ چه کسانی کهتر از او شمرده شده اند؟ از آن کهتران چه کسی کهتر است؟ سرآخر این کهتران به کجا خط می شود و آن قوم و طبقه از این کهتر شمرده شدن چه به روز می دهند؟ اگر او از پای تخت است دیگر چه برتری هایی بر دیگران دارد تا برانم بتازد؟ مثلا آیا از اغنیاست آیا تحصیلات فراوان کرده و شن اجتماعی خیش را خریده است؟ به همه نگاه می کرد و در ذهن برای هر کدام تصویری می ساخت. به تصویر بالو پر می داد و برام می افسود و گاه از آن کم می کرد تا به سرانجامی برسد اما این راه هیچ سرانجام نداشت و تنها به اعماقش غرق تر بود این راه رفتن ادامه داشت تا سرانجامش در برابر استخری خشک ماند تکان نخورد، حرکتی نکرد جهان و بارش را به دوش کشید. سنگینی همه جهان را در آغوش کشید و به درب سرخ مات ماند. چند بار به دهانش را غورت داد. چند باری پلک زد. با خود می گفت شاید به اشتباه دیده است. شاید این دروغی بیش نیست. شاید اینها به واسطه تخیلات اوست. از این رو بود که مدام پلک می زد. چشمانش را می فشرد. اما به پاسخی نمی رسید. تصویر در برابر همان بود که از نخستش دیده بود اما باورش برای او سخت و جانفرسا بود به چشمانش هم دیگر اعتماد نداشت آخر از آن روزگاران دیرین و دیوانوار بسیار گذشته بود حال که جهان اینگونه در دیوانگی نبود دنیا تغییر کرده و آدمیان بهتر شده اند. آری اینها به واسطه فکرهای بیشمار من است. اینها به دلیل ریز شدن بیش از اندازه در این موضوعات است و حال چشمان من برای خواندن متوهم شده هند. از این روبوتی که رهیم به یکی از هموطنان در نزدیکش اشاره کرد او را فرا خواند و گفت هموطن بر آن کاغذ نصر شده به روی درب استرخ چه نوشته است هموطن در حالی که شانه بالا انداخته بود با میلی پرسید کدا نوشته رحیم به دل شاد شد با خود گفت آری نوشته ای بر درب نیست و این کابوس بیداری من بوده است. شادمان به درب در برابر چشم بوخته بود و حتی چشمانش در تدارک نیست و نابود کردن نوشته برآمده بودند که هموتن فریاد کنان گفت کدام نوشته را میگویی؟ آنی که بر وسط درب کفتند؟ سواد خواندن نداری؟ رحیم در حالی که با صدای فریادهای او به خود آمده بود گفت آری همان کاغذ نصف شده در وسط درب. هموتن در حالی که بادی به غبغب انداخته بود و حال دلیل تفاخر برخیشتنش نسبت به رحیم داشتن سواد و پای تخت نشینیش بود گفت نوشته از ورود اتباه خارجی به درون استخر معذوریم بعد با حالتی خسمانه گفت منظورش از اتباه خارجی همین کهتران در نزدیک است. بعد در حالی که سینه را ستب کرده بود از کنار رحیم گذشت و او را به حال خود رها کرد. رحیم دیوانه شده بود. باز همه دنیا به رویش حجوم آورده بودند. از پذیرش آنان در استخر معذورند آنان را نجس میپندارند. آنان را نجاد کهتر میشمارند. شاید فکر میکنند با رفتن آنان در آب همه آب کسیف می شود. نباید تن تاهر و پاک هموطنان در کنار کهتران اوریان شود. در یک آب قرار گیرد. رحیم در حالی که سرش را در دست گرفته بود با سرعت زیاد شروع به دویدن کرد. رفت تا از آنجا دور شود. رفت تا در هوای آن نفس نکشد. رفت تا در دیاری دورتر سکنا گزیند. دیوان وار میدوید، تنش به تن هم و تنان میخورد. با خود می گفت نکند آنان به واسطه همتن شدن با من نجس شده باشند. نکند چون همه نفس در یک هوا میکشیم نجس شویم آنها با این اطباع خارجی در خاک چه می کنند؟ نکند در زمانی دیگر آنان را جبر بر طاعت و عبادت ما کنند. نکند آنان باید مایت کرنشونند میدوید و مدام از خود سوال میکرد مدام فریاد میزد که از تنگی نفسی ایستاد نفس نفس کنان به سراپای شهر نگاه کرد به مردمانی که در آمد و شد بودند به آنانی که هر روز تعلیم تازه‌ای میگرفتند هر بار برایشان به دیوارها به ها، به نگارها به هنرها به شعرها و به جعبها به جادوها و به هرچه در دست بود و نبود می نگاشتند و تعلیم می دیدند و دیوانه تر به پیش می آمدند. آنان در این کلاس درس آمده تا بیاموزند و به فردایی همه را در برابر دیگران باز بستهند و حال در این ایستادن، در این نفس کشیدن به ساختمان نیمه کاری اغنیایی دید او اشرف همگان بود شاه و شرف زمان بود او که از والانشینان و پرگوهران بود وای که او صاحب و خداوندان بود او آمده بود تا فریاد کشان هران چه دل تنگش میخواست بگوید و همه را به فرمان و تاعت درآورد. آورد اغنیای والانشین که از پای تخت نشینان بود به خاک و خون و نژاد از همگان برتر بود او به تحصیل والا شد به حاکم شد به قدرت فاخر شد به جمع دیگران ناطق شد و در برابر یکی از کهتران دیار دور یکی از میهمانان برخاک یکی از کارگران دور از افلاک یکی از آنان که کهتر و پستر شمرده شدند یکی از آنان که به تن نجس خوانده شدند یکی از آنان که اجنب بود را برابر دید و فریاد کشان خواند. کار کن بی شرف کار کن آنگونه کار کن که از تو خواستم تو برای کار کردن به این سرزمین آمده ای. آمده ای تا در برابر ما اطاعت کنی آمده ای تا برای ما پس شوی پس شمردگان هیچ نگفتند لام از کام نگشودند چیزی برای عرض نداشتند باید که تحقیر میشدند و لام از کام بر آوردند اما یکی از آنان شاید که فریاد کشید شاید به مانند همان کودک دیربازان فریاد زد ما بیشرف نیستیم ما مفتخاره نیستیم ای دیوانگان ما هم جانیم شاید او فریاد که و غنی را دیوانه تر کرد هموطن در خاک اجدادی را دیوانه تر کرد و آنچه فرا آموخته بود را به قلیان سرکش خود بروز داد تا آموزگاران دیروز تا معلمان و مدیران اجدادی ببینند سمره تعلیمشان را ای مفت خاره هرزه اگر کار نمی کنی از خاک ما گم شو از اینجا برو در هوای ما نفس نکش شاید هموطنان به گرده هم آمدند و آنان را با فریاد و ضرب و شتم از خانه بیرون کردند شاید مدیران این بار بر رأی و قضاوت نشستند و سر شکسته اجدبان را به چوب تر دوبارهی شکستند و باز خواندند از وطن و هموطن و دیوانگان پیرتن رهیم صدا می شنید. فریاد می شنید. ما جانین را شنید و دیوانوار دوید دوید و دور شد رفت و از این دیوانگی ها رخت بست تا دورتر و دورتر لانه کند تا جایی دورتر از این افکار بیمار و پوسیده را بشنود اما هزاری به گوش هزاری به سراسر جهان خواندند جهان جهان برترهاست و هر بار به جرعه از این زهر نوشیدند و این جام شوکران را به حلق خاص و عام ریختند تا به این ذهن دیوانوار همه مسموم شوند و همه گرفتار در آن به این بازی جان دهند کتاب کاخ اثر نیما سواری بخش چهارم صدای سور همه جای کشور را پر کرده بود شیپورها نواخته میشد، مارشا مارش ها می بر تبل ها و باز ندای خاک کهان فضا را پر میکرد. برخی زیده هموطنان به پاخی زید و دنیا را به پاخی زانید هموطن روز آزمون فرار سیده است به راه وطن و خاک پاک اجدادی بکشید و کشته شوید جان دهید، جان برکف به میدان بیایید و برای وطن بمیرید جنگ آغاز شده بود دوباره ندای جنگ تمام کشور را پر کرده بود دوباره به میان آمده بودند این بار که بود بر سر چه چیز به جان هم افتاده بودند بخشی از خاک و سرزمین دعوا و شاخشان کشیدن ها اخم به یکی از مسئولین دعواهای پشت پرده، تحکیم قدرت، پیشبرد برد اقتدار و هزاری عناوین دیگر هرچه بود سور ندای جنگ دادند و اعلان جنگ با دشمن و اجنبان در برابر به گوش رسید همه کشور دانستند که جنگ بزرگ در پیش است همه خواندند که این جنگ میان سیاهی و سپیدی است این جنگ برای اقتدار بیشتر هموطنان است برای بزرگ شدن و بزرگ ماندن هممیهنان است. برای گسترش باور همخاکان است و باز همه دانستند که جنگ عظیمی در پیش است. جعبه جادو شروع کرد به خواندن شیرخانی اساتید برای تحریک جوانان. آوازهای ملی. هر روز روز استقلال وطن است. هر روز فراخونه بودن هموطن است هر روز جشن و پاکوبی به راه خاک و تن است دیوارها پر شد از شعارهای وطنی هرکس به هر گوشه و کنار رخت رزم پوشید و به میدان آمد آمد تا در برابر دشمنی که هیچ از او داند دلیل جنگ را نگفتند به پیش رود و بکشد و کشته شود هر دو سمت ترتیشی از هزاری هموطن و اجنبان بود به آنان چه گفتند؟ چگونه آنان را تحریک کردند و به میدان فراخندند؟ شاید به آرزوی غنایم شاید برای دست به قدرت و ثروت بیشتر شاید به صدای شهفت شاید تحریک وطن پرستی و وطن دوستی شاید به تحمیق از بین رفتن؟ شاید به تهییج در امان نماندن شاید به نشخار امنیت شاید به آبشخور حکمیت به هزاری برایشان خواندند و از دو سوی هزاری را فراهم آوردند که نمیدانستند دعوای اصلی بر تخت نشستگان بر سر چیست؟ شاید دهان کجی میان آن برتر و برتران آن خداوندگاران رد و بدل شد و تاوانش را جماعت بیشماری به میدان جنگ با توپ و فشنگ و باتن و جان دادند و باز هیچ ندانستند به آخرش هم هیچ ندانستند و از ابتدا این گونه شده بود که آنان هیچ ندانند و به آخرش این گونه بحث دادند که آنان هیچ نفهمند رحیم در برابر جعبه جادو نشست، جعبه میخواند برایش میگوید از خون گذشتگان از نیا، از اجداد دور از خاکی که به تاراج میرود، از خاکی که هیچ از آن باقی نخواهد ماند، از خاکی که چشم امید اوست، و هزاران چون او تا از او محافظت کنند، از تاریخ و هویتی که از بین خواهد رفت از فرهنگ وای باز هم فرهنگ باز هجوم فرهنگ و تمدن دیوانش کرد باز به یاد چشمهای پرفروغ فرهنگ پیشینیان و پس شمردن دیگران افتاد باز به یاد خود بزرگ بینی و بست این نگاه افتاد باز برایش و آن اجنبان در پیش رو را به خار تشبیه کردند به کوچکی و پس بودن متهم شدند و باز برایشان خواندند باز برایشان از عباهت و بزرگی این خاک پاک گفتند کارشناس بادی به قبغ انداخت و گفت هر آینه ما با آنان یک تا و یکسان نیستیم آنان در برابر ما به خاک خواهند نشست ما را چه قیاس با این کهدر از کهدران کارشناسان گوی سبقت از یکدیگران میرو بودند و بر کوس جنگ میکوفتند؟ فریاد می کشیدند از بزرگی های مملکت دیرین می گفتند. از این اتحاد و یکدلی برای به خاک و خون کشیدن اجنبان قصه می و آدمیان را به جپه جنگ فرا می خاندند. چندی نگذشته بود که دست به گریبان گذشته های نچندان دور می افتادند. به گذشتگانی که در همین چند سال گذشته به میدان رزم رفتند و مردند کشته شدند و به خاک و خون کشیده شده به گورهای دست جمعی سپرده شدند رحیم به قلب جادو چهره از دور تر مرد دیرین که او را از یاد برده بود انداخت او را میان هزاری دیگر از آن مردگان پیشین نمایان کردند او را به تصویر کشیدند و رحیم به میان آن تصویر آتش گرفت مادرش به نزدیکش بود او هم تصویر را دید و به فراخور دیدنش با عیز و ناله قربان همسر در گذشته رفت بعد با تحکم رو به رحیم گفت تو به اینان را نخوری به میدان جنگ نروی اینان در پی ساختن قبایی برای خود از این پنبهدان برآمده اند رحیم به سیمای پدرش چشم دوخته بود با آنکه گذر تصویر او بر سیمای جعبه جادو کوتاه بود اما رحیم آن تصویر را به قلب سپرد و دید باز هم دید هر بار به نقش و نگارهای بر صورت پدر چشم دوخت و از خود پرسید آیا او هم به مانند همین هموطنان بود؟ آیا او هم به فرهنگ پیشینیان مفتخر بود؟ آیا برای او هم آنقدر خوانده بودند که تعلیم ببیند و آن کند که از او خواستند؟ یعنی او هیچ به جز تعالیم پیشینیان نیندیشید؟ چگونه می توانسته که بیاندیشد؟ چگونه اندیشیده است؟ و در برابر دیگری گلوله چکانده است چگونه به راه همین پیشترها خود را به خاک و خون کشانده هیچ به دنیا نیندیشیده و حتی از وجود من هم با اطلاع نبوده است رحیم مدام به عکس نگاه می کرد. آن تصویر را با هزاری دیگر از تصویرهای مدام بر جعبه جادو از اسرا از مردگان، از معلولین قیاس کرد و باز با خود خواند. ای فرهنگ پیشینیان خوب آموخته این قیاس به خیر را اما این بار نیامده تا او را با دیگری برای برتری دادن قیاس کنم این بار آمدم تا به قیاس او دیگران را تصویر کنم که چگونه داغدار شدند چگونه فرزندان بی پدر مندند. چگونه بی همسر و بی اولاد خوندند. چگونه عمر را سپری کردند و به آخرش چه دانستند از آن جنگ دورترها چه نصیبشان شد از این حماقت ها چه به جهان افسوده شد از این دد ها مادر او را به خدا آورد و ذکر کرد مبادا بی هوا به خیابان بروی اینان برای به دام انداختن جوان ها و بردنشان به جنگ نقش ها دارند بی هوا تو را هم به دام میاندازند و به جنگ میبرند رشته افکار ساخته به ذهن رهین یک بار ریخت و به حرف مادر فکر کرد معنای نهفته در آن چه بود؟ چگونه برخی را به دام انداختند؟ یعنی از دل این تصاویر بودند کسانی که به دام در آمدند؟ بیان بخواهند به میدان رزم برده شدند و بی آن که بدانند به رگبار بسته شدند؟ آیا بی هوایان هم جان دادند؟ اسیر شدند و معلول به خانه بازگشتند؟ یعنی آیا از میان آنان بود کسی که به فرهنگ دیر زمانان فکر نکرده باشد؟ مزق نشده باشد تصاویر یک به یک از برابر دیدگان رحیم میگذشت و همه را قضاوت می کرد برخی را در زوب شدگان دور دست می و برخی را به طله درآمدگان می پنداشت برای هر کدام داستانی می ساخت و به قلبش هر کدام را زنده می کرد تا در محکمه او به سخن بیاید از اجنبان بگوید از جنگ طاقت فرسا از دیوانگی آدمیان، از میدانهای خونین و به آخرش یکی به کلام آمده، در محکمهی به جعبه جادو فریاد زد. هموطنان، باید اجنبان را به خاک پنشانیم. باید آنقدر بجنگیم تا پیروز این میدان باشیم. آنان به بار پیش جنگ ما را تحقیر کردند، باید آنان را تحقیر کنیم. رحیم ما تو مپوت به جعبه جادو چشم دوخته بود و صحبتها را می به دنبال صدای دیگری می به دنبال کسی که فریاد سر سردهد سخن ای بگوید به تقبیه جنگ بپردازد از زشتی جنگ بگوید از طبعاتش از زشتی سلاح از میدان دبرد از دیوانگی ها اما هیچ کس حرف ای نداشت همهی سخنان نشخار پیشینیان بود جماعتی که تا این حد اولا و به مقام پرستش گذشتگان را میستایند، مگر میتوانند حرفی فراتر از آنان و یا به خلاف باور آنان بگویند. آنان هرچه در برابرشان است را پذیرفتند، آنان به آنچه شنیدهاند باور آورده و بر آن گذاشته اند. به طول هزاران سال آن چه از تعالیم پوسیده بود را آموخته با حال باز پس میدهند. رحیم به خاطر آورد اگر فشنگی به خطا قلبی را دریده باشد هزاری به تعالیم پیشترها چیزها خواهند گفت یکی شاکی از کار است یکی او را به بیدانشی محکوم می کند یکی قصه از پسی او میخواند یکی به ام زدنش را فریاد میزند زند و هزاری هرچی از مسمومیت به جان و خونشان مانده را قیم می کند اما هیچ کدام حتی یک بار به صلاح و حضورش نمیتازند بر آن خورده نمیگیرند بر از بین بردنش کمر همت نمیبندند و باز به همان دروس پیشترها با آنکه بسیاری دانسته اشتباه است سهمی گذارند و پیو خوانده میشوند بر مراد تعظیم کرده مریدان به پیش آمده تا آنچه به آنان آموخته اند را باز پس دهند رحیم از جای برخاست و فریاد زد اینان تغییر نمیخواهند مادرش سراسیمه به اون نگاه میکرد با خود گفت نکند اتفاقی برای پسرم افتاده باشد نکند مشاهیرش را از دست دهد و در میان همین استرا بود که رو به فرزند خاند مادر چیزی میخواهی برای خوردن آب خنک برایت بیاورم رحیم در حالی که احساس آتش گرفتن به درون داشت گفت آری آب میخواهم آنقدر آب برایم بیاورد تا هرچه درون است را بشوید نفراتر از من آنقدر آب روان بیاور تا این سرزمین را بشوید و دوباره پدید آورد مادرش در حالی که به سوی آشپسخانه میرفت مدام خود را سرزنش می کرد که فرزندش را چرا از این دیار نبرده است چرا او را از این کشور دور نکرده است شاید دور از این سرای پیر سرایی بهتر و آرام تر بود رحیم در حالی که به جای خود بازگشته بود به چشمان مجریان در جعبه جادو مسلط نگاه کرد و فریادهای آنان را از چشمانشان خواند یکی فریاد میزد به میدان جنگ بیایید و این پس مایگان را بدرید بروید و پایتختشان را به تسخیر درآورید بروید و بردگان و کنیزان به مملکت هموار کنید بروید و بزرگی خود را به همگان نشان دهید یکی از دور ترها فریاد میزد. بروید و قانونی به کشورشان بنگارید تا در آن بر مقام قدسی ما احترام کنند ما را که به خیابان دیدند در برابر من کرنش کنند بروید و جهان را مالک شوید تا همه دنیا در برابرمان به خاک منشیند یکی از دور دستری می گفت باید برای منافع کشور از جان گذشت باید همه چیز را به منافع خود پیوند زد و تنها برای تصاحب آن به میدان بود رحیم فریادهای درگلوماندهٔ آنان را میشنید آنان به زبان آرامتر از آنچه بود میگفتند گهگاه کسی از بینشان فریاد چشم را به فریاد زبان گره میزد و باقی میدانستند او به دل چه پرورانده است حتی اگر آرام هم گفتند همه دانستند و به خانهها فریاد چشم ها را تکرار کردند و رحیم از خود پرسید من اگر این فریادها را شنیدم آیا کسی خواهد بود که آن را نتواند شنیدن فریادها تا به مغز و سخانش رسوخ کرد و دیوانش کرده بود از این رو آب در لیوان به دست مادر را گرفت و همه را یک نفس پایین داد تا آتش درونش ذره‌ای خاک سر شود بعد از آن به سوی اتاق خوابش رفت تا دیگر صدای جعبه جادو را نشنود که همگان را به میدان رزم فرامی تا سور جنگ را به گوش نشنود تا فریات های جنگ و جنگ را نشنود و آرام زرهی بخوابد شاید به رویا دنیایی دورتر از آنان را دید این بار رویا به کابوس بدل شد این بار هر چه آرزوداش به خلاف در برابرش نشست به سینش فرو رفت و دنیا با او کابوسی ساخت که هماغوشیش آن دور پرستان لذت پرند او را به خیابان روزی که پیاده میرفت روزی که با خود سخن میگفت به بحث نشسته بود، هموطن و وطن را می دستگیر کردند. جماعتی در کمین او و چندی دیگر از جوانان هم سن او را به تلن داختند. استدلال در میدان جنگ بودن بود. آنانی که سن واجب برای جنگیدن داشتند، باید که به تحمیل به جنگ رانده می شدند. رحیم هم رانده شد، فرستاده شد و فراخانده شد به درون اتومبیلی که جوانان را شکار میکرد جوانان را به جنگ جو بدل میساخت آرام نشست تعدادی هم و سالش به کنارش بودند هر کدام به دنیای خود غرق ماندند یکی شاد شده بود که دوست داشت به جنگ باشد دوست داشت فریاد بزند ماشه بچکاند، بمب بوم و دیگران و دشمنان و اجنبان را قتل عام کند اگر داوطلبانه نرفته بود به واسطه خانوادهش بود حال چه به مر و چه به آنان. یکی از ترس به خود وامانده بود مدام طلب مغفرت و آمرزش میکرد مدام به دنبال دریچهی برای فرار کردن میجست از مرگ میهراسید از اسیر شدن دیوانه میشد از معلولین نفرت داشت و میخواست هر گونه که شده از این مکافات رهایی یابد. گریه میکرد فریاد میزد و کسی گوشش به نبود یکی در دور دستی آشق بود به یاد معشوقش به جنگ میرفت جنگ او دورتر از این دنیا بود به دست آوردن بود به آغوش کشیدن بود و حال در این اتومبیل به مقصدی برای دور شدن فرا خوانده شده بود دنیایش این دنیای نبود از این دنیا فرسنگها فاصله داشت اما جب در برابرش فریاد میکشید و دست و پا او را به قربانگاه فرا می کدام از آنان نبود. رحیم مات و مپوت. برانده شدنش نگاه میکرد، به فراخوانده شدنش به کین و انتقام به عقده و حسرت به تعالیم دورده از چشم می دوخت. و آنچه از آنان بیزار بود و آنچه جبر برابرش تصویر کرد و او را محکوم به دستان در قل و زنجیر به جپها فرستاد میادین ساختند به آنان آموختند از دیربازی همه را آموختند آنقدر به گوششان خواندند و برایشان رقابت علم کردند تا در این وادی آموخته شوند اما حال زمان آموختن به عمل بود حال زمان نشان دادن برتری به دیگران بود حال زمان آن بود تا دیگران را به خاری می‌کشتند نشان میدادند دادند که دیگران اسیر و بندگان آنانند حال به میدان تیر و شمشیر به آنان درس قتل آموختند به آنان راه درد فرادادند و گفتند بروید و هرچه در برابر بود را به خاری بدرید، بروید و بدرید. تفنگ در دست رحیم و ماشه چکندن بی خیال دیگران بر دیگران دور دست ها این بار شمایلی از دشمن در برابر بود می زدند می دریدند می و لذت می بردند آزمون می شدند، به بهتر دریدن، آموزش داده شدند به بیشتر آزار رساندن و هر روز به این کرسی زشتی آزموده تر شدند اینجا آموزش یگانهای در تله بود گوشتهای قربانی که به چنگ آمده تا به فردایی به میدان مین از جان برای خاک بگذرند تا بروند و کشته شوند. بروند و به آتش کشیده شوند که جانبی ارزش و تمام ارزشها ها به نزد خاک و خون و نجات نهفته بود رهیم دیوان شده به همه سو نگاه می کرد به تفنگ در دستش به فرجام حرکتش به اینکه به فردا چه خواهد کرد به میدان رزم چه خواهد دید به فردا یا موختنها چه باید که پستهد به فردای آموختن دیربازان فریاد لعنون فیلم اجنبان باز اس پس پسادند و حال به فردای آموختن دریدن چه خواهند کرد رهین تفنگ در دستان خیش را باور نداشت نمیدید او را لمس نکرد و به دست نفشرد مربی فریاد زد بچکان ماشه را بچکان هدف در برابر تکان می‌خورد و رهین تفنگ را محکم به دست می‌فشورد. حاضر به چکاندن نشد و آموزگار هموطن دوباره فریاد زد: "جمان کن دشمن در برابر رویت است. جمان کن اگر نه او خواهد چکاند. بروید و بدرید." رهین تفنگ در دست را می‌فشورد و دیوانوار فریاد میزد. چشمانش به عشق خونین دلش آقشته شد و فریاد کشان اسلحه را انداخت و دور شد باز دوید اما نه برای دریدن که برای دور شدن که برای ذره ای از آن نور شدن باز دورش کردند، باز به او آموختند و او به مانند دیربازان که هرچه برایش بافتند افاقه نکرد، همانند دیربازان که هرچه به گوشش خواندند را دیگر تصویر تصویر کرد و دوباره خواند دوباره آموخت، آنچه خود خواسته. این بار هم از آموز شانان هیچ نفهمید و آنچه خیشتن خاص را تفسیر کرد. آموزگاران با مملکت از خاک اجدادی بران بودند که او لایق بودن در لباس رزم هموطنان نیست نمی خواستند به اون میدان دهند و در تدارک باس فرستادن او به نقطه ای در راه تدارکات جنگ بودند اما اتفاقی همه چیز را تغییر داد حمله این ناگهانی از دشمن و اجنب فرماندهان را بران داشت تا از همه استفاده کنند حتی آنها که دوره آموزش را نگذراندند. از این رو بود که فرمانده فریاد زنان رو به جماعت گفت شما از دیربازی همه چیز را آموخته اید وطن را شناخته اید به خاکش بزرگ شده اید و ارزش والای آن را میدانید. تعلیم امروز شما تخصص است که در برابر تعهدتان هیچ و بیمناست بروید و بدرید به آموزش های دیرین تان به آنچه از کودکی آموخته اید به آنچه همه عمر دانسته اید بروید و به راه وطن برای خاک اجدادی بدرید و دریده شوید فرمان جنگ صادر شد همه به پیش رفتند گلوله ها به پیش آمدند و سینه ها را دریدند بوم پاش لیک شد یک به یک بر خاک نشست و خاک را به آسمان داد اگر مادر رهیم بود به یاد خاطره به دنیا آمدنش می‌افتاد او هرچه در توان داشت را انجام داد به همه جا سرک کشید تا خبری از پسرش بجوید به آخرش دانست که او را به میدان جنگ بردند در کمال ناباوری اعلام کردند او با اشتیاق و به میل داوطلبانه به جنگ رفته است مادرش فریاد زد دروغ آنان را به صدای بلند برای دیگران خواند و کسی صدایش را نشنید جماعتی که میشنید به مانند خودش بود و هیچ کس حرف آنان را باور نکرد پس از چندی آنان تنها به لند برخیش ماندند و خود را نفرین کردند که چگونه محافظ دلبندشان نبودند و آنان را به زیر تیخ فرستادند حال تی خواه همه در برابرشان بود به پشت سنگریز ها پنهان شدند و در چشبر هم زدنی موشکها سنگ ریزه ها را شکافت و درون رفت رفت و همه تکه و پاره بر زمین به جا گذاشت مین ها بر پاهای به مانده سلام کردند تیرها در حال شکاف به گفتند خون بر زمین ها جاری شد به زمین افتادند چه بسیار از آنان که آشق بودند که پرترت فریاد می زدند آنان که به حب وطن به میدان آمده بودند آنان که از دیرباز تعلیم دیده بودند همه و همه به گلوله ها به ها و موشک ها، جان به جان به جنازه بر زمین افکندند و در چش برهم زدنی از دنیا رخت بستند رحیم تفنگ را به دست فشار می داد خود را به قلب سنگریزی دف می کرد. میخواست خاک به روی خود بریزد و در چنین فضایی حضور نداشته باشد. توفنگش را به خود میفشرد و مدام فریاد میزد. گاه تفنگ را به دهان میبرد و آن را به ساختی گاز میگرفت. فریادش را به فشار دندهان ها به تو میخورد و باز فریاد میکشید. فشنگها هر از چند گاهی از کنارش میگذشتند و باز جانی را دریده بودند. اما او سری برون نکرد تا از آنان چیزی ببیند هواپیماها به پیش می رفتند تانک ها می ترکندند، سربازان می دویدند و می دریدند آنان دوید و آنان جانها را دریدند و جنگ به پیش رفت و باز رهیم در خود ماند را در دورتر زمانی باز گریبانش را بگیرند فرمانده ها به پیش رفته جماعتی از اجنبان را به بند درآوردند، از سیران دشمن را با دست و پایی به تناب بسته به پیش آوردند و در برابر رحیم به خاک نشاندند او را به درون سنگریزی بردند و اینگونه شد که رحیم معمور نگهداری از اسرا خوانده شد او باید آنان را نگهبانی می کرد تا بعد از بازگشت فرماندهان بازجویی شوند اطلاعاتشان گرفته شود و پس از آن کشته شوند، به گروگان گرفته شوند، معاوزه شوند و فروخته شوند. رحیم با تفنگ در دست تنها جملات فرماندهان را میشنید و هیچ از آن نمیفهمید. آنها مدام تکرار میکردند و به آخرش با حالتی فریادگونه گفتند اگر نتوانستی مهارشان کنی و یا دست به فرار زدند همه را از زیر تیغ بگذران. به هیچ کدامشان رحم نکن و همه را بکش. بعد فرمانده فریاد کشید و صورت را شنیده ای رحیم سر و چشمان از حدقه بیرون زده اش را به زمین دوخت به واسطه ادامه جنگ و صدای تیرباران فرماندهان او را به حال خود رها کردند و به بحث ادامه ندادند رحیم با جماعت اسیران تنها شد تفنگ در دست در حالی که آنان بر خاک مانده بودند به چهره نگاه کرد آنان را ورانداز میکرد از شهرهایشان میگذشت هر سنی به میانشان بود. از کودکی دوازده ساله تا پیرمردی مردی هفتاد ساله، همه را نگاه میکرد و در کسری از ثانیه برای هر کدام داستانی می بافت. برخی زخمی بودند، از درد به خود می نالیدند. برخی اشک می و به آینده نامعلومشان چشم دوخته بودند. برخی با گردنی فراخ به آسمان نگاه می کردند و او همه را می دید، همه را نظاره می کرد و باید که مراقبشان بود نگاه به یاد آورد که او وظیفه نگهبانی از آنان را دارد توفنگ در دست خود را نگاه کرد و به یاد فرمان فرماندهان افتاد آنان که عمری آموختند فرمان دهند و اینان که فهمیدند باید فرمانبردار باشند رحیم به خود خواند من نگهبان آنانم به دوید و آنان را بدرید همه را بکش از زیر تیغ بگذران مگر زندگی آنان در اختیار من است من مالک به جان آنان شدم به یاد شرم دیربازان افتاد به یاد مرور تمام داستان ها به یاد کودکان در رنج به چشمان کودک دوازده ساله در میان آنان چشم، دوخت و رنج هایش را به دل دوره کرد. او را در لباسی به جنگ دید که زخم خون زمین را پوشانده است. او را در حال چکاندن ماشه تصور کرد که عشق میریزد و فریاد میزند. او را به فردایی تصویر کرد که همه شب و روز، کابوس و دردهای امروزش را میبیند. او را به فردایی دید که به راحتی میدرد و میدود. به همه همهشان نگاه کرد و باز خود را دید توفنگ در دستش را دید، روزگار پیشتر و بعدتر را دید و باز به خود خواند چه چیز از خویشتنش را به خاطر دارد. چه چیز از دنیای درونش باقی مانده است؟ این اسلحه از آن اوست؟ این خاک برای اوست ارزش این خاک برابر جان جانداران است؟ نفس نفس میزد با خود گفت: مالکان که از مالکیت خود نمی رنجند از آن بهره میبرند اینها همه بردگان تو هستند بعد از شنیدن آموزه های پیشینیان که در قلب و جان رخنه کرده بود فریاد کشید شرم بر من اگر مالک خوانده شوم اگر مالک بردیگری باشم اگر جان و وجود او را صاحب شوم شرم بر من او او چشم نوخته بودند و حرکاتش را نگاه می کردند. با خود می گفتند که او بیشک دیوانه است. تا کمی بعد همه ایمان را از زیر تیخ خواهد گذراند. برخی با جهان ودا می گفتند. برخی با معشوقانشان سخن می گفتند و همه به اتفاق می دانستند. این پایان عمر آنان است. هنوز مهلتی به آنان داده نشده بود، تا تصمیم و ای برای نابودی رحیم بکشند که رحیم فریاد زد برخیزید، فرار کنید، جانتان را بگیرید و از اینجا دور شوید اجنبان که مخاطب فریادهای او بودن چیزی از کلامش نفهمیده و به یکدیگر چشم دوختند و بعد از چندی به هم گفتند او دیوانه است، شاید به ما بشنام میدهد، شاید برای ما خط و نشان میکشد که رحیم اسلحه را به زمین گذاشت و به سمت آنان دوید. رفت و ریسمان های بر پای و دستشان را باز کرد همه را آزاد کرد فریاد زد دور شوید جانتان را به سلامت ببرید به نزد فرزندانتان بروید آنها را در آغوش گیرید و دیگر به هیچ جنگ وارد نشوید اسیران پا به فرار گذاشته میدویدند و رهین باز ادامه می‌داد، برای هیچ آموزه پیشینیان به میدان رز نیایید برای هیچ به جنگ نروید، کشته نشوید و کسی را ندارید زندگی کنید، زندگی را دوست بدارید رحیم با فریاد در حالی که میچرخید و به دور خودش میگشت تکرار میکرد، نجنگید، نجنگید در همین حال و احوال و از کمی دورتر یکی از فرماندهان او را دید به سرعت فهمید که او اسرا را آزاد کرده است به سمت رحیم هجوم برد و با ضرباتی او را نقش بر زمین کرد فریاد زنان گفت احمق با اسرا چه کردی رحیم در حالی که نقش بر زمین بود گفت نجنگید یکدیگر را ندرید جان والاترین ترین ارزش هاست جان یکدیگر را ندرید فرمانده با حالتی خشمگین و غضبناک او را زیر مشت گرفت و ریسمان را به دست و پایش بست بعد سیگاری روشن کرد و بر پشت رحیم نشست در حالی که از آن پک میزد گفت کاری با تو خواهم کرد که تمام این دیوانگی ها را از یاد ببری تو فرجامی خواهی داشت که همه از آن بگویند به جای تک تک آنان خواهی مرد و دریده خواهی شد رحیم در حالی که با صورت بر زمین افتاده بود و صورتش بر زمین کشیده میشد با صدای خفه شده مدام تکرار می کرد نجنگید و یکدیگر را ندارید فرمانده که صدای فریادهای او را میشنید با اعصابی خراب و وار سیگار را بر پشت سر رحیم خاموش کرد. در حالی که رو به رحیم فریاد می زد می درمت و پارت می کنم به جای تمام آن اسرا تاوان خواهی داد ای رجیم ملعون کاخ اثر نیما سواری بخش پنجم بر روی صندلی آهنی نشسته بود و دستانش از پشت به یکی از پایه ها با دستپند بسته شده بود. صورتش بر روی شانه‌هایش افتاده بود و توان کافی برای استوار نگاه داشتنش نداشت. در همین احوالات بود که بازجو سیگاری بر دستانش خاموش کرد. از شدت سوزش و درد دست به ناگاه به هوش آمد و صورتش را از شانه برداشت و فریاد کشید. بازجو در حالی که سیگار دیگری روشن می کرد انگار صدای فریاد او را اصلا نشنیده است. سوال کرد. برای چه مدت است که با اجنبان کار می کنی؟ چه مدت است که جاسوسی ما را می کنی؟ رحیم در حالی که هنوز از درد دست سوختش فریاد می زد گفت آب، تشنه هستم، کمی آب به من بدهید، همه یه جانم در حال سوختن است بازجو از سندلیه در برابر رحیم برخاست و از پارچه روی میز یک لیوان آب ریخت و به دست گرفت نزدیک صورت رحیم شد و گفت چه مدت است که به وطنت خیانت می کنی رحیم در حالی که دهانش را گشوده بود و خود را به لیوان در دست بازجو نزدیک می کرد گفت ذره‌ای آب بدهید تشنه هستم مرد بازجو شانهای بالا انداخت و در حالی که به سمت صندلیاش باز میگشت لیوان را به فرق سر رحیم کوفت لیوان شکست و محتویاتش که همانا آب بود به سر و صورت رحیم ریخت با کوفته شدن لیوان به سرش قسمتی از پوستش زخمی شد و خون به همراه آب از سر و صورت رحیم به زمین ریخت بازجو فریاد زنان در حالی که در برابر رحیم نشسته بود گفت تو دیگر چه انسانی هستی مگر کسی به سرزمین آبا و اجدادی خود خیانت می کند مگر ممکن است کسی تا این حد بی باشد رَهین ناخداگاه و هیچ تأمل و فکری فریاد زد من بی نیستم ما مفتخاره نیستیم بازجو به صورتش نزدیک شد و با لبخند محفی بر صورت گفت ما البته که دوست دارم از گروهتان بدانم چه مدت است که جاسوسی می کنید؟ اطلاعات را به چه کسی می دهی؟ رابطت در میان اجنبان کیست؟ رجین؟ چه اطلاعاتی به آنها داده ای؟ رحیم به میان حرفش دوید و فریاد زد به آنها گفتم که دیگر نجنگید جان خود را به آغوش کشید و از این میدان دیوانگی بگریزید بازجو دست به زیر صندلی برد و میله آهنی را برون آورد معطلی چند ضربه به سینه و پشت رحیم زد و گفت اراجیف به هم نباف من منتظر اطلاعات کامل و دقیق هستم میخواهم بدانم آنها از چه چیزهایی درباره ما با اطلاع هستند اخبار کامل باید ارائه دهی تازه شاید بتوانیم از تو برای جاسوسی در میان دشمن هم استفاده کنیم میتوانی اطلاعاتی که ما میخواهیم را در اختیار آنان بگذاری. پس بدون اینکه به دنبال زورآزمایی هوش و استعدادت با من باشی، برو سر اصل مطلب. رابطه در میان اجربان کیست؟ رجین. رحیم از ها به خود پیچید و دوباره بیهوش سر بر شانه‌های خیش گذاشت. مرد بازجو بلافاصله پارچه آب را برداشت و به صورتش ریخت به هوش آمد. فریادکنان گفت: رابطه در میان اجربان کیست؟ رجین. رحیم صورتش را بالا آورد و دوباره بیهوش شد. مراسم آین بازجویی به درازای روزهای بلند ادامه داشت. ساعتی رحیم را به حال خود در اتاقی محبوس می کردند. در تنهایی و تاریکی وامی گذاشتند. بلافاصله در انتهای همان روز به بازجویی از او می پرداختند. مرتب شکنجه می شد. کابل به پاهایش می گفتند. درد تا مغز استخانش پیش می رفت. بعد از آن مجبورش می تا با همان پاها و در میان رنج و زخم جسمش راه برود دوباره او را می نشندند و تکرار می شد زمان جاسوسی رابط در میان اجنبان جزیات اطلاعات و هزاری اناوین دیگر به تکرار سوالها و پاسخهای بریده بریده رحیم دوباره شلاق و باتون و ضربه پیاپی ریت به شکنجه ها گهکا حوض می شود. دستگاه‌های پیشرفته جایگزین فنهای پشتیبان میشد رنج به جانش رسوخ میکرد تا مرز مرگ و را میرساندند و دوباره به او حیات میدادند بازی در برابر مرگ گلاویزی با مردن و زنده ماندن رنج تا سرحد بدرود گفتن از جهان و دوباره به هوش آمدن و از هوش رفتن آنقدر در این دادن دادنها تبهر داشتند که كه می میدانستند هر کس وارد این تفتیش شود لب باز خواهد کرد و بی اطلاع دادن بیرون نخواهد رفت اما هرچه بر رحیم تازاندند چیزی نگفت برخی اصرار کردند تا اندازه شکنجه ها را بیشتر کنند شاید هم کردند مثلا در یک روز چندین بار او را به کام مرگ فرستادند برخی گفتند او خالی از هر گونه است و برخی خاندند او فرای جاسوسی خیانتکار به مام میهن است. باید او را به سرعت دادگاهی و اعدام کنیم. فرماندهان استدلال آوردند و به آخرش اتفاق آرایشان آن بود که او را دادگاهی کنند. دادگاه نظامی کمی آنسوتر از جبه های جنگ. رحیم وطنخواه تو به خیانت علیه حکومت، ملت و وطن آبا و اجدادی در میدان جنگ محکوم شده ای. مجازات تو اعدام به تیربار است و حکمت قابل اجراست از مام وطن و بزرگی این خاک آبا و اجدادی طلب مغفرت کن که شاید او تو را آمرزید رحیم به دستانش چشم دوخته بود که به دست بند بود دستانش را آرام آرام بالا آورد و از قرزی پرسید برای طلب مخفرت باید دستانم را رو به آسمان بگیرم؟ صدا و همه ای در دادگاه برپا بود و آنان دادگاه را تمام شده میدانستند و کسی به رحیم نگاه هم نمی کرد رحیم با خود گفت آری حتما برای مغفرت دستها را رو به آسمان باید گرفت و رو به آسمان با صدایی بلند شروع به خواندن کرد نجنگید به میدان دیوانگی نیایید و جان را پاس بدارید نجنگید خون نریزید و ندارید جان دیگران را محترم بشمارید که والاترین ارزشها به نزد آنان است رحیم تون صدایش را بالا می‌برد و بلندتر ادامه می‌داد. که حواس همه دادگاه را به خود جلب کرد همه به او چشم دوخته بودند و شکه به او نگاه می‌کردند. قاضی با صدای فریاد مانند عربده زد این ملعون رجیم را از صحن دادگاه دور کنید ببرید و به جوخه های رگبار بسپاریدش. او دیوانه است. رحیم کماکان داشت میخواند و صدایش را بالا می برد که دوتن سرباز زیر بغلش را گرفتند و از صندلی بلندش گردند. به تنه به او تاختند و گفتند ای راند شده جاسوس. آیا با خود خیال کردی که برای بیداری ابنای بشر برگزیده شده ای؟ آیا خود را پیانبر خانده ای؟ رحیم به لبان آنان چشم دوخته بود و به حرفهایشان گوش سپرد که آرام به گوششان اینگونه خواند؟ آیا به رنج دیگران رنج نمیبرید آیا به زخم تنشان زخم دار نمیشوید یکی از دو سرباز با خنجر بر تفنگش ضربتی به بازوی رحیم زد و در حالی که آرام از زخم به وجود آمده خون می گفت از رنج تو هیچ رنجی نمیبرم ای ملعون رجیم بلافاصله آسین لباسش را بالا داد و به رحیم نشان داد که از زخم او تنش زخم دار نشده است بعد با تلنگولی به سرباز در کنارش گفت نکند تو از رنجه او رنج برده ای. او به رحیم نگاه کرد و سپس رو به دوستش گفت هرگز اما دیگر آزارش نکن. او که به ما کاری ندارد. به ما رنجی نرسانده و مستحق رنج دیدن نیست. سرباز نخستین با اعصابی پریشان ضربتی به پای رحیم زد و او را بر زمین کرد. بعد فریاد کنان رو به سوی دوستش گفت او به وطن من و تو خیانت کرده او جاسوس اجنبان است او خیانتکار به میهن است چه میگویی؟ مشاهیرت را از دست داده ای؟ نکند بیماری او واگیردار باشد نکند تو هم به بیماری او مبتلا شده ای؟ رحیم از روی زمین برخاست و رو به سرباز گفت به یک دیگر آزار نرسانید و هرچه به دلدارید انجام دهید که سعادت در همین امر نهفته است سرباز دیوانه شده بود به سوی رحیم حمله برد و با مشتی بر صورتش او را بر زمین انداخت خواست جنازه بر زمینش را به خون غرق کند که دوستش در برابرش ایستاد او را مانه شد می گفت او که کاری نکرده است چرا اینگونه از کوره در رفته ای؟ مگر چه گفتی که تو اینگونه دیوانه شده ای؟ سرباز فریاد کنان می گفت این دیوانه خیانتکار این بیشرف وطن فروش می خواهد ما را به راه راست هدایت کند. باید خودم او را اعدام کنم باید خودم تیر خلاص را به او بزنم باید خودم او را تکه و پاره کنم رحیم دوباره از زمین برخاست و رو به سرباز گفت به انتهای انتقام و چین ورزی دنیایی چینجو خواهیم ساخت دنیایی که همه به کین و انتقام در خاک و قبرند یا به بند آمدند یا به آتش انتقام در خود می سوزند. سرباز فریاد کنان رو به جماعت سربازان گفت یکی این وطن فروش را از اینجا ببرد و گرنا همین الان خودم اعدامش میکنم ببرید او را از برابر چشمان من دور کنید فرمانده آمد و رحیم را به دست سربازهای دیگری سپرد و سرباز فریاد زنان را نیز توبیخ کرد و رحیم از آنجا دور شد رحیمی که دیگر همه او را رجیم خطاب می کردند نامش ملعون رجیم شده بود همه او را به این اسم می شناختند و هر کس در کنارش می نشست به او ای میزد. برایش رجزی می و به انتقام و چینه تهدیدش می کرد. اما رهیم بسیار آرام بود از خود رازی شده بود با تمام پرسش های گذشتش به مبارزه رفته بود و برای بیشترشان به پاسخ رسیده بود او از ای که در جنگ انجام داد راضی بود و بران می بالید همین رضایت از خی را را تر از گذشته کرد. از خودش خوشش آمده بود. در همین حال و هوا دوست داشت تا چهره خود را در آینه ببیند. به خودش فکر کرد که ریش‌های انبوهی صورتش را پوشانده است. مدت زیادی بود که به اصلاح نرفته بود. به یاد خاطرات گذشتهاش افتاد. به یاد روزهایی که در آینه خود را تصویر می‌کرد. به خود ریش‌های انبوهی میبخشید و با ریش‌های انبوه به ملاقات خود میآمد در چشم برهم زدنی تمام ریش ها را به تیغ میز و دود و حال دلش میخواست یک بار صورت با ریش خود را ببیند. اما افکارش به اینجا خاتمه نیافت و پیش رفت. به یاد مادرش افتاد. او را در برابر ترسیم کرد. در این مدت نتوانسته بود با او هم کلام شود. دلش برایش تنگ شد. او را بی خود تصور کرد. گریه‌هایش را در برابر دید و فریاد گفت تاوان تغییر سختی است باید سخت گوش و سخت جان بود باید به رنج زیست و آن را به فرصت بدل ساخت مادر چهرش در برابر دیدگانش بود اما دیگر زعش های او را ندید دیگر فریادها و ناله را نشنید دیگر او را در لباس عذاب و بعد از مردن خود ندید او را در دنیای تصویر کرد چه نه او همه زنان نفراتر آن، همه انسان ها نه والاتر از آن همه جانها آزاد بودند او را در کنار بیشمارانی تصویر کرد که آزادانه زیستند و به رویای او زندگی کردند خبری به سرعت پیچید و جپه را پر کرد دولت میخواست تمام مجرمان جنگی را به پایتخت ببرد میخواهد دادگاه های علنی تشکیل دهد. میخواهد آنها را که به اعدام محکوم شده اند در پایتخت و در برابر دیدگان هموطنان به دار بیاویزد برنامههای های تازه ای برای اقوای هموطنان به راه بود. دیگر تنها جعبه جادو قدرت وسیع کردن مردم را نداشت. باید که دولت به راه های بیشمار دیگری دست میزد تا همگان را به میدان رزم بکشاند. دولت راه های جدید جذب نیرو میخواست. و حال یکی از راه های تحریک افکار عمومی همین دادگاه ها و اعدام ها در پای تخت بود. رحیم را به همراه دیگرانی به سوی پایتخت تخت بردند بردند تا آنان را در ملعه آم به دار بیاویزند در ملعه آم آنان را دادگاهی کنند بردند تا به هموطنان بفهمانند که وطن چه بیشرفانی را به دل خود جای داده است بردند آنان را تا جماعت بیشتری را تحریک کنند که در این وطن فروشی وطن پاکشان را بپرستند به راه ایمان پیشتر در راه وطن جان دهند برایش بمیرند و بمیرانند. با رسیدن رحیم به پایتخت خبر او به مادرش هم رسید. او هم دانست که فرزندش را به پایتخت آورده تا اعدام کنند. خبر دستگیری همه جنایتکاران جنگی، خائنین، جاسوسان در صدر اخبار جعبه جادو بود و دیدن تصویر و نام رحیم بر پرده جعبه جادو مادر را از این رخداد مطلع کرد. مادری که با هر چه سند و مدرک به خیش داشت به صحن دادگاه کشاند، به نزد وزیران برد، به نزد نظامیان کشاند و او را به میدان رزم برد. مادر رحیم رفت تا به همه بگوید او فرزند یکی از جانباختگان به راه وطن است، رفت تا به همه بگوید آنان دین خود را به وطن پرداختند، پدرش به راه همین خاک جان داده است و فرزندش باید که بتواند در خاک میهن زندگی کند، رفت و فریاد زد، عشق ریخت، التماس کرد و به پای همه والانشینان افتاد. رفت و در برابر همه، در برابر آنان که به نوک هرم این تقسیمات بودند، پای تخت نشین، تحصیل کرده، قدرتمند، ثروتمند سیاستمدار، نظامی، غیره و غیره به خاک نشست. مشتی خاک به دست گرفت و همه را به همان خاک اجدادی قسم داد تا مانع از اعدام رحیم شوند. رفت و فریاد زد که فرزند من مشاهیرش را از دست داده اگر خبتی کرده است از سر جنون آنیه اوست آنقدر رفت و التماس کرد که غزات حکم رحیم را شکستند اعدامش را به حبس ابد بدل کردند و باز مادر بر جای ننشست رفت و فریاد زد رحیم آن آخرین روزها مشاهیر درستی نداشته است رحیم را به صحن دادگاه فرا و به او گفتند تو به میدان جنگ چه کردی؟ رحیم ایستاد و با سینه‌ای تبر گفت به همه گفتم که نجنگند که یکدیگر را ندارند. قضات به یکدیگر چشم دوختند و با هم گفتند او به راستی دیوانه است. آیا تاکنون کسی چنین سخنی گفته است؟ آیا کسی چنین خاصه‌ای داشته است؟ به او گفتند تو به وطنت خیانت کرده‌ای. رحیم گفت وطن من همه جهان است. من به طبیعت و پایداریش مؤمنم. باز غزات به یکدیگر چشم دوختند و گفتند او دیوانه است. مشاهیرش را از دست داده. مادر رحیم می آمد و فریاد کنان می گفت آریو از چندی پیش مشاهیرش را از دست داده بود. مدام صحبت عجیب می کرد و حرف‌هایی میزد می زد که من تا کنون نشنیده بودم. قضات به هم نگاه می و از هم می پرسیدند آیا مشابه حرفایی را که تاکنون زده است شنیده ای؟ می دانستند که تاکنون مثال حرفهای او را نشنیده و این نشنیدن، این تغییر، این تفاوت و این بیمانند بودن معنای دیوانگی است؟ از رحیم هیچگاه نپرسیدند که دیوانه یا نه از دیوانگان که سؤال سلامت خود را نمیپرسند؟ اما هرچه از رحیم پرسیدند او از دریای معرفت تازه باز شده به دنیایش پاسخ گفت هرانچه در این دنیا آموخته بود را به آنان بازگو کرد تا شاید تغییر کنند اما آنان حکم دیوانگی او دادند رحیم نمیدانست او را دیوانه پنداشتند اما مادرش فهمید و شادمان گریه کرد که شو ریخت و فریاد به همه گفت که فرزندش را از زیر تیغ برون آورده است او را آزاد خواهد کرد و او محافظ فرزندش است رحیم هم شادمان بود نه از احکامی که برایش کوتاه می کردند نه از شکست شدن حکم اعدامش که از خود بودنش از آن که هرچه ایمان دارد را به زبان آورده است فراتر از آن به هرچه ایمان دارد عمل کرده است اگر از جنگ بیزار است اگر جنگ را دیوانگی پنداشته به جنگ نماند و ما شیران را نچکاند. کسی را نکشت و به آخرش از ایران را آزاد کرد. همان گونه که به آزادی ایمان داشت. حال به میدان داد فریاد میزند. می, می و کلامش را به حق به پیش میبرد. گردنی که نکرده و در برابر همه ایستاده است. او از خیشتنش از ایمان به خود راضی بود. به خود می و از این بودن در خیش از این ماندن در راه خیش شادمان شد. قضات گردآمده آنقدر حرف های تازه از زبان رحیم شنیدند که این تفاوت را به جنون فهمیدند تغییر را دیوانگی پنداشتند و سرآخرش حکم او را از عبد و زندان طویل مدت به تبعید رساندند رحیم وطنخواه به تبعید نفک بلد از پای تخت به یکی از شهرهای بد آب و هوا و کمسکنه در دور وطن محکوم شده است حکم او قابل اجرا از همکنون است باید به دوردستی فرستاده شود. باید مدام ورود و خروجش مورد بازبینی قرار گیرد در همان شهر بی آب و الف در دوردستان محبوس بماند تا حکم غذاییش در صورت خوشرفتاری بشکند شاید ده سال دیگر، شاید بیست سال دیگر و شاید تا آخر اوم محکوم بماندن در همان دوردست ها شد رحیم در همان ابتدای قرائت حکم پرسید یعنی ساکنان کم جمعیت آن روستا محکوم یعنی آنان به هیچ جرم و جنایتی به بودن در آن دیار بی آب و علف محکوم شده اند. آیا آنان همان چهترین اقوام در سرزمین مادری به حساب می آیند؟ آیا و هزاری سؤال دیگر و باز رهیم باید پاسخها را می جست. حال در طول این مسیر از زندگی به پاسخ بزرگترین پرسشهای خود دست یافته بود؟ او معنای جان و ارزشش را درک کرده بود. او به والاترین ها در جهان دست یافته بود و حال باید برای پیش بردن این هدف والا تلاش می کرد حال دیگر در زندان نبود. به زیر تیغ گردنش را نمی زدند و می توانست در همان صحرای دور دوباره آن کند که به آن باورمند است. دوباره آن باشد که در خیشان آفریده است. دوباره آن چرا باورمند است به زبان آورد؟ و دوباره از خود خوشنود شود مادر او را به آغوش کشید بوسه بارانش کرد دست بر ریش‌های انبوهش برد و اشک ریخت رهین هایش را پاسخ گفت و چشمانش را پاک کرد و آرام به گوشش خواند از تو سپاسگزارم بینهایت از تو سپاسگزارم باید به سوی تغییر حرکت کنم تو هر آنچه داشتی را به من ارزانی دادی دیگر به زندگی خیش برو و از زندگی لذت ببر. زندگی کن و زندگی را دوست بدار مادرش بحت زده به او نگاه کرد و گفت من با تو خواهم بود همراهیت خواهم کرد من با تو به تبعیدگاه خواهم آمد رحیم انگوش بر دهان مادر گذاشت و آرامتر از پیش به گوشش خواند. تو بیشتر از آن چه توانستی برایم کردی از این پس تغییر به دوش من است شاید دیربازی تو نیز خواستی جهان را تغییر دهی انگاه به سویم بیا تا در کنار هم جهان را تغییر دهیم مادر رحیم به او نگاه می و دور شدنش را نظاره می کرد. رحیم انقدر آرام بود که از آرامشش اطرافیان هم از حرکت باز می ایستادند و مادر به جایش خوشک و تنها رفتن او را نظاره کرد جملاتش را مرور گفت و دوباره با خود و همه را تکرار کرد رفت به پیش تا زندگی کند تا زندگی را دوست بدارد و از آن بهره برد و رحیم نیز به همراهی سربازانی به دیار دوردستان به سرزمین تبعیدش راه برد و از پای تخت و والانشینان دور شد رفت به اماق کهترین اقوام به دل سرزمین رفت به دورده از سرین به دل سرزمین رفت تا تغییر را از کوچکترین و دورترین ها آغاز کند رفت تا محکومیتش را بگذراند محکومیتی که او را از والانشینی باز هم دور می کرد والانشینی که داشت از آن دور شود دو سرباز در کنار رحیم نشسته بودند و او را تا رسیدن به سرزمین دور دستها ها مشایعت می کردند یکی به دیگری گفت می او کیست؟ دیگری پاسخ داد آری میدانم. او همان رجیم ملعون است همان خیانتکار جنگی؟ سرباز نخستین گفت: می دانی دیوانه است؟ دیگری پاسخ داد: آری می‌دانم. او حرفهای ما را میشنود نکند از خود نشان دهد. دیوانگان قدرت بسیاری دارند. رحیم حرفهای آنان را میشنید و با شنیدن برخی از کلمات به فکر فرو میرفت این بار زنگ صدای نام رجیم که طولانی مدتی بود آن را شنیده بود در گوشش زنگ میزد از همان روز نخست آزاد کردن اوسرا تا به حال نام او را اینگونه خواندند و در این مدت این رام را شنیده بود و حال دوباره شنیدنش از زبان آن دو سرباز برایش زنگ تازه ای ساخت ناگاه به میان حرف آن دو آمد و گفت نام من رجیم است من رانده شده از دنیای آدمیانم مرا رجیم خطاب کنید. تو سرباز در حالی که ما تو مبهوت او را نگاه می کردند و رو به هم سرتکان می دادند یکی به دیگری گفت به راستی او دیوانه است. هرکس به وطنش خیانت کند دیوانه خواهد شد و جزای رفتارش را خواهد دید. رحیم مدام به دلش می و با خود تکرار می کرد. موضوعاتی را می ساخت و به همه پاسخ می گفت. پرسش های مطرح شده به ذهنش را بالا و پایی می کرد و به سرآخر تمام افکار و پرسش ها و پاسخ ها این گونه خاند. زین پس به دنیایی خواهید بود که همه جهان و طبیعتش وطنتان شود. اولویتتان انبات، فرزندانتان، حیوان و باید این خانواده را پاسداش کنید. زین پس همه جانها هم جانتان خواهند بود و هیچ تقسیمی به دنیایتان نخواهد ماند. زین پس همه دنیا را تغییر خواهید داد از کوچکترین و دورترین نقاط جهان تا با شکوهترین و بزرگترین گوشه دنیا همه تغییر خواهند کرد رحیم این را میخواند و بر آن می‌افسود. سربازان صدایش را میشنیدند و حرفهایش را دوره میکردند گاه او را به دیوانگی متهم و گاه به حرفهایش ریز میشدند و آخر آنجا که او را به روستای دور افتاده رساندند یکی از آنان رو به رحیم گفت رجیم رانده شده مواظب جانت باش رحیم به او با لبخندی پاسخ گفت و به آغوشش گرفت آنها او را تحویل دادند و از روستای دور افتاده دور شدند و رحیم زندگی تازهش را آغاز کرد به تبعیدی در سرزمین مادری به دور افتاده ترین روستاهایش کتاب کاخ اثر نیما بخش ششم صحرا و کپرها چادرها در گوشه گوشه بیاوان به چشم میخورد و رجیم از میانشان عبور می کند. مردمی که از میان کپرها بیرون آمدند به او نگاه می کنند و با دست او را به هم نشان می دهند. یکی می گوید می دانی او را به چه جرمی به اینجا راندند. دیگری به وجد آمده و به سرعت پاسخ می گوید آری او جنایتکار است. جنایتکار به میهن، به وطن، به خاک آبا و اجدادی او جنایتکار و کار است. یکی از روستاییان فریاد میگوید می گوید نام تو چیست؟ رحیم در حالی که سر به پایین دارد و به راهش ادامه می با صدایی نسبتاً بلند می گوید رجیم همه نامش را میشنوند و تلحلوه صدایش در تمام بیابان میپیچد. رجیم رانده شده مل اون جماعتی به پیش آمده تا او را لعن گویند تا به او پرخاش کنند تا او را برانند تا او را از خاک اجدادی دور کنند ای لعن شده ای خیانتکار ای دور ماند از اصالت و هویت خیش ای بیوطن از خاک اجدادی ما دور شو تو با وجودت این خاک را به فساد می کشانی تو با حضورت جوانان را از راه به در خواهی کرد تو عرضشها را نابود خواهی کرد و ما را به تباهی خواهی کشاند ای رجی مرانده شده از دیار ما دور شو این خاک را به درود بگو که این خاک اجدادی سرای خیانتکاران نیست خیانتکاران را به خود جای نمی دهد. این سرزمین مادری فرزندی می خواهد که از جانش برای ذره زر ذره این خاک بگذرد که جان برکف در برابر اجنبان بیستد یکی فریاد زد میدانید او در جنگ به هموطنان خیش خیانت کرده است رحیم همه را می و باز آرام از کنارشان می گذشت. چیزی برای گفتن نداشت تمام سخنانش را در طول مسیر گفته بود و حال در افکارش خوطه میخورد. شاید به کلی صدای آنان را هم نمیشنید شاید میشنید و از کنارشان میگذشت و شاید با شنیدنش ذره ذره آب میشد. اما هرچه بود چیزی برای گفتن نداشت و با سکوت از کنار مردمان میگذشت. دیگری فریاد زد او خیانتکار به مام میهن است او باعث شکست ما در جنگ شده است. او به هموطنان خود خیانت کرده است دیگری از دورتری فریاد زد چرا رانده شدگان را به دیار ما میفرستند. مگر ما از رانده شدگانیم رحیم از شنیدن جملات آنان به خود آمد و ایستاد آنگاه دست را رو به آسمان بلند کرد و با صدایی رسا گفت ما به تقلیل عقل از خیشتن من رانده شده و آری همه ما از رانده شدگانیم آنجا که عقل را زایل کرده و بر هیچ پا می فشاریم آنگاه که ارزش‌های های دور دستان را بیمدد از عقل و دانشمان از مرتبت خیش رانده شده ایم. جوانی از میان روستاییان فریاد کنان گفت بیایید رانده شدگان برایتان ناجی فرستادند شما از رانده شدگانید و پاداشتان به بودن در این خاک همین تحفه از دور دست هاست. بیایی تا خیانتکاران شما را انذار کنند بیایی تا به شما بگویند که شما از رانده به طبعیت از او دیگری فریاد زنان گفت ای hey, خیانتکار زن آزاده همین راه در برابرمان مانده است که تو ناجی و انظار کننده ما باشی تویی که از وطن و وطن هیچ نمی دانی رحیم با صدایی که مرتب اوج می گرفت و بالا می رفت رو به روستایان گفت همه ما از راند شدگانیم باید که خیشتن را دوباره بسازیم باید که از نو سرآغاز شویم باید که جان را دوباره پدید آوریم رحیم بر تنین صدایش می افسود و ادامه میداد داد که فریادهای سرکش یکی از جوانان روستا صدای او را در خود محو کرد جوان اینگونه خطاب به رحیم گفت ای مل اون رانده شده ما همتای تو نیستیم و ما بر وطن خیش سر میساییم ما در این خاک اجدادی زاده شده و به شش جان می دهیم. تو از ما نیستی و تو از خیانتکارانی بعد از گفتن این خطابه بود که سنگی از زمین برداشت و به سوی رحیم پرتاب کرد سنگ پیش رفت و پیشانی رحیم را شکافت رخ صورتش با ضربت سنگ به پایین افتاد خون بر زمین جاری شد خاک اجدادی به خون او آغشته گشت و زمین هفت گشت تا به خون او بجوشد و با سیراب شوند آنان که به خون زندند تمام خون خارجان جهان چه بسا بیشتر آنان که نام آدمی بر خود نهادند به ضربت او شوق بر جماعت روسایان مصولی شد و دیگرانی سنگها را برداشتند به سوی او پرتاب کردند و رجم کردند آنان که خیانتکار پنداشتند سنگ ها صورت او را می شکاف به بدنش را سوخ می جرد. جانش را در مینوردید و خونش را به زمین می ریخ. اما رهیم بر جایش و سواری ایستاده بود با خود می این پاسخ زنده بودن است این پاسخ به ایستادن است این پاسخ به تغییر است تغییر را باید که ساخت جهان را باید که ساخت وطن را باید که پدید آورد و در میان همین کلامش بود که خواند باید که بود و جنگید باید ایستادگی کرد و نفس کشید راه را به عقب برگرداند و آرام آرام از آنجا دور شد روسایان که از همین پیشتر سنگها را با خود آورده بودند آمده بودند تا رانده شده را رجم کنند آمده بودند که نامش را به عملشان بست دهند رجیم را رجم کنند و رجم را رحیم خوانند سنگ هایشان پس از چندی تمام شد و یکی فریاد زنان گفت رانده شده را سنگ باران کردیم رجیم را رجم کردیم تا بداند که خیانت به مام وطن تاوان دارد به میان ما آمدن به تبعید رفتن پاسخ ددمنشی نابکاران نیست هرگاه به روستا بازگردی رجم خواهی شد ای مل اون رانده شده رحیم در حالی که خون از سر و صورتش بر زمین میریخت، آرام آرام از صحنه دور شد و بلند بلند خواند باید که تغییر دید. باید که یستادگی کرد. باید که جهان دیگری ساخت. باید برای جهانی که لایق زیستن است از جان نیز گذشت. او می گفت و کلامش را روسایا می شنیدند. هر کدام چیزی می گفتند. یکی از سماجت او به سطوح آمده بود. برخی نقشه کشتنش را میکشیدند برخی از بودن او در سرزمین مادری و خاک اجرادی خود کلافه بودند برخی خیشتن را با تبعیدی میسنجیدند و با خود می که خیشتنشان از همان تبعیدی هستند برخی باور داشتند که بیگناه با عشق به وطن از همان دیربازان به تبعید رانده شدند و هر کدام چیزی گفتند لین از سرزمین مادری ما دور شد رانده شده به خانه ما باز نگرد رجیم به دورتر از این خانه منزل کن تا هوایی که ما در آن نفس میکشیم را به انجاس نکشانی رحیم همه را میشنید و آرام آرام به راهش ادامه میداد. او را نجس خاندند حالو به مرتبت اجنبان رسیده بود آنان را بی هیچ کرده نتجس پنداشتند و اینان را بی هیچ کرده تبعید کردند و او را به گفتار و کرده هایش که نظم آنان را به چالش کشید به تبعید بردند و نجس خواندند و حال او بود که فارغ از تمام روی دادها دور از تمام آنچه دنیای آنان و اینان بود دور شد و به راهش ادامه داد رفت و خیشتن را به دور دستری به میان صحرا رساند رفت و غبار را به روی دید باد خاک را به آسمان می برد و به صورتش می پاشند. به زخمهایش مینشست و باز راه می‌رفت. رفت و ادامه داد تا سرانجامش گخمه میان صحرا دید سنگریز بود به میان همان سنگریز های جنگیدن رفت و در میان سنگریز باز جنگ دید باز خوندید باز به طمع و حسد به دیوانگی و جنون به بیشتر خواستن به بیشتر داشتن به جان هم افتادند باز کشتند و بر جنازه ها آتش کشودند باز آسمان خونین شد سرخون همه زشتی آدمیان را به روی هم گشود و باز آتش بارید نه این بار از آسمان آبی که از آسمان سرخون ساخته به جهان آدمیان کودکان به جنگ بودند یکدیگر را می داریدند. یکی در دورتری فریاد زد بروید و بدرید رحیم همه را دید و فریادهای به درونش را به سینه خورد آتش به میانه بود یکی فریاد سوخت و خاکستر شد دیگری می و می دوید یکی دوید و به سوی دیگری با شمشیر با نیزه با چوب با باتوم و با هرچه از دیربازان و دوربازان ساخته بود درید به دور دستی برو خاندند به دوید و بدرید هرچه در برابر بود را می دریدند و هرچه در برابرشان ایستادگی کرد را دریدند و به پیش رفتند به طمع همه چیز را از آن خود کردند کشور گشودند، پایتخت به آتش کشیدند، محاصره کردند، منجنیخ ساختند، آتش باران بود، سنگ ساران بود، آتش میریخت و خاک سر می کرد، هر چه ساخته بود را از بین بردند و باز به نام خود ساختند، باز توپ آمد، همه را سوزاند و باز سوخت و باز نابود کرد هر که ایستاد محکوم به مرگ شد محکوم به درد ماند و باز همه را از میان بردند به طمع خوردند و به دیوانگی به اسارت بردند مرز ها بود و تغییر کرد اضافه شد، به خون کم شد، باز افسوده شد و باز کم شد رحیم خونش به زمین میریخت و به خون هزاری مرز ها تغییر کرد باز دگرگون شد و هر بار مرز تازه‌ای به پیش آمد هر ایستادگی به مرگ پاسخ شد رهیم ایستاد فریاد زد ندارید یکدیگر را ندارید به جان یکدیگر ارزش نهید و آن را پاس بداری ها از آسمان به رویش بارید رجم شد رجیم شد نجس شد و باز به تو پتان و مسلسل بستند همه را کشتند و همه را به اسارت کشیدند رهیم فریاد زد برخیزید فرار کنید برخیزید و جانهایتان را به در برید دیگر به جنگ نیایید جان یکدیگر را ندری سنگ ها به پیشانیش خورد. سنگ ریزه در برابر به بومبفکنی نابود و از میان رفت در دلش جنازه های بسیار بود در خون غرق بودند دست های بریده در گوشتا گوش سهرا مردان بیپاه زنان بیپستان کودکان بی لبخند، اشک ها جاری شد و خونها زمین را فرا گرفت و باز مرز ها تغییر کرد دوباره مرز تازه‌ای پدید آمد و همه چیز را از اول دگرگون ساخت و باز جبر به میانه بود. باز جنگ فرمان رانده و باز زیوانگی عقل را زایل کرد و هیچ نداشتند جماعتی که ناقص العقل بودند. رحیم فریاد زد. ای کاش عقل داشتیم و ناقص العقل نبودیم. بیداشتنش به غریزه بهتر میزیستیم و حال به نقصانش چه به روزگارمان آمده است. رحیم به تب میسوخت، در میان همان سنگریز آرام گرفت و بر زمین نشست. از زخم‌هایش خون می‌ریخت، زمین را می پوشاند و نقش میساخت. مرزها را شکل می‌داد و هر بار شکل تازه‌ای پدید می‌آورد. نقش خروسی بر زمین، قربایی در آسمان. چکمه ای در فضا و باز نقش داد و نقش ساخت. رهین چشمانش را میبست، دوباره باز میکرد. به تبود و زخم هایش میسوخت. خونش کماکان به زمین میریخت. سنگ های سنگین به دستانش خورده بود. پاهایش را دردمند کرده بود و حال که بدنش سردتر از پیش شده نمیتوانست خیشتن را تکان دهد. نمیتوانست حرکتی کند، اما چشمانش میدید. چشمانش در خواب و رویا، در تب و کابوس، در خیال و آرزو، هر آنچه میخواست را میدید خودش میساخت، خودش میپرداخت و خودش ادامه میداد هرچه خواست را دید و تصویر کرد دید که چگونه همه از ذرهای برآمدند، همه از ریشهی پدیدار شدند و دید که پر گرفتند افسون شدند و جهان را پر کردند دید که جهان را پوشاندند جهان در برابرشان بود از دور دستانی بود زندگی اطامی کرد در خود زنده بود و دیگری را جان می بخشید. جانها پدیدار شدند آمدند و جهان را ساختند بن خوستگامش درخت پدید آمد آمد تا جان جانان جهان لقب گیرد آمد که از حضورش همه را جان بخشد آمد تا به مانند زمین زمانه بسازد آرام بود هیچ نمی گفت، خیرت نمیکرد اما جان بود، آنقدر جان و جان بخش که مادر زمین لقب گرفت، او والد شد خیشتن را صاحب و مالک نخواند که مالک بودن را نمی شناخت، او تنها والد شد آمد تا تیمار کند، آمد تا جان ببخشاید، آمد تا در برابر زشتی نگهدار و نگهبان جانان شود آرام بران چه پدید آورده بود پاسبان شد و جهان را دربر گرفت چندی نگذشت که جانان جهان پدید آمدند آمدند تا جهان را زندگی بخشند آمدند تا به جان در جهان زندگی کنند مادر به یادشان بود هوا را برایشان تصفیه کرد به آنان جان ارزانی داد و بازگاه وارش را به رویشان باز کرد جانان به جانش رمیدند از جانش خوردند و آرام شدند به هوایش نفس کشیدند و باز چه آرام درخت همه را به خود جان داد همه را پاسوان شد همه را رهدار ماند و همه را از خود جان بخشید جانان جهان را در نوردیدند زنده ماندند و بیشتر و بیشتر شدند بقا کردند و بقا را پیش بردند اما بقا و زنده ماندن و قریزه زیستن آنان را دور از جان بخشیدن کرد و جهان به آنان خواند بدوید و بدرید وای که دویدند وای که دریدند وای که دیوانگی پدیدار شد به میانشان دیگری هم پدید آمد به میانشان همتایی از آنان پدیدار شد یکی از همان گونه ها یکی از هم آنان که جان بود و همتای آنان ارزش داشت اما او به مانند دیگران نشد به مانند دیگران پیش نرفت و رهیم ناگاه از خواب برخاست. بیدار بود خوابش برده بود کابوس میدید. رویای دربرابر در برابر بود نمی دانستنها فریاد زد ندارید جان یکدیگر را نگیرید و ندارید دوباره چشمانش باز و بسته دید، دوباره همه را به چشم نظاره کرد. به دل دید و دوباره همه را دوره کرد. آنچه از پیش در دیده بود، آنچه از دور دستها ها در خیشتن خوانده بود، آنچه او را بیدار کرده بود، آنچه به او این رحیم شدن را عطا کرده بود. آنچه به دیدن گلی و رویدن سبزی به پرواز پرنده‌ای به جست و خیز عطا خواهد شد. لیک چشم بسیرت خواهد خواست لیک دل عاشق طلب خواهد کرد لیک جان بودن را خواهد خواند. آنچه را که همه خواهند دید، آنچه را که همه باید دید و آنچه را که همه میتواند دید او دیده بود در دور دستی دیده بود از میان همان بازیهای های کودکی دیده بود آنگاه که اولین بار پرواز پروانه ای را دیده بود آنگاه که اولین بار درختی را به آغوش کشیده بود. آنگاه که اولین بار جستن سگی را به تماشا نشسته بود. آنگاه که اولین بار بوسه بر پیشانی گربه ای زده بود. همه را دیده بود. همه را فهمیده بود و همه را خوانده بود. اما فریادش به روز جنگ به پیش آمد. دوستاش به میان کودکی آنجا که جانی را به ظلمت بردند آنجا که به تحقیر او را خوشاندند فریاد میزد اما فریادش نارسا بود شاید که به دیربازان هم نارسا بود لیک فریاد فریاد جان بود آنچه همه توان دیدنش دارند آنچه همه خواهند دید و آنچه باید ببینند آنچه زیبایی و جان است آنچه یگان ارزش دنیاست، آنچه آزار نرساندن به دیگران است رهیم به خواب و بیداری به رویا و کابوس فریاد زد یکدیگر را ندارید فریاد زد ای کاش به همان روز کودکی برابرشان ایستاده بودم ای کاش آنجا که کاغذ بر دروازه های را دیدم فریاد می کشیدم کاغذ را پاره می کردم همه را به خیشتنشان به جان بودنشان فرا می خاندم. ای کاش از همان روز مبلغ باور جانشان بودم دوباره در حالی که عرق میریخت، در حالی که زخمهایش متورم شده بود میسوخت و زربان میزد فریاد زد ندارید جان دیگران را ندارید آزار نکنید به غریزه پیش رفتند و دویدند تا بدرند اما جان تازه که به خرد پیش آمده بود دنیای آی را دگرگون ساخت خرد را به غریزه درامیخت درامیخت و آن را تمنا کرد از عقل که غریزهش میخواست رهین فریاد زد ای کاش کسی از دور دستان برخواسته بود و فریاد میکشید خرد را به جانتان پیوند زنید به مهرتان درامیزید و باوری پدید آورید که برابر غریزهتان تان بیستد. برابر هر چه زشتیست است ای کاش ایستاده بودید. ای کاش فریاد می زدید. ای کاش در برابر زشتی ایستاده بودید. چه زشتی به غریزه بود و چه زشتی به طبیعت خانده شده بود. لیشان به کابوس و رویا به الهام بر جان رحیمان کردند که به دنیا کرده بودند. به غریز درامیختند و خرد را به حسر بقا در آوردند درامیختند و همه را به اسارت بردند عقل را زایل خواندند و همه چیز را به زشتی بردند همان فریاد دریدن را به عقل راندند و به مغز خواندند و به پیش رفتند تا بدرند تا مالک شوند اما نه هم تای دیگر جانان که به مدد از عقل که به مدد از عقل زایل شده آن کردند که دیوانگی بود آن کردند که خلاف مهر بود آن کردند که خلاف جان بود وای که چه کردند وای که چه به روز همه آوردند همه را به هشت کشیدند همه را در بند سراستن بریدند وای که چه کردند وای در این دیوانگی از یکدیگر پیشی گرفتند و به پیش رفتند روزی از برای بقا جان دیگران را به دام انداختند و به مدد از خرد در حصر بقا خرد در زنجیر به قریزه کشتند و سوزاندند خوردند و به خون قسط گردند تااهر شدند و دیوانه تر از پیش بر آنچه داشتند بالیدند اسارت بر پا شد همه را به استثمار بردند و در آن پیشی گرفتند بقا فریاد زد غریزه بر آنان خواند حریمتان را دریابید برایشان قلمرو ساخت و عقرب را به مدد از غریزه در خیش به هست درآوردند تا بیشتر در این دیوانگی خوت بخورند ارتشا پدید آمد به پیش رفت تا قلم رو افسون شود هیچ از جان به یادشان نبود هیچ از والد به خاطرشان نماند و هیچ ندانستند که چه به روزشان آمده است تنها در دیوانگی ساخته در خرد و غریزه در هم آمیخته آن کردند که دیوانگی بود. کشتند و مرس ها را ساختند. به هست در آوردند و چپاول کردند. هر بار باوری پدید آمد که آمیخته به غریزه بود و خرد زایل شده را به طلب خواندند تا به باور منحوتشان رنگ و بوی حقانیت بخشند. پس باز آن کردند که در دل دیوانگی منزل داشت باز کشتند و سرمست از کردهشان به یکدیگر فخر فروختند غریزه بر آنان فرمان خواند که برتریتان زنده خواهد ماند زندگی خواهد کرد پس باز به پیش بردند و در این برتری جویی دنیا را آن کردند که دیوانگی بود رهیم که در تب می‌سوخت فریاد زد بدرید، باورهای پوسکیده ایتان را بدرید، از نو سراغاز شوید، دوباره پدید آید و این بار جان شوید، جان انگارید و در این ارزش پیش روید هر بار که جمله ای می از روی سنگریز برمیخواست و مینشست بعد از گفتنش دوباره به روی سنگریز میافتاد و به کابوس و رویایش باز می گشت. آنان در این ارزش‌های ساخته به مدد از خرد مانده در غریزه آنقدر پیش رفتند که همه را استثمار کنند که همه را به بند درآورند همه را آزار دهند همه را بکشند و بقای خیش را تضمین کنند آنقدر پیش رفتند تا دیوانگی ارزشی در جهانشان شد که هر کس در برابری ساد دیوان خطاب شد کسی از دور فریاد زد یکایک را ندارید به جوخه های دار نسپارید او را به دارا ویختند او که فریاد ندریدن سرداده بود یکی فریاد زد جان یکایک را ندارید و از گوشت و جنازه یکدیگر تلاول نکنید او را به بند درآوردند و بعد از کشتنش جنازه را به دندان کشیدند دیوانگی عرضه شد و هر کس در برابر دیوانگی ها ایستاد دیوانه خطاب شد وای که دیوانگی داد شد عدل شد ارزش خوانده شد و این گونه به تباهی رفتند جماعتی که خرد را زایل کردند رحیم و رجیم مانده در جانش همه را دید از دور دستان هر چیز را به مهر خیشتن دید آخر او از والدش آموخته بود آخر به او خوانده بود درخت پیر که جان والاترین ارزش هاست آخر او دیده بود که چگونه جان می بخشد. آنگاه که به سایه بود آنگاه که با او آرام شده بود سر به پایش داشت بر او خواند من مادر تو هستم تو جان منی من به تو جان میبخشم تو باید که جانانم را پاسوان باشی تو فرزند خلف من بر جهانی تو به عقل بر جهان آمده ای و باید به عقل در برابر هر آنچه نافی ارزش جان است بی‌عیسی تو باید در برابر آنچه بقا خوانده است آنچه غریزه گفته است بی‌عیسی تو باید هر چه زشتی و آزار بر دیگران است را نفع کنی باید یگان ارزش بالای جهان را درک کنی و باید برای همه گیر شدنش فریاد بزنی و تا آخرین نفس به ایسی همه را والد به جانش خواند و او را فرزند خلف خود نام داد حال این فرزند خلف بیشمار کودکانی دارد بیشمار فرزندانش از همه جانان به او چشم دوختند به او چشم دوخت تا جهانی لایق جان پدید آورد همه از حیوان هیجان. انسان، انبات، همه که جانند به او چشم دوختند تا جهانی لایق زیستن پدید آورد از آن دیربازان هرچه آموخت به مهر و دلش فرا گرفت به جان و جان بودنش درک کرد و اینگونه شد که حال باز به یاد کودک اجنبان که مفت خاره خطاب شد فریاد زد همه جانیم و والا، همه هم ارزش و یکسانیم جان او را به جان خود بخوانید، او را پاسدار باشید که همجانان جانان باید که جهان زیبایی پدید آورند همه را رحیم در خود دید و همه را به خیش خواند و این گونه بود که در جنگ دست به فشنگ نبرد و ماشران نچکاند جان را زایل نکرد و بالاترین ارزش بودن را پاس داشت آمد تا اسرا را آزاد کند آمد تا همه را از بند حماقت ها آمد تا فریاد بزند ندارید جان یکدیگر را ندارید و افکار پوسیده و خرد زایل شده را بدارید که از نو سر آغاز شود رحیم به تب می سوخت و زخمایش از خون بند آمده بود تبش را به وجش باد که آمده بود تا جان او را در گیرد کوتاه کرد آرام شد نسیم برایش لالا خواند و صحرای بی آب و علف گفت بمانند ما نشوید که بیجان بودن جهان قهر این گونه در تنهایی است آرام تر میشد سالم تر میشد که همه آمده بودند تا او را دوباره احیا کنند تا زخمهایش را التیام بخشند او باید که زخم جهان را التیام میبخشید. رحیم با تبی فروکش کرده در حالی که نسیم به صورتش میوزید برخاست و گفت آمدم تا جهانی لایق زیستن بسازم آمدم تا هیجان را نگهبان جان جهان بدارم آمدم تا به والد بودن طبیعت و درختان سوگند یاد کنم تا حافظ جان همه فرزندانش باشم همه فرزند خاکی باشیم به وسعت تمام جهان که جان انگاشت شده است. آمدم تا جان را احیا کنم. تا یگان ارزش بخانم آمدم تا در برابر آزار جانان جهان بیستم و آمدم تا دوباره انسان را بسازم. انسان تازهی پدید آورم که خیشتن را فرزند جهان حافظ تمام جانها بپندارد آمدم تا در برابر هر چیز به بقا و ارزش، به غریزه و باور به ایستم و آمدم تا عقل را به مهر پیوند به جان آویخته بارور کنم، آمده تا جهانی لایق جانهای جهان بسازم. ندوید و ندرید و جان را پاس بدارید که یگان ارزش جهان ماست. دوباره به فضای پیرامونش چشم دوخت در دور دستری جماعت انسانها همان جانان جهان را دید همانان که خیشتن را هموطن پنداشتند همانان که رج می کنند راند شدگان را همانان که تغییر را دیوانگی پنداشتند همه را دید و با خود خواند، فردا نخستین روز ابلاغ به آنان است از فردا باید که به تغییر جهان کوشا باشم. باید که جهان را از نو ساخت. باید که انسان را از نو آفرید. باید که عرضش ها را دگرگون کرد. وای که چه کار عظیمی به پیش روست. وای که از پندار آنان ما دیوانه ایم. وای که هر کس در برابرشان به ایستد را به چوب و سنگ میرانند. وای که آنان بر این عرضش ها تسخیر شده اند. ماسخ شدگان، رام شدگان و اقوا شدگان بر باورهای گذشتگان هست. وای که از دیوان خطاب شدنش هر کس باری خود را دیوان پنداشته است. اما ایمان به دور دستی زیبا و لایق زیستن جانها آنقدر نیرو خواهد داد که از جان و جهان بگذرین. تا به ایستیم، بمیریم، تا اگر شده یک تن را دگرگون کنیم که شاید به فردا آن یک هزاری شد و هزاری همه جهان را دربر گرفت که این بار نه به تحمیل و جبر، نه به خون و انتقام، نه به کشینه و دیوانگی که به جان همغسن شویم و جهان را از نو سرآغاز کنیم و انسان تازهی را پدید آوریم کتاب کاخ، اثر نیما شه بخش هفتم صبح بعد از دیدن تمام رویاها ها و کابوس ها رحیم به سوی روستاییان بازگشت. رفت تا هزاران سال کسی نکرده بود را انجام دهد. رفت تا آدمیان را به مهر در خیشتن فرا بخاند. رفت تا آنان را به خرد در گروی جانشان پیوند دهد. رفت تا آنان را به آین جاننگاری و آزادی فرا بخاند رفت و در خیش نماند او خیشتن را مبلغ راهی دانست که باید از پیشترها به آدمیان در بابش گفته می شود. باید آنان را از دیر به این راه فرا می خاندند و اگر این گونه بود جهان لایقتری برای زیستن ساخته بودند اما دریغا که کسی انظار کننده از آزار دیگران به میان نیامد کسی آنان را به آزادی فرا نخاند و کسی پاستار جان دیگران نشد. هر کس آمد به میان تا طریقت پیشینیان را دگرگون سازد. بر همان اصول دیر بازان پا فشارد و به تغییر کوچک و قانع گشت. به تغییر بنیات ها نپرداخت و به مساف ریشه ها نرفت. برخی آمدند و از برای جاه و مقام هر آنچه گفتند که به سود دنیای خودشان بود. برخی آمدند و پر از اینان گفتند که انتقام را تدایی کنند برخی آمدند و به صودهای آن کردند که از آنان طلب می شد. برخی در اسارت شهفتان کردند که ارزای غریزه بود و هر که هرچه گفت و کرد به پیش برد راه پیشینیان به حسر غریزه و به طعم بقا چیره گشت اما حال رحیم آمده بود تا تغییر را فریاد کند آمده بود تا انسان را دیگرگون کند آمده بود تا انسان تازه‌ای پدید آورد هیچ مرزی برابرش نبود هرچه مرز ساختند هرچه برای عبور به خطکشی انگاشتند را در نبردید هرچه ارزش خواندند را اگر برابر جان و آزادی بود از میان برداشت و به پیش رفت در گروی هیچ تن سر نداشت به راه هیچ کس مومن نبود آمد تا خرد را به مهر پیوند زند آمد تا ارزش جان را به همگان بیاموزد آرام از دل صحرا گذشت و به آبادی آدمیان نزدیک میشد. از دورتری او را دیدند و به استقبالش شتافدند فریاد زدند ملعون رجیم رانده شده به آبادی بازگشته است بیایید و به سنگهای داغ میهمانش کنید. مردمان از دور دست ها سنگهای آماده را برداشتند و به سوی رحیم شتافتند رحیم در برابرشان ایشاد و آرام شروع به سخنگفتن کرد. آدمیان آمدم تا کار کنم. آمدم تا به مانند دیگران به آبادی روسایان کوشا باشم. آمدم تا به مفتخاری متهم نشوم. من نیز چون شما جانم و برای گذران زندگی نیازمند خوردن و آشامیدن. به من کار دهید و بدانید که به کار کردن میتوان جهان را دگرگون ساخت. یکی از جوانان روستا فریاد کنن گفت تو لایق زیستن به میان دیگران نیستی تو باید از گرستگی تلف شوی تو آمده تا در این دیار مجازات شوی دیگرانی به پشبانی از او فریاد زدند تو لایق زیستن نیستی از ما طلب کار میکنی؟ رحیم در حالی که سرش را آرام آرام تکان میداد گفت میدانم آنچه گفتهی حقیقت است لیک بیکار ماندنم تباهی است نابودی است مرا به کار ساختن و آبادی دیارتان بگماری تا زنده باشم و نفس بکشم یکی از جوانان تندخوی صحرا فریادکنان گفت برو و بمیر پس از گفتنش سنگی را بلند کرد و به سوی او انداخت سنگ به رحیم نخورد و دیگران مجاب به کوفتن سنگ به جانش نشدند رحیم در حالی که به روسایا نزدیک میشد گفت بگذارید تا به کنارتان بمانم بگذارید تا سخنان یکدیگر را بشنویم شاید که از این گفتنها دنیایمان تغییر کرد شاید از هم آموختیم و به تجارب به یکدیگر دنیای بهتری ساختیم یکی فریاد کنن گفت اگر جانت را دوستداری از اینجا دور شو و دیگر به روستا باز نگرد که این بار حقا کشته خواهی شد بعد از گفتن خطابه سنگی به سوی رحیم پرتاب کرد و این بار سنگ به دستش اصابت کرد. به پشتبانی از او چند تن دیگر سنگ بارانش کردند. اما همه روستاییان مجاب به سنگسار دوباره او نشدند و رحیم راه بیابان را به پیش گرفت. از روستاییان دور شد. در میان رفتنش روستاییان فریاد زدند. مل اون دور شو به دیار مادری ما باز نگرد. ایرانده شد دیگر به این خاک پا نگذار برخی گفتند که او مایه تیر روزی و نحسیت است برخی آمدنش را تعبیر به بیچارگی قوم پنداشتند و اینگونه بود که رحیم به دل بیابان رفت و از روستایان دور شد بی هدف مسیری را دنبال می کرد و به دنیای آدمیان فکر می کرد آنان گفتند می و گفتند به دنیایی که ساختند به دنیایی که آن معتقدند به باورهایی که ریشه بر جهانشان دوانده و برای کندنش باید که از جان گذشت در برابرشی سادن تقیان است یا گری و شورش است آن شوری است که آنان تراب مرگ محکوم خواهند کرد به خودش فکر کرد به مردنش به مرگی که در نزیکی جان او لانه کرده است به مردنی که تا دیر سباهی او را به خیش فرا خواهد خواند، نخستش سر شد بدن بیحس از حس مردن آرام شد و احساس رهایی به جانش رو سوخ کرد خود خاند اگر بمیرم چه آرام خواهم شد چه رها خواهم بود به چه دنیای دور از ظلمتی پر خواهم کشید آنجای که نیستی حاکم است آنجا که هیچ از درد نخواهی دید اما تلنگری به خود حس جاف مانده در جان انسانها او را به خود خاند و گفت شاید دورتر از این دنیا باز زنده بودی باز ظلم بود و باز که فریاد میزدی، باز باید در برابر عرضش ها می و این بار در برابر قدرت عظیم تری می احساس رهایی را به طغیان تغییر داد و فریاد کنن گفت هر کجا ظلمت آکم بود من در برابرش تغییر خواهم کرد در برابرش ایستادگی خواهم کرد و تا زندهام به همین مرام پایبند خواهم بود باز به یاد مرگ افتاد یاد رها شدن از این دنیا یاد مرگی که بسیاریان را برایش آرزو کردند هران کسی که او را خیانتکار پنداشته است هران کسی که او را جنایتکار دیده است همه یه هموطنان شاید اجنبان شاید تمام دنیا و آدمیان آری همه در آرزوی مرگ او ماندند، بودن او تغییر نقزم حاکم است، دگرگون کردن جهان و جهان آدمیان است، بودن از چه کس را سود خواهد داشت که آرزوی مرگش را نکنند؟ اگر او فریاد بزند، اگر به فریادش جماعتی برخیزند، چه به روز دنیا خواهد آمد؟ دنیا چگونه تغییر خواهد کرد و چه کس به دنبال چنین تغییر است؟ آنان که بر قدرت سوارند از مرگش شادمان خواهند شد و آنان که بر گرده سوارند از ندانستن به تبل شادی حاکمان خواهند کوفت. آنقد به آنان گفتند، آنقد بر آنان خواندند آنقد واژگان را ملکه بر ذهن و دنیایشان ساختند که بی هیچ دانستن از او آرزوی مرگش را فریاد بزنند. رحیم به خود گفت از مردنم چه دنیای شادمان خواهد شد چه جشن و پایکوبی به راه خواهند انداخت شاید اگر بدانند چه تقیانی به فریادم به پا خواهد خواست در همین بینامی سرستنم می بریدند. به خود نهیب زد و گفت باید زنده بمانم باید که زندگی کنم باید که باور به جان و آزادی را به جهان نشده باید به فریادم طوفان بپا کنم انقلاب شکر دهم، تغییر بسازم و جهان را تغییر دهم. احساس گرستنگی به همه جانش مصولی بود، توانش را بریده بود. در صحرابی هیچ هدف مشخصی راه می و ناگاه از این رفتنها بازی ایستاد. به زمین نشست. گودالی بزرگ به نزدیکش بود. لیک توان و حسله رفتن به میان آن را نداشت. مارمولکی بزرگ نزدیکش با کمی فاصله در حرکت بود رحیم رفتنش را نظاره کرد به او چشم دوخت گرسنه بود. چند روزی شده بود که غذایی نخورده بود و حال در برابرش جانی به رقص آمده و غریزه فریاد دریدن سرداد بدوید و بدرید ناخواسته رحیم از جای خیز کنان به سوی مارمولک حرکت کرد مارمولک قدری از او دور شد و رحیم دوباره او را دید این بار نه به غریزه که به جان بودنش بر او نظاره کرد دستانش را دید پاهایش دم افراشتهش احساس ترس بر جانش احساس مرگ که به گریبانش نزدیک شده بود غریزه بقا و ماندن فریاد زد بدوید و بدرید و رحیم فریاد کشید جان است چگونه او را بدرم غریزه فریاد گفت برای بقا باید که درید اگر او را ندری زنده نخواهی بود جان به پاسخ گفت بقا به چه قیمت به کشتن مهر بر جان، به خون ریختن و قصاوت به پروراندن دیوانگی بقا به چه هزینه درون رهیم بلوایی به پا بود به فریاد بر سر هم می و یکدیگر را مجاب می کردند. فریاد دریدن و جان انگاشتن رحیم به چشمان حیوان نگاه کرد ترس درون چشمانش را دید به قعر چشمانش احساسها دید حس مادر بودنش را دید و به کامش قضای برده به جان دیگری را شنید غریز فریاد کنان گفت چه میگویی بیمار از چه سخن به میان آورده او خیشتنش برای زنده بودن می درد. او نه مادر است نه فرزندی به خیش دارد نه مهری به جان پرورانده است و نه به عشق زاده شده است بنگر جهان پیرامونت را بنگر و بشناس دریدن همه حیوانات را نظاره کن چگونه جان یکدیگر را برای بقا دریده اند چگونه به یکدیگر رحم نکرده اند فراتر برو آیا ندیده ای که فرزند خیش را می‌درند رجیم درون جان رحیم فریاد کنان خاند آنچه گفته ای به محال درونش کمال خانده شد لیک من که خردمند و دانا شمرده شده هم. چگونه به خرد، چگونه به فهم، چگونه به دانستن جان بدرم آنان اگر هرچه به گفته هایت کردند به غریزه بود به فریادهای ننگین تو بود، به نیاز و در حسر بقا بود لیک من که به دانستن به خرد آزین شدم من که آنچه می کنم را می‌دانم و باید عقلم آنچه کرده ام را تایید کند یا تو به دیوانگی من چشم دوختهی یا به قصاوتم یا باید خود را به غریزه بفروشم و عقل را به خدمت آن درآورم که بقا را پشتبان شود و یا به فریاد آن مهر سردم. باید به نقصان عقل همقسم شوم که هیچ نمی بینم و نمی‌دانم. یا به فریادهای تو به هنجارهای پر سر تعظیم فرونه هم سجده بر آلت دیوانگی فرو آورم بر جنون و ظلم سهن هم و آن شوم که تو می خواهی آن جان پر نیاز در قصاوت آنکه بر قریز عقل را خوانده است آنکه به مدد از خرد در قساوت پیش رفته است اما من فراتر از اینان جانم مهرم، عشق و دوست داشتنم جهانی فراتر از نیاز میخواهم جهانی والاتر از بقا میخواهم جهانی بزرگتر از قریزه می پرورانم حیوان کماکان به جایش مانده بود و رحیم به فریادهای درون همه را میشنید همه را میخواند و حال فریاد زد من جانم جانی به مهر دور از دنیای دیوانگی آدمیان من فراتر از آنچه بقا اید را میخوانم این بار هر چه در دنیای درونش بود آمده بود تا عقل را زایل کند عقل میخواند برای زنده ماندنت نیازمند آنی. نیازمند دریدنی اگر ندری از میان خواهی رفت شگونه میتوانی جهان تازهی پدید آوری رحیم فریاد کنان این بار به جهان خواند. برای ساختن دنیای بی دریدن نمی توان درید نمیتوان درید و ادعای ندریدن کرد نمی توان از مهر گفت و قصاوت کرد نمی توان به هر وسیلهای به هدف رسید که وسیلهی ساختن هدف در پیش روست از فریادهای شیوان دور شد و به دور دست ها رفت رفت و از دنیای او دور ماند رحیم خاند اکاش به دنیایی دورتر از ما میزیستید، سید دنیایتان هزاری دورتر از ما بود ای کاش دنیایی برایتان پدید آوریم دورتر از تمام دنیای آدمان رهین بیحال بود و در بیحالی بلند شد و خواست که به راهش ادامه دهد اما نزدیک به گودال که شد ناگاه به درونش افتاد گودال عمیقی نبود و با افتادنش جان تازهی به وجودش دمیده شد آب به صورتش نشست به صورت به درون حفری از آب افتاده بود چند روز بود که آبی نخورده بود دهانش خشک زبانش ترک خورده و آب را بلید. به درون می‌داد و این مایه‌ی حیات را به جان فرو می برد. زنده می‌شد جان می‌گرفت و دوباره پرورانده می‌شد بعد از خوردن آب بود که حال و هوایش کمی به جا آمد با خوردن آب بود که توانست دور و اطرافش را از نظر بگذراند و دید که گیاهانی گوش تا گوش و حفره را پوشانده‌اند گیاهانی کوچک و سفت دست بر گیاه برد و آن را معطلی به دهان کرد هنوز آن را نجویده بود که فریاد غریزه به سراغش آمد غریزه بود شاید استدلال عقل در حسر بقامانده بود شاید این سالیان حکرانی غریزه بر خرد بود هرچه که بود فریاد میزد. چه کرده ای؟ وا مصیبتا جان دریده ای؟ که جان برون آمده از خاک در دل صحرایی که جان بران قنیمت است را دریده ای. چه گفته بودی از ندریدن؟ از نخوردن و خون نریختن حال آمده ای و جان دیگران را دریده ای؟ چه باقی خواهد ماند از آن اهداف والایت از آن چه بران بالیدی و وسیله را به تکمیل هدف خواندی؟ آیا حال به این وسیله برای زنده ماندن ندریدی تا ندریدن را ابلاغ کنی؟ رحیم و جان و مهر و خردش فریاد زدند ما به خاک خانه ایم. دست بر خاک میبریم آن شن و ماسه صحرا به ما داده است را بر زبان خواهیم کشاند ما به نخوردن و هماره در نخوردن ماندن آرزومندیم ما به ازمیان بردن نیاز و شهوت و غریزه و بقا رویامندیم لیک جهان چنین خواهد گذاشت اجازه که زنده بودن به ما خواهد داد هی وای که چه است هیوای آنان که تا آرنج دستانشان به خون و خون ریختن آلوده است آمدن تا از جان دیگران حمایت کنند از جان آنی که نه فریاد میزند نه خونش به زمین ریخته میشود حمایت کرده است در حالی که فریاد کشان حیوانی را که زجه میزند سر بریده است خونش را به زمین پاشیده و پس از چندی که دل روده هایش را به زمین ریخته با جنین او روبروست که جان دارد و باز به دریدنش در آمد و او را به تمام ناله ها و فریادها سر بریده است هیوه که چه جهانی ساخته اید چگونه عقر را به حسر خیشتن تان درآورده اید به قصاوت تان گره زدید آنقدر در این دیوانگی به پیش رفته ای که حال به مدد از عقل و خرد برای قصاوت و خونریزی دلیل و استدلال تراشیده ای حال آدمیان که از دیربازی به عقل آزین شدند آنقدر در این عقل و به هست آمده بر قریز قوته خوردند که قساوت بخشی از باورشان شد و حال برای ظلم و برای ترویج قتل عوام و دریدن برای زشتی هر بار به همان عقل در حس دست میاندازند و از آن طلب راه می کنند رهیم گیاه بر سهرامانده را میخورد و باز به افکار درونش پاسخ میگفت همه آمده بودند تا او را به قضاوت بنشینند دوباره که عقل خانده شده بود فریاد زد ما همگان در پسی و حسر غریزه در آمده این لیک تویی که به مهر ما را فرا ای تویی که برای جهان بی به میان آمده ای. چگونه به دریدن قانه شدی چگونه حاضری گیاهی را بدری و باز فریاد از ندریدن سردهی؟ جان جانب تنگ آمده گفت آری میدانم دانم می دانم من به جبر به میان آمدنمان به جبر است. میدانم همه برای بودن باید که زشتی روا داریم میدانم که این چرخه زیستن و حیات به چنگال زشتی درآمده و نیاز ما را به بند کشیده است میدانم آنچه که به میان آمده دور از جهان مهر و عاشق بودن است میدانم آنچه که دنیا برای ساخت ساخته جهان زشتی هاست همه را از پیشتری دانستم همه را از دور دستی دیدم جاندریدنها را به چشم دیدم فریاد زدنها، خون ها گیاهان به مرگ رسیده را دیدم، همه را دیدم اما من به مدد از عقل می خواهم بهتر باشم. می خواهم از زشتی تا آنجا که توانم است دور شوم. می خواهم به بند قصاوت در نمانم. می خواهم آن که نظم دیوانگیست را برهم زنم. آری میدانم که نیاز ما را به بند درآورده است. می دانم که به نیاز باید زشتی روا داشت اما خود به قضاوت بنشین گیاهی که درد کشیدنش را به چشم ندیدم فریاد کشیدنش را نمی بینم مهر و عشق میان مادر و فرزندش را ندیدم آشق شدن و اشبازی دنیانشان را ندیدم به وقت چیدنشان زرچ کشیدنشان را ندیدم خونه به زمین ریختهشان را ندیدم فریاد زدن و هزاری رنج ها را ندیدم. آن را چگونه به قیاس حیوان بریم؟ انباط را نه برای لذت و شهوتمان نه برای دیوانگی. نه برای رنج دادن که برای زنده بودن در این چرخ ماندن تنها تناول کرده ایم. حال بدان و این را به چشمهایت در جهان ببین. جهان جهان عینیات است. جهانی است که باید به آرمان والا نزدیکش کرد. به ایده های بزرگ نزدیکش کرد. باید آنچه در رویاس را بران ساخت اما جهانی است که در آن ظلمت پدید آمده. نیاز بخشی از آن شده و ما آمده تا در برابر این افراد بیستیم. آمده تا آنجا که جهان را میتوان بدل به جایی برای زیستن کرد بدل کنیم. آمده تا آنجا که توانه از دنیای را تغییر دهیم. جایی برای زیستن همه جانها از آن پدید آوریم. رحیم کمی خرد و کمی چید، آبی هم برای خود تدارک دید و بعد از کمی استراحت از آنجا دور شد. به دل صحرا برای خود در قلب یکی از گودال‌های های تاریخ و کتاه خانهی بنا کرد تا زندگی کند. خانهی که سخف کوچکی داشت و دیوارهایش گودال در دل صحرا بود. سخفی که از خارهایی به قلب صحرا تدارک دیده بود و اینگونه زندگی را گذر برد. تا شبی صدای ناله های او را به خود خواند. صدای ناله های کودکی بود که در گوشه دورتر از خانه او به زمین نشسته ناله می کرد در تب می سوخت و فریاد می کشید. رحیم او را به آغوش گرفت و به داخل گودال برد دست بر صورتش گذاشت و از سوختنش سوخت به صورت ظرف آبش را به پیش آورد و بر پیشانی ریخت مقداری آب به دهانش برد و بعد از لباسش تک کند و آغشته به آب کرد و بر پیشانیش گذاشت بعد از آن او را به داخل گودال خواباند رفت و در دورتری که از پیشتر شناخته بود مقداری نمک به همراه خداورد و گیاهانی که محل رویدن آن را در این روزها شناخته بود تک چوبی که بر زمین افتاده بود را نیز با خود همراه کرد و این گونه وقتی به گودال رسید زرف چوبی را به نمک و آب پر کرد و پاهای کودک را در آن فرو برد بعد از چندی آرام آرام کمی از آن گیاهان چیده به دهان کودک گذاشت و بعد از چندی شروع به جویدن کرد کودک آرام از آن خورد و بعد از چندی خابی تا صبح او را تیمار کرد آب برپایش را تغییر داد گیاه چیده را به او داد تا تناول کند بارچه بر پیشانیش را با آب تازه و خنک سرد بر پیشانیش گذاشت تا صبح دمای بدنش کم شد. حالش بهبود یافت و توانست سخن بگوید. به شب هزاری کابوس خوانده بود. هزاری فریاد کشیده بود و حال میتوانست سخن بگوید. حال می توانست به رحیم بگوید که کیست. در پاسخ پرسش رحیم که از کجا به این صحرا رسیده است گفت از محل زندگی هم دور شدم و ناگاه خود را به قلب این صحرا یکسان دیدم این صحرا که خانه را از ما دور کرده است این صحرای یکسان که همه جایش یک شکل و همانند است اینجا که اگر از خانه دور بمانی دیگر شناخت راه بازگشت ناممکن است رحیم گفت از روستایان نزدیک به صحرا هستی کودک پاسخ گفت آری از همانانم. آنم فاصله بعد از پاسخ گفتم فریاد زد آیا تو همان ملعون رجیم و خیانتکار هستی؟ رحیم گفت آری همانم کودک ترسیده بود دست و پایش را جمع کرد و گفت تو را به هرچه باورداری مرا از میان نبر مرا به اجنبان مفروش مرا نابود نکن مرا رحیم در حالی که برخواسته بود گفت برخی تو را به روستا و روستایان و خانواده ات ببرم کودک گفت نیازی به بردنت نیست تنها بگذار تا از اینجا دور شوم و مرا از بین نبر و نکش. رحیم در حالی که از گودال بیرون آمده بود گفت آیا مسیر بازگشت به روستا را می دانی؟ کودک با حالتی مستحصل گفت نه اما پیدا می کنم. رحیم دست برد و او را به روی شانهش گذاشت و گفت نگران نباش به تو آسیبی نمی رسانم. تنها تو را به خانوادت خواهم رساند. کودک در حالی که بر های رحیم نشسته بود گفت: آیا به خاک اجدادی و بقایش قسم میخوری که مرا آزار ندهی؟ رحیم گفت: آری، به جان و آزادی قسم میخورم که تو را هیچ آزار نکنم. این گونه بود که رحیم به سوی روستا رفت و بعد از چندی در حالی که مدام کودک از او سوال کرد و دیگر آزار رساندن و خیانت کار بودن رحیم را از خاطر برده بود، به روستا نزدیک شدند. جماعتی حراسان در روستا پرسه میزدند و با دیدن رحیم و کودکی به دوشش به سوی او هجوم بردند در چشبر هم زدنی کودک را از شانه های او فرو آوردند کودک در حالی که از رحیم دور میشد گفت رحیم بابت نجاتم از تو سپاس کذارم. مردمی که از دیشب به دنبال کودک و همه جا سرک کشیده بودند و حال او را در آغوش رحیم دیدند به او گفتند آیا او را دزدیده بودی؟ آیا میخواستی با او از ما طلب ای کنی و شروع به جنجال تازه ای کردند که کودک فریاد کنان در حالی که از صحنه دور میشد گفت دیشب به دل صحرا گم شده بودم او مرا به خانه بازگرداند او مرا ندزدیده بود روسایان و پدر کودک که حال از ماجرا خبردار شده بودند به نشانه احترام و تشکر برای او سری تکان دادند و به آخرش پدر کودک گفت اگر خاصه‌ای داری از ما به تا برایت اجابت کنیم ما پاسخ خوبی را به خوبی خواهیم داد رحیم با نگاهی که شوق بران نقش بسته بود گفت میخواهم مرا به روستا و در میان خود راه دهید تا کار کنم و به کنار شما زندگی کنم جوانان روسا در حالی که خشبین بودند و میخواستند او را فوشباران و سنگساران ساران کنند به احترام پدر کودک خاموش ماندند و پدرش با مشورتی کوتاه به بزرگان گفت زین پس می توانی به روستا زندگی کنی چپری برای تدارک خواهیم دید و از این به بعد تو را به کاری خواهیم گمارد. بعد از گفتنش بود که یکی از بزرگان خواند این را بدان که اگر دهست از پا خطا کنی و جوانان ما را منحرف کنی این بار به رجم تو را خواهیم کشت. بعد از این گفته ها روسایان در کسری از دقیقه از آنجا دور شدند و رحیم به دنبالشان رفت تا زندگی تازهش را به دل روستای تبییدی ها آغاز کند. کتاب کاخ، اثر نیما شه بخش هشتم به من اجازه دهید تا این کار را عملی کنم رحیم این را گفت و در انتظار واکنش حضاری ایستاد. چند روزی بود که به همراه مردان روسا برای کار خارج می شد از کار راضی بود و شبها به دل کپری که برای او تدارک دیده بودند می خوابید بیشتر روز را به سر کار بود و شب‌ها بلافاصله بعد از رسیدن به کپرش با چشمهای سنگین به خواب می‌رفت اما نه تنها در همان چند صبح پیش از خواب در کپر که همه ی روز به میان کار آرزو به دل مانده را بالو پر میداد. آرزوی تعلیم و تربیت آرزویی که همای سعادت پیروزمندی آدمیان را در آن می‌دید آرزویی که او را به قله تغییر می‌رساند از همان پیشترها و به دل کودکی آنجا که خیشتن به کلاس‌های درس می‌نشست آرزو می‌کرد تا آموزگارانی باشند که او را به راه بهزیستن رهنمون کنند اما دریغا که همه فریاد گذشتگان را سر دادهند و از لب‌های درخاکمانده آنان نجوا خواندند حال رهیم می‌خواست نه صدای گذشتگان که ملدای جان خیش هم جانان را فرا بخواند هماره به این رویای آموختن و تعلیم مینگری است به اینکه جماعتی در برابرش بنشینند و از آن دریای معرفتی که جانها به او آموخته بیاموزند تا به فردا آن کنند که جان و جهان در آن پاستاش شود. رویای آموختن و کودکان در کنارشان بودن و آنان را آزمودن این رویا به آخرش بر زبان رحیم آمد و یکی از روستایان رشته افکار در همتنیده او را گسست غیر ممکن است. این کار دیوانگی است. چگونه به کسی که به مام میهن خیانت کرده و ریشه افکارش در خیانت برهم تنیده است شغل آموزگاری دهیم و او را معلم فرزندانی کنیم که به فردای میهن باید پاسبان آن باشند. یکی دیگر از جمع روستاییان فریاد زد به فردا خیانتکارانی را خواهیم دید که میهن و همه ارزش های ما را به سخره می گیرند. یکی از جوانان تونتخوی صحرا فریاد زد از همان ابتدا راه دادن این خیانتکار به دل روسا دیوانگی بود حال کودکان دیار مادری را هم به او بسپاریم و دیوانگی را نشت دهیم به تمام مدت گفت و ها رحیم مسکوت مانده بود به پرواز ای در آسمان ها چشم دوخته بود که رحا از آنچه چه اند پر می و آسمان را به همراهی بالهای خیش فرا است در همین میان بود که یکی از همان جوانان روستا فریاد زد دریابید، این مرد دیوانه است رفتارش را به درستی بنگرید ما درباره او صحبت میکنیم و او سر به آسمان برده و پرواز جانوران را به نظار نشسته است چند بار او را به این کار و این گونه دیوانه جسید، چند بار او را مورد خطاب قرار داده و بی جواب اید همین خود من بارها به او تاختم و از او هیچ جواب دندان شکنی نیافتم او دیوانه است و هیچ عقل سلیمی کودکان را به دیوانه ای نمی سپارد. یکی دیگر از روستایان گفت من خطابه شما و این دیوانه خواندن او کاری ندارم که بسیار به دل روستا شنیدم که او را آرام و صبور پنداشتند او را عارف و صوفی خطاب کردند و این زد و نقیص ها بیارزش است از آن سو که به او القاب و والا عطا کردند و از این سو که او را پس خواندند چه بسیار که از تراوت حب و بغز به مشامم رسید اما دوستان واقع باشید او درس خانده است توان آموختن خواندن و نوشتن به کودکان ما را دارد در این روستای دور مانده از پایتخت در این روسای نفرین شده و تبعیدی از فرهنگ چگونه کودکان خود را بیاموزیم چگونه آنان را به طریقتی تازه طری تا به در این در خودماندگی بمانیم و در انتظار پای تخت نشینان بنشینیم؟ شاید آنان آموختند و از میانشان یکی رفت و علوم پایتخت را برایمان به یادگاه آورد. ورد شاید یکی از آنان رفت و به بازگشتش ما را آراسته کرد روسای من را آباد ساخت و به فردای دورتری ما نیز از آن لذات که پای تخت نشینان بهره بردیم یکی از جوانان روسا با تمسخر گفت تمام این پیشرفت ها را با دایر شدن کلاس های درسی او خواهیم یافت هم همه در میان روسایان در گرفت. برخی فریاد می زدند و برخی می خندیدند برخی به خشم یکدیگر مینگریستند و برخی کنان چیزهایی به هم می بافتند که رحیم گفت در برابر رویتان به جانم سوگند می خورم که جز مر هیچ به آنان نیاموزم یکی فریاد زد همان خواندن و نوشتن را بیاموز مهر پیش کشد راند شده بی بر وطن دیگری گفت قسم بخور آنان را به راه زشتی نخانی و از راه به در بری دیگری فریاد زد آری قسمش را جدی بگیر او در تمام سالیان پیشتر هم برای حفظ خاک اجدادی قسم خورده بود رحیم با آسمان آبی می است. دیگر پرنده در میانش جای نداشت و از روسا و روسایان دور شده بود. رحیم آرام و زیر لب مدام تکرار می کرد من هیچگاه به طول عمرم به وطن قسمی یاد نکردم. من به همرنگی شمایان در نیامدم. من به های پیشینیان کافرم. من مؤمن به جان و مهر بودم. خاک را نپرستیدم. نژاد را پاس نداشتم. رحیم آرام آرام و زیر لب میخواند که یکی از روسا با تحکم بیشتر از دیگران رو به جوانان فریاد زد به شما مربوط نیست که هنوز ازدواج نکرده اید و یا فرزندی ندارید حق شرکت در این جمع را نداشته و بی سود به اینجا پناه آورده اید آنگاه که فرزنددار شدید فرزند خود را به مکتب او نفرستید اما شمایان که کودک دارید بمانید که شور خواهیم کرد جوانان روستا و رو لند کنان از میان آنان دور شدند و به رحیم تاختند هرکس چیزی گفت یکی او را راند شده خطاب کرد و دیگری او را ملعون خواند یکی او را به بیمهری بر وطن شناخت و دیگری به او دشنا میداد و رحیم که این بار وزش باد را نظاره می کرد استقامت دیگران را در برابرش میدید. حرکات مواج او را به آسمان میدید. خارهای بیریشه بر آسمان را دید و آرام به ندای یکی از روستایان گوش سپرد چه کسانی بر دایر کردن مکتبی برای کودکان به دست این جوان تازه آمده به دیارمان موافقند؟ آنان که این گونه رأی دارند از جای برخیزند تا این قائله را خاتمه دهیم. رحیم چشمانش را بست و برخواستنشان را ندید. در برابرش باد خروشانی را دید که به مساف او آمده است. نه شاید در برابر او نایستاده ساده بود. شاید برای برکندن آنچه پیشترها پیش درها بودند آمده بود بود. شاید آمده بود تا آنچه در این هزاره کا آنچه ریشه های فاسد و مسمومشان را به بند درآورده است را برکند نمیدانست باد برای برکندن چه به میان آمده است اما نوازش شگاه تازیانه هایش را بر صورتش میچشید که یکی از روسایان گفت این کلاس ها را دایر کنید اما من قول می دهم که فرزندم را برای دیوان شدن به مکتب او نفرستم امرحیم به کپر بزرگی که با دیگران بنا کرده بود چشم دوخت روزهایی را برای برپایی آن تلاش کردند و آن دسته از تجار که به روستا می آمدند گفتند تا برایشان اسباب مورد نیاز را فراهم آورند کودکان شادمان از آمدن به کپری شدند که جای ای بود جایی برای آموختن و تعلیم قرار بر این بود که تا چندی دیگر آنان بخوانند، بنگارند و به فردایی بیندیشند اندیشه هایشان را باور کنند، از آن چه محروم ماندهاند اند، بنوشند و به فردا بر دیگران بنوشانند. شادمانی کودکان به شادمانی رحیم تصادم کرد و یکایکشان را به آغوش گرفت. یکی از آنان را از پیشتری می شناخت در میان همان صحرا و آن شب دور. در میان تب و سوختن، او اولین دانش آموزان دیارشان بود. آمد و به پیش همه در برابر رحیم نشست و بعد از چندی رحیم نیز برابرشان به زمین نشست برایشان خواند حروفی را ترسیم کرد که واژگان را میساختند واژگانی که جمله ها را بارور کردند و سرآخرش آنچه باید میآوختند را به دل جمله ها ساختند و پرداختند روزها به پشتبانی از هم میگذاشتند و یکدیگر را به آغوش میکشیدند تا کودکان روستا بیاموزند چگونه بنگارند چگونه بخوانند و به باروری خواندن و نوشتنها چگونه بیاندیشند؟ پرسش ها یک به یک آغاز می شود. کودکان پرسش کردند طالب دانستن هر چیز بودند هر خوانده ای را به دید تردید نگریستند و شک به دلشان آغاز شد تشکیق کردند و باز خواندند. مبارزه میان تجاهل و تعاملشان آنان را به وادی دانستن برد گاه به گلاویزی تعصب خاموش ماندند اما روح پرسشگرشان آنچه تعصب ساخته بود را ویران کرد باد و زید و هرچه دور دستان به ریشه های فاسد ساخته بود را برکند در این کلاس آموختن هماره خبر از گفتن نبود گاه دیدن بود گاه تلمس بود و گاه تعمل بود روزی از این روزهای آموختن بود که میهمان سرزدهی به جمعشان راه یافت یکی از جانهای زنده در دل صحرا، همان جان دوردستی دستی که سخن از غریزه گفت رحیم را فرا و او را از خود برون راند مارمولکی به میانشان آمده بود راه را گم کرده بود راه دیارش را راه خانه و حریمش را اما کودکان از آنچه آموخته بودند نشان دادند آنان به تعلیم هر کرده ای را پیش می بردند اگر از دیربازی بر آنان خواندند که مار دیو روی زش سیرت است اگر در برابرت از آنان دیدی بر او رحم کن که تو را خواهد درید سلاح به دست می تا او را بدرند باز ندای دیربازان به گوش رحیم خواند بدوید و بدرید از آن دیربازان بر آنان خواندند که آنچه در برابرتان است را بدرید که غریزه این گونه فرمان داده بود اگر او به شما نزدیک شده است به ترس سر تعظیم فرود آورید و پیش از آن که شما را بدرد او را بدرید که راز بودن و ماندن و بقا در چنین ترس ذاتی به جان است. کودکان نیمخیز شده تا جان برابر را بدرند. آموزه پیشینیان به آنان فرمان خواند، به آنان گفت و آنان شنیدند. دیدند. از آن دیرباز همه را به چشم دیدند. گاه به فرمان پیشترها آموختند و وام و از آن روز که آنان دیدند و آنچه باید تعلیم می را نه به فرمان دوردستی نه به حکام شورتختی که به فعل در بیبختی دریدن دیدند و آموختند باز ندای پیشینیان به گوشها فرمان راند آنان خواند آنان را خیست کرد تا به بقای خیش تا به غریزه و ترس در وجود تا به ها و باورها تا به فرمان و ها تا به عمل و در خود ها بدرند و باز بدوند یکی خاص برخیزد زد و بدود که رحیم خواند بر جای بنشین آسوده باش که او آرام است او تو را تهدید نخواهد کرد او تو را در مرگ نخواهد خواند آرام باش بر جای خیش بنشین که صدمه ای از او بر تو نخواهد رسید همه آرام بر جای خود ماندند تکان نخوردند و به رحیم چشم دوختند رحیم آرام به سوی او رفت با رفتنش او دور شد و از محلک گریزان بود به دروازه کپر رسیدند در چشم بر زدنی او دیگر نبود اگر راه دیارش از این کپر میگذشت آموخت باید از دورتری به حریمش سرزند اگر آمده بود تا به تحریکش پاسخ گوید دانست که در این کپر تاریک جایی برای زیستن نیست. او رفت و همه چیز را دانست، لیک او به دیگران از این دانسته هایش نیاموخت و هیچ بر نگفت. لیکن آدمی هر آنچه آموخته بود را به زبان راند. از آنچه دانسته بود بر دیگران خواند و اینگونه هر روز بیشتر به پیش رفت. لیکن چه مصیبتی که هر کس هر چه پنداش را به زبان راند. هر دید را به میان آورد و این گونه تلاتم میان حق و باطل به جریان افتاد. باری کسی به نیش ماری زهراگین بر زمین ماند و فریاد کنان به هر چه ابنای بشر بود خاند او مرا به زهر بدسیرتی خود کشته است. او پر از کین آمده تا بقای ما را به خدشه ای از میان برد. او آمده تا یکایی که ما را در درخیشتن بکشاند ریشه از نسل ما برکند. او به جنگ با ما برخواسته است و این گونه خاندنش ترس به میان آدمیان راه داد آنان آنچه را خاندند که او در دیربازی خوانده بود و صدا هر روز بیشتر و بیشتر به پیش رفت رفت و به آنجای رسید که او را زشتی و پستی دانستند او را دشمن قسم خورده خطاب کردند و آن شد که هر کس هر چه در برداشت را به دست گرفت تا ریشه از بودن آنان برکند رحیم آرام به میان کودکان خواند دوست داشتید با او چه کنید یکی از کودکان گفت دوستاشم جان او را بدرم که دیگر پا به میان قلمرو ما نگذارد دیگری گفت دوستاشم او را از این حریمم دور کنم که جای ماندن او در میان ما نیست دیگری گفت باید او را میکشتم تا بداند سر بر حریم دیگران بردن چه مجازاتی خواهد داشت رحیم گفت آیا تا کنون سر بر حریم دیگران برده اید؟ نخست گفتن رحیم صدای یک پارچه از کودکان را در برداشت می خیر اما به گذر کوتاهی از زمان چندی بر آمدند و از خاطراتی به تجاوز بر حریم دیگران گفتند رحیم از همانان پرسش کرد آیا دوست داشتید آنان شما را جزاده هند؟ متفق القول همه پاسخ دادهاند خیر و رحیم در ادامه خواند؟ آیا به باورتان؟ این حریم روستا تنها از آن شماست؟ آیا هیچ تن دیگر در آن منزلی نگزیده است؟ باز به سرعت همه خواندند خیر و پس از چندی برخی پاسخهای دیگری دادند که چرا دیگرانی هم به اینجا منزل گزیدهاند؟ اما این حریم از آن ماست، این دیار قلم ماست رحیم گفت میدانید چگونه حریمتان محفوظ و دست نخورده خواهد ماند؟ برخی فریاد زدند با پاسداشت از آن برخی خواندند به ایستادگی و جنگیدن، برخی خواندند به مقاومت و غرور و به آخرش رهین گفت. و اگر کسی قدرتمندتر از شما بر شما چیره گشت چه چی خواهید کرد؟ اگر آنان شما را مغلوب کردند چه خواهد شد؟ همه فریاد زدند کسی توان چنین کاری را نخواهد داشت. ما قدرتمندترین آدمیانیم. ما از همه بزرگتر و والاتریم. ما پیروزمندان و برترینانیم. رحیم اینگونه گفت اگر مردمانی بیایند که از شما برتر و والاتر باشند اگر موجوداتی آمدند که از شمایان بزرگتر و قدرتمندتر بودند و شما را یارای مقابله و جنگ به آنان نبود چه؟ کودکان به فکر رفتند و هر کدام به ذهنشان تصاویری ساختند گاه از بادمیانی که به قول میمانستند گاه از حیواناتی قوی و اساتیری گاه به موجوداتی وهمانگیز و قدرتمند یکی از دل همان کودکان گفت پس برای آن که محفوظ بماند چه باید کنیم؟ رحیم گفت به حریم دیگران حرمت نهید حریم دیگران را پاس بدارید کودکی دیگر از گوشه دیگر کلاس فریاد زد اما آنان که حریم ما را پاس نمی دارند آنان که ما ماما تجاوز می کنند اینگونه نمی توان از خاک اجدادی دفاع کرد رحیم خاند اگر همگان به چنین باوری رویاورند اگر همگان بر این باور داشتند که حریم دیگران را پاس بدارند دیگر کسی بر دیگری تجاوز نخواهد کرد اگر شما نخستین این ریشه عظیم باشید شاید به فردا درختی سر براورد که آن حریم همگان پاس داشته شود یکی از گودکان گفت اگر ما حریم دیگران را پاس داشتیم اما آنان به ما حمله ور شدند من با آنان خواهم جنگید من آنان را به نابودی خواهم کشاند. رحیم در حالی که به او نزدیک میشد گفت آیا آن جان پیشین که از کپر دور شد هم برای تجاوز به خاک تو آمده بود؟ آیا او را بی درد و رنج نتوانستی از حریمت دور کنی؟ کودک به نشانه تأیید سرتکان داد رحیم در حالی که در برابر دیگر کودکان بر زمین نشسته بود گفت به نظرتان چه تعداد دیگری از جنداران در این صحرا حریمهای خود را ساختند؟ بر آن حریم به مانند شمایان عشق میورزند و برای پاسداشتش از جان می‌گذرند. یکی از گودکان گفت مثلا ها من آنها را دیدم که چگونه خانه می‌سازند چگونه برای پاسداشتشان سربازانی را به بیرونش گماردند. دیگری مثال دیگر زد و این چندین مثال در کلاس جریان گرفت که بحث با یکی از گفته‌های کودکان به سوی دیگر رفت. اما آنان از ما کهتر و بی ارزشترند. ما بر آنان غلبه داریم و آنان در برابر ما پوچ و بی ارزشند. یکی از کودکان در پاسخش گفت اگر گروه قدرتمندتری بر ما غلبه کند چه؟ آیا آنان هم ارزش والاتری از ما خواهند داشت؟ آیا آنان هم ما را پوچ و بی ارزش خطاب خواهند کرد؟ بحث در کپر میان صحرا بالا گرفت و هر کدام از کودکان نظرات خود را بیان کردند. کودکانی که دورتر از دیگران در بند تعصب وامانده بودند کمتر به گوششان خوانده شده بود و کمتر در دیوانگی های مرسوم غوت خورده بودند کودکانی که شک می کردند هر پرسشی را هر پاسخی را به پرسش دیگر پاسخ می گفتند آنان که خیشتن را به بند در نیاورده و هنوز ترس و تعصب به میان اندیشه هایشان جاباز نکرده بود رهین پرسش کرد والاترین ارزش به وجودتان چیست؟ هر کدام پاسخی گفتند یکی مادرش را والاترین ارزش ها خاند کسی پدرش را یکی خاک اجدادی و حریمش را و سر آخر یکی از جمعشان گفت جانم جانم والاترین ارزش به وجود من است رحیم گفت آیا فکر کرده اید اگر جانی در برتان نباشد هیچ ندارید تا آن را ارزش والای زیستنتان بدانید؟ اگر جانی در برتان نباشد از شما چه باقی خواهد ماند؟ یکی گفت مادرم به جای خود خواهد ماند. یکی از کودکان پاسخ داد اما تو نیستی که به او بنگری. کودک به سرعت گفت اما او هست که زنده بماند و زندگی کند. کودکی که پیشتر او را مورد خطاب قرار داده بود گفت و اگر او جانش را از دست دهد چه خواهد شد؟ باز کودکان با هم سخن گفتند هر کدام پاسخی داد و دیگری به پرسشی در برابر او ایستاد تا به آخرش رهیم گفت اگر با هم همدل و هم شویم که جان والاترین ارزش شاست اگر ایمان بیاوریم که برای زیستن ما متکی به جان هستیم و این بودنمان بیجان بی جان هیچ معنایی نخواهد داشت آیا می توانیم کسی را بر دیگری افضل بدانیم؟ کودکان که بیحسله شده بودند با هم همه با هم سخن گفتند و یکی از میانشان ایستاد و فریاد زد پس سرین جانها به نزدیک ما زیسته است آری آن چشم تنگان کوردل، آن قوم یاجوج و ماجود نزدیکمان پس سرین جانها هستند کودک این را گفت و از کپر بیرون رفت رحیم به افکارش غرق شد باز به یاد دور دست ها افتاد آنجا که در پایتخت جماعتی را پس انگاشتند آنجا که در دیار مادری اجنبان را پس شمردند، آنجا که بر دروازه های سرخ از پس بودن اجنبان سخن راندند، آنجا که کودکی به جرم اجنب بودنش معاخزه شد و حال که باز تعصب و دیوانگی بر اجنبان دور است، وحن می و زشتی روامی دارد، چشم تنگان کوردل. بیمایگان فرود است، دونمایگان بدتینت، زشتویان بدسیرت، خسیسان، زنبارگان، پوچمغزان، بیخردان و هزاری القاب دیگر. باز همه به گوشش خوانده می شد. به فلاتی در آن سوی و در دور ها در میان آبراهی که دو قوم را از هم دور کرده بود، یکی دیگری را کشمتنگ و کردل خواند و آن دیگری آن را بدتینت و بدسیرت نام نهاد. باز خون به جریان افتاد و مرزهای میانشان را خون گرفت دریا توفانی شد، باد به میان آمد و خون را به آب راه میانشان ریخت مرزشان را به خون تشکیل دادند و باز از خون یکدیگر خوردند تا سیراب شوند رحیم سر براورد و دید همه کودکان کپر را خالی کردند دور شدند به دور دستی رفتند تا باز از دیگران بیاموزند باز پدران بخوانند که ما والاترین هستیم مادران بگویند تو بهترین هستی دوست بخواند ما برترین هستیم و همه را تر کنند افصل کنند و باز همه در رقابت خودساختهی برای پیش رفتن و به قل رسیدن از های دیگران راه بسازند کولوران به کول بکشند و آنان را به پیش برند گاه در آن سوی رودها و به مرز خون کولورانی را به بردگی بگمارند و بر دوشهای زخمیشان سوار شوند تا به مرتب افضلیت و والاترین دست یابند گاه به این سوی رود خون منزل کنند و به جنگ غلام برگیرند و به دوش غلامان سوار شوند و باز از دور دستی کسی سرود برتری و افضلیت خیش را بخواند. تا به سرمستی آنچه او خوانده بود جماعتی به طول هزاران سال به کرده و نکرده اش بر دیگران گردد میدانی در برابر رویشان بازگردد تادران به جان یکدیگر بیفتند برای برتری، برای قهرمان بودن، برای والا برای تصاحب و ملکیت برای خانده شدن، برای صاحب بودن و بر سرآخرش برای خدا مندن. رحیم میدانست دانست که آنان چه خواهند آمود می که در طول نبودنهایشان به طول تمام این دورماندنهایشان از آنان چه خواهند دانست اما به دور دست این راه دورمانده از حق و حقیقت نور کمسوی را دید آن نور کمسو که پرتوان می شد و به پیش می آمد می که چگونه کودکان به پیش می و در برابر والدین نی ایستند. گاه به کنششان گاه به سخنشان، گاه به اندیشهشان آنان را باز خواهند آفرید آنان پیش غراولانند. آنان راه را دوباره خواهند ساخت آنان به تخریب آنچه چه سنت دیربازه است برامده تا راه تازه را خیشدن بسازند از نو سرآغاز کنند هرچه از دیربازان به آنان خوانده شده را از نو بخانند و پرسش کنند به هر که می مشکوک باشند و هیچ را بی تردید شده قبول نکنند ره چه بسیار رجیمان دید که یاغی و سرکش در برابر آنچه که عرف خاندند در برابر آنچه راه نوین گفتند در برابر آن شر و هزاری سنت خاندند ایستاده و سر برآوردند او دید جماعت کودکی را دید که آرام در برابر یکی از والدان ایستاده و درس دورماندن از صاحب بودن میخواند. به او آموخته است که صاحب دیگران نمان و از این صاحب بودن بگریز که تو را به زشتی خواهد کشان او کودکی را دید که در برابر خشونت ایستاده است پدری که با صلاح به تعقیب جانی آمده است را وادار به اندیشه کرده است او کودکی را دید که جان دیگری را پاس داشته است که می‌داند برای پاس داشت از جان خیش باید جان دیگری را محترم شمرد برای آزاد بودن باید آزادی دیگران را پاس دار بود و همه را به دل خوانده است به جان برخیشتن کشانده است و حال بر دیگران آموخته است رحیم شادمان می شود. که تعلیم را راه و طریقت تغییر آدمیان دانسته بود حال میدید که همه یکسانند حال میدید که اگر در گوشهای از جهان صفت تفسیر و لخلاقشان است به تعلیم بارور شده اند. حال میدید که اگر جماعتی خشونت را راهنمای نمای خیش کرده اند، به تعلیم ناپاکی ها دل سپرده اند. میدید که چگونه جانشان را به بند کشیده و آنان را به چنگال جهالت واگذاشتند گذاشتند و وا که نسلا به هم از آن آموختند که ریشه در فساد داشت که ریشه در دیوانگی و جهل داشت که همه ریشهش به خون دیگران سیراب شد و سرآخرش چنین جنونی را به بار داد به دورتر از کپرش مردی را دید که به پشت خارهای افسون در صحرا خیشتن را پنهان کرده است. رحیم از پشت بر او رسید و او رحیم را ندید. آنگاه که نزدیکش شد با صدای سرفه او را به خود خواند. مرد ترسان و لرزان به عقب نگریست و با ناله و شیون به او خواند: مرا امان دار، تو را به هر چه به آن باورداری مرا امان دار، میخواهم از مرزتان عبور کنم، میخواهم به دور دستی پنهان شوم. می خواهم به دورتری از این دیوانگی پناه ببرم رحیم دستش را به روی شانهش گذاشت و گفت چیزی خورده ای؟ تا رسیدن با آن کمال تو در دورده از تا راه بسیار است برای رسیدن به آزوغه بسیار نیازمندی مرد که چشمان ریز و صورت بزرگی داشت گفت میدانی من کیستم؟ من از چشم تنگان هستم رحیم گفت من نیز از رانده شدگان بیدل هستم اگر قوت و توشهی برای سفر میخواهی کپر من در این نزدیکی است، به دنبالم بیا رحیم این را گفت و به سوی کپر رفت و پس از چندی مرد بیگانه همراه او وارد کپر شد بعد از آنکه مقداری قوت با هم خوردند مرد بیگانه به رحیم گفت آیا میدانی سرزمین رویاها آن دیار آزاد و آن خاک آرمانی کجاست رحیم در حالی که به چشمان مرد چشم دوخته بود گفت همینجاست جاست مرد که بر آشفته شده بود با نگاهی از سر ترس به رحیم گفت آیا مرا مسموم کردی آیا میخواهی مرا بکشی به هرچه چه برام باورداری باور من تنها طالب زیستنم هیچ کاه به جنگ قوم شما بر نیامدم من برای دور شدن از این جنگ ها میخواهم دور شوم میخواهم سرزمینی را بجویم که همه آرزوها در آن است رحیم در حالی که نوشیدنی داغی را به او تعارف می کرد گفت این سرزمین والا که از آن سخمی گویی کجاست؟ آیا از آن چیزی شنیده ای؟ آیا به آنجا رفته ای؟ آیا کسی که از آنجا آمده است برای تو چنین گفته است؟ مرد در حالی که با خیالی تر نوشیدنی را به دست گرفته بود و احساس امنیت بیشتری از پیش می کرد گفت آری، هزاری از آن گفتند همار آن را به جعبه جادو دیدم؟ تمام زیبایی در آن است. آنجا کسی به جنگ دیگری نمی رود، کسی آزادی دیگران را مانع نمی شود. آنجا همه در آرامش و شادمانی زیستند. آنجا فقر نیست و کسی از گرسنگی نمی میرد. آنجا رحیم به میان حرفش آمد و گفت آیا به آنچه دیده و شنیده ای باور داری؟ آیا همه را به حقیقت تصویر کردند؟ آیا نمایش به میانش راه نداشت؟ فراتر از آن آیا جنگ را به دورتر از خانه های خود نبردند؟ آیا جنگ را به خانه دیگران نکشندند تا در دیار خیش در صلح زندگی کنند؟ آیا آزادی دیگران را من نکردند تا خیشتنشان آزاد باشند؟ آیا آرامش و شادمانی را به جنگ و غم در دیار دیگران برای خیشتن ارزانی نکردند؟ آیا گرستگی را به دیگران نفروختند و به فقر دیگران ثروتمند نشدند؟ مرد بیگانه گفت مر چه سود که با دیگران چه کردند. خیشتن را دریافتند، به خود و دنیای خود رسیدند و حال آنچه لیاغت است را دارند. هر کس به دیار آنان پناه برد از آن زیبایی به او خواهند داد. او را نیز در این زیستن شریک خواهند کرد. رحیم گفت شدگان به آن دیار کوچ بردند و همه به دور دستی منزل کردند. دیگران را در دیار جهالت رها کردند تا در رنج خیش بسوزند و بسازند. اما از آن رانده شدگان به دور دستها، از آنان که طلب پناه کردند، از آنان که توشه بربستند و به دیار دورترها برای زیستن در خیش رفتند، چند تن به سلامت به دور دست در آرامش منزل کرد. چند تن تومه آبهای خروشان شد، چند تن از رنج در خیش ماند و جان داد. چندتن در کپرهای آلوده به مرض مرد و سخت جان نبود چند کودک چند مادر چند پدر چند پیر مرد و پیرزن رنج سوختند گاه خیشان را سوزاندند گاه برای پاسخ گرفتن به پناه بی پناه در آتش جنون حریم ها مردند و خاک سر شدند مرد بیگانه کلافه شده بود با صدای که به فریاد میمانست گفت کسی آنان را فرا نخوانده بود کسی به آنان نگفته بود که به دیار ما بیایید آنها خیشتن انتخاب کردند و پاسخش را دیدند رحیم گفت به جبر زمانه انتخاب کردند به جنگی که آتشش را سالهان افروختند سوختند و به آخرش در برابر همان سالهان که از دیرباز رویا فروخته بودند ایستادند و گاه قصب شدند گاه بهانه شدند، گاه تومه شدند، گاه فروخته شدند و هر بار به معنای آنان را تفسیر کردند گاه برای بشر دوستی به یغما رفتند، گاه برای ثروت بیشتر به حراج رفتند. مرد بیگانه به میان سخنان رحیم دوید و گفت: ممنون از تو که به من دادی. از قوت و قضایت سپاسگزارم. میخواهم زودتر از اینجا دور شوم و به رویاهایم دست یابم. اگر به طلوع خورشید بر بخورم و هنوز در این صحرا باشم شاید جانم را بدرند شاید مرا زنده نگذارند مرد این را گفت و به سمت دروازه کپر رفت رحیم به او داد تا صبر کند انگاه به بیرون رفت و بیرون را زیر نظر گذراند انگاه که دید کسی نیست و همه چیز در امن و امان است او را راهی کرد و به او گفت امیدمان است که رویایت را به آغوش بگیری و آنگونه زندگی کنی که طالب برانی درود مرا به سرزمین رویاهایت برسان و به او بخان من آنچه سرزمین رویاهایم است را به دست خیشتن خواهم ساخت چه در دل صحرا و بیابان چه در میان جنگل سبز من آرمانم را به دنیا خواهم ساخت و پرچم دنیایم را برخواهم خواهم افراشت آن دو یک دیگر را به آغوش گرفتند و مرد بیگانه از آنجا دور شد و رحیم به خواب رفت تا در طول خواب و بیداری باز همه دنیا را نظاره کند. ببیند بداند و به دیگران از آنچه باورش است بخواند تا روزی آن دنیای پدید آید که به آرمان او گره خورده است. کتاب کاخ اثر نیما شهرساری بخش نهم. وطن را باید ساخت این عنوان کتابی بود که رحیم در میان صحرا شروع به نوشتنش کرد. رحیم تغییر را در تعلیم دید و دانست که برای تغییر دنیای آدمیان برای ساختن دوباره جهان برای پیش بردن اهداف و باید که به تعلیم تکی کند باید آدمیان را به راهی تازه فرا بخواند و به آنان بیاموزد که جهان را چگونه باید دید رحیم به طول تمام روزهایش به سر کلاس درس با کودکان شمه از تغییر را در میان آنان دید. بحث ها و خاندن های تازه آنان را دید. دید که چگونه از پیشتر خودشان فاصله گرفتند. جامه های را برکنندند و به دنبال جامه تازه گشتند. تا این دریدن را به دیبای تازهی تغییر دهند. اینگونه بود که بیشتر از پیش دانه که هر تغییر از راه دانستن و تعلیم خواهد گذشت. دانه که برای تغییر آدمیان باید که به تعلیم و تربیت متوصل شد. دانه است که میتوان دنیای آنان را تغییر داد و اینگونه بود که قلم به دست گرفت. هر شب بعد از آمدن به کپر شروع به نوشتن کرد. ارزش هایی که جان جهان به او آموخته بود را با دیگران مطرح کرد و نگاش تا دیگران از آن چه او از جهان پیرامون ادراک کرده بیاموزند و دنیای تازه ای را بسازند. وطن را از نو ونا کنند و به جنگ با جبر روند. در برابر هر تحمیل بایستند و به تقیان هم قسم شوند تا تغییر فرو ننشیند و جهان را آن سازند که رویایشان پرورانده است. تعلیم رحیم ادامه داشت. هر روز به کلاس درس می رفت. هر بار برای کودکان از ارزش تازه ای سخم می گفت. آنان را به گرانمایگی جان فرامی خاند و آنان می‌آموخت که برای حفظ آنچه ارزش خانده شده است باید از ارزش دیگران پاس داشت کرد. به آنان خواند که جنگ برای نابودی است. از میان جنگ چیزی ساخته نخواهد شد و برای ساختن باید که تلاش کرد. باید به خیشتن اعتماد کرد و به راه آنچه هدف خانده شده ایستاد، هر روز برای کودکان مپس تازهی را می گشود و تغییر آنان را میدید. دید. آنانی که به فردا پدران و مادران خیش را تغییر میدادند بر آنان اثر میگذاشتند و در دور دستری کودکان خود را می آراستند. تغییر میکرد کرد و آنچه از دیرباز ریشه در فساد و نابودی داشت از ریشه برکنده میشد شد و تازه ساخته جای آن را میگرفت. روزی با آنان پیرامون جان سخن گفت. پیرامون این ارزش والا که یکان ارزش زیستن هر جانداری است. روزی به آنان از آزادی سخن گفت که یکان منجی ساختن جهان بهتر جانداران است. روزی آنان را به ارزش برابری فراخاند و هر بار با گفتنش تغییر را در کودکان دید. گید که چگونه تفسیر را از خیشتن دور کردند. در جهان برتری و برتری جویان، که هر کسی در این وادی رقابت به دنبال برتری جستن از دیگران است به دنبال برابری می گردند. برابری را ارزش می و برای آن از خیشتن دلیل و استدلال میتراشند دید که آنان از آن وادی گذشتگان دور می و باری دید که چگونه برای برابری دیگر هم کلاسان به تکاپو افتادند اگر حقوقی از آنان کاسته شده است کسی به هواخواهی از رو برآمده. و دیگرانی به پشتبانی او به میدان آمده اند. رحیم همه این تغییرات را می دید. حتی سختترین کودکان به ارزش جمعی تازه سربراورده به میانشان واکنش نشان دادند و به تغییر پاسخ گفتند و رحیم به دیده هایش بیشتر از پیش دانه که راه این طریقت تغییر به تعلیم خواهد بود و این گونه ازمش از پیش بیشتر شد تا دریچهای برای تعلیم جانان جهان فراهم آورد کتاب بنویسد، شروع به نگاشتن کند، آنچه آموخته است به دیگران منتقل کند و در برابر آن ارزشهای های پوسیده گذشتگان بیستد. به صدای خرد خود در برابر فریادهای آنان ایستادگی کند که روزی این نجواها در برابر آن فریادهای ایستادگی خواهد کرد و نجوای یک تن به هزار و هزار به میلیونها بدل خواهد شد و به آخرش همه را در بر خواهد گرفت. که به ارزش تازه باور بیاورند و طریقت رهایی را درام ببینند. هر کنش پیرامون رحیم از دیدن جانی آزاد در آسمان تا خواندن نامی بر اجنبان او را بیدارتر کرد و حمت او را برای نگاشتن بالاتر برد. به این رقابت ساخته به دست انسانها در این دنیای برتریجویی و افزل شدن که در جا جای آن ندایش به گوش می رسید همه در حال روبودن منابع از یکدیگرند. همه در حال جستن طریقتی برای پیشرفت خیش برآمده‌اند. همه آمده تا دیگران را های ترقی خیش سازند. رحیم آمد و بر رقابت با خیشتن ایستاد. عیسا تا در بیان ارزش‌هایش از خیشتن پیشی گیرد هر بار برای بیشتر دانستن تلاش کند. هر بار باورهایش را پالایش دهد و به پیش برد. در جای نماند و از خیشتن پیشی گیرد و هر بار مسموم گذشتگان را به ارزشی مادام برای دیگران بدل سازد این گونه بود که از هیچ دنیایی ساخت از نیستی و عدم ارزش برون آورد و نوشتن کتاب را به پیش برد گاه به دیدن دریدنها گاه به فریاد گذشتگان و ندای دنبال در پیشترها پرگه شد و پس از چندی خواند که در آین ما ناامیدی کافر شدن است باید که امید را فراخواند، باید که از آن مدد گرفت باید که برای پیش رفتن در جای نماند و اگر پاها را بریدند از دست مدد گرفت اگر دروازه ها را بستند باید که پنجره ها را طریقت دانست و باید که از نو ساخت باید از هر زشتی در برابر گذشت و در خیشتن نماند ناامیدی به هزاری امید در دل مانده به هزاری رویا بر برزن پرورانده به هزاری تصویر در آینده ها تغییر کرد. روزی را ترسیم کرد که در آن هیچ از زشتی به جای نماند. روزی را تصویر کرد که آزادی دیگران معنای آزادی خیشتن باشد. روزی را تصویر کرد که حرمت بر حریم دیگران والاترین ارزش هاست. روزی را که برابری بزرگترین فضل و برتری است روزی که همه دنیا برای برابری دیگران از جان و دنیای گذشتند روزی که همه دنیای خیشتن را ساختند و با بال و پردادن به دین رویا بود که باز بر پای ایستاد و ذره ای نماند روستای صحرا سرزمین تبعید شدگان ندای دریدن داد آمدند تا گوسفندان را بدرند و قربانی راه وطن کنند گاه ندای وطن خونخاری همگان را فراخواند، گاه فریادهای قدرتی عظیم آنان را به خونپرستی و خونخاری فراخواند، لیک رهین برابر هر چه خون بود ایستاد به ندای کودکان تعلیم دیده که راه راسی را برگزیده بودند فریادها صحرا را در خیش فراخواند. بزرگان روستا آمده تا خون بریزند آمده تا در راه مانا بودن سرزمین جاویدان با خون زمین را رنگین کنند تیخا بر دست و قربانیان به پیش در خاک ماندن تا کاخها را فرا سازند در برابر کاخ تلاین قدرت هزاری دست و پابسته بر زمین بودند تا به نژاد کهترشان فضل نژاد آنان را عطا کنند کولوران، گرد سواران و گردگیران همه به پیش آمدند تا به خون خیش بر دوشهای زخمین و خونینشان بکشند آنان که ادعای تاج و تخت اند. آوردن در پیش پیشمارانی را که به غضب خواندند به یغما بردند، به قارت اسیر کردند آنان که برده نام گرفتند آنان که گاه کنیز شدند و گاه برده خوانده شدند همه را فرا خواندند که روز ساختن کاخا بود از خاک کاخ برآمد از کاخ قدرت ریشه گرفت و قدرت همه را به استثمار خیش فرا خواند نو به جماعتی که برایش سینه زدند برایش به خاک نشستند و والاییش را ارج نهادند مرتبت داد آنان را والایان روزگار نام نهاد بر آنان تاجی از زر بخشید آنان را تا مرتبت ولایتی وزارت و وکالت بالا برد بر آنان خواند شمایان جانشینان من بر این خاک عظیم خوانده شدی از این مرتبت والا از این خون و نجات از این خاک و فساد از این دین و لغه، از هر آنچه بر شما ارزانی داده ام بخورید و بنوشید لذت برید برگردها پانهید و والا تر شوید که اصل والا بودن و والا ماندن بزرگترین ارزش هاست گاه برای افزل بودن یک را بدارید گاه برای احخاق حقتان، گاه برای پاستاش از حریمتان، گاه برای کوچکش مردن غیرتتان دیگران را بدرید، بدوید، خون بریزید و از این دیوانگی لذت برید. قربانیان به پیش می رفتند، از همه درمیانشان بود. یکی گاو بود و دیگری مار، یکی گوسفند بود و دیگری مار ملک، دیگری پس سر از پیشینیان همه پس بودند، گاه زنی از کهتران شمرده شد، گاه رانده شده ای زشتی خطاب شد، گاه نژاد کهتری را به پیش آوردند، گاه چشم تنگان کوردل را فرا خاندند. گاه مفت خارگان را و گاه از خیشتنشان، از خیانتکارانشان، از مخالفانشان، از ایستاندگان در برابر نظم موجود، از آنانی که دیروز همراهشان بودند و امروز در برابرشان ایستادند هر کس هر گفت اگر دورتر از ارزششان بود اگر فراتر از باورشان خواند اگر ذره ایستادگی کرد اگر تقیان به دلش زنده ماند محکوم به قربانی شدن شد آری آن کس که یاغی بود توغیان داشت که تغییر خاص که متفاوت بود هرکر هر احساسی فراتر از تسلیم و سرس پردن در خیش خواند محکوم به معدوم شدن بود این ارزش والای برتری جستن سراخرش همه را تسلیم میخواهد. همه را در خاک فرا میخواند هیچ تفاوت نیست چه کس در حرم قدرت جا خوش کرده است از چه طریقتی سخن رانده و چه راه کارهایی را نشان داده است مقصد و مقصود یک تاست همه در برابر قدرت کرنش کرده اند. همه در برابر این زشتی سر تعظیم فرو آورده اند و راه های متفاوتشان به تسلیم همگان را کششانده است تقیان را بر نمی تابند. ای سادگی را نکوهش خواهند کرد هرچه به مقاومت خانده شده است را از زیر تی خواهند گذراند و حال آمده تا در جشن خونشان زمین را خونین کنند کاخ را به خون رنگین کنند و از خاک به خون درآمده آمده کاخ رنگین و طلایی را محفوظ بدارند همه دست و پا بسته در برابر کاخ قدرت به خاک درآمده ایستادند که رهین فریاد زد ندوید و ندرید کودکان به خواندنش به رخص در آمدند و در برابر قربانیان رخصیدند. دست به دستان را نوازش کردند. کسی فریاد زده چه میکنید دیوانگان آنان را شناخته اید می دانید آنان از کیانند؟ فریاد و همه همه در میان جماعت بالا گرفت که یکی فریاد زد. آنان چشم تنگان کوردل هستند. آنان حیوانات بی هستند. آنان دونمایگان بیخرت هستند آنان سیاهان برده هستند آنان درد و بلای در کوچه هستند آنان پستر و ما افضل آنانی کودکان به رخص ادامه دادند، یکی دست بند ها را آرام به رخص گشود، هزاری به پیش آمدند و دستبند بر دست کودک زدند، او را نجس شمردند، او را از خیانتکاران خواندند مرتبتش به زیر افکنده شد، زیرا که افزل بودن خود را خار شمرده است. به دستان بسته به جمع قربانیان درآمد و باز کودکان، رحیم و برخی از روستایان به دور حلقه های برزمین دربندان به رخص در آمدند. با قربانیان رخصیدند پدر و مادر کودک هم به میان آمده بود برای کودکش رخصید به چشم کودکش هزاری کودک دید کودکان از جنس گوناگون، از جنس چشم تنگان کودل، از جنس حیوانات بیارزش از جنس سیاهان برده و از جنس چه جان در جهان بود پدر و مادر کودک در چشم کودکش دید هزاری را که به جان برابرند که جان والاترین ارزشها ها به نزد آنان است پدر و مادر و دیگر روستایان سایان بر آمده در میدان قرمان و رخص دید که همگان گان چگونند و چگونه جانند همه را دیدند و با چشمان گریان به طول هزاران سال تبعیز رواداشتن زشتی به طول هزاران سال زندار در جنون عشق ریختند و رخصیدند. دستبندها را گشودند باز کرده قربانیان به میدان ایستادند و رقصیدند همه اشک ریختند خون از چشمانشان جاری شد کاخ سر به دل سهرا فریاد زد بدوید و بدرید. جمعیت بیشمار از روسایان، از جوانان تونتخوی، از هزار و هزاری که در این افزل بودن، خیشتن را، محق و حق را در اختیار خیش دیدند، به میدان دویدند. همه میدویدند، میدویدند تا بدرند. شاید هم بسیار از جانان دریده شد، اما به سرآخرش آنان که دویده بودند به رخص تر آمدند. از رخص بیشماران که دیگر نه چشم تنگ کردل، نه حیوان بی ارزش نه زن نجس خانده شده و نه هزاری القاب دیگر که همه جان بودند به رقص در آمدند همه در برابر کاخ قدرت رقصیدند کاخ دیوانه شده بود خاک فریاد میکشید. قدرتمندان و قدرت پرستان فریاد زنان جامه دریدند بر سر و روی خود کوفتند کاخ چلایین بر جای مانده بود نیرنگ کرد فری داد و هربه بست، هیله کرد دروغ گفت و باز ندادا، هر کدام از قدرتمندان و والانشینان چیزی گفت تا دیگران را بفریبد و باز داستان قربان ادامه داشت گاه سر بریدند گاه خون به زمین جاری شد و کاخ فریاد زد خون بیشتر برای فروکش آنچه خشم من است آنچه کینه من خوانده شده است برای فروکش آنچه من خاندند خون خواهم خواست بدوید و بدرید کودکان اشک ریختند هر که در میدان قربان بود اشک ریخت حتی از میان جوانان خوی هم جماعتی اشک ریخت و اشک چشمانشان به خون بدل شد و خون برابر کاخ را فرا گرفت آنقدر بالا رفت و بیشتر شد که کاخ را به خون در کیش غرق کرد انگاه صدای خاک و کاخ و هرچه در این وادی مستانه میسرود به آسمان رفت و باز ندای گذشتگان را سر داد بدوید و بدرید اما صدایی به بیرون درز نکرد و هرچه گفتند در میان خون برآمده در برابرشان ساکت ماند و مسکوت ماند کتاب رحیم تمام شد آنچه از باورهایش بود، آن چه میخواست ارزش تازه به خاند را نگاش و به میادین شهر فرستاد. چندی از نشر تعلیمش نگذشته بود که به میدان شهرها، به میدان وطن، وطن دوستان و وطن خواهان، به هر نقطه از دیار مادری، سرزمین پدری، خاک اجدادی، کاخ صاحبان و مالکان به فریاد در آمد. رجیم رانده شده به شما میخواند. وطن را باید ساخت فریادانان که می‌فروختند به آسمان بلند شد رانده شده ای آمده تا ما را به راه تازه ای فرا بخاند فریادها به آسمان میرفت و تعلیم رهین به پیش بود مرزها ها را در مینوردید به هر گوشه جهان سرک می کشید و هر کس برابرش بود را به آموزهای از قلب جانان جهان فرا می خاند. به آنچه خیشتنشان به طول عمر دیدند، به آنچه از آن ادراک کردند، به آنچه ندای بلند آسمان و زمین است به گوششان خانده شده لیک این نجوای کوتاه و بیرمق جان جهان در برابر فریادهای سرکش و عربده های دیوانوار دیوانگان گنگ و نامعلوم بود. آنچه آنان به طول عمر با مهر بر جای مانده از غضب دیوانگی خانده اند را برایشان خوانده است. ندوید و ندارید. جنگ نکنید که جنگیدن است. برای ساختن باید که مدارا کرد. باید که ایساد. باید که تلاش کرد. باید که در راه ماند. به هدف والای در برابر چشم بدوزید و به امید آنچه برایش آرزو کرده اید را به دست آورید. در برابر ظالمان سرخم نکنید که آنان آمده اند بر گرده هایتان سوار شوند و آنچه میخواهند را به پیش برند. جان والاترین ارزش‌هاست، آن را دریابید که یگان گوهر وجود همه جانداران است. برای پاس داشتن آزادی باید که آزادی دیگران را محترم شمارد. جملات یک به یک تکرار میشد. آنچه در طول تمام روزگاران پرندگان آسمان چهچه زدند. حیوانات به بیابان فریاد کشیدند. گرگان جنگل زوزه کردند. چشم تنگان کودل به اماق وجودشان نجوا کردند. بردگان و غلامان و هرچه جان در جهان بود هم همه اشگرد. درخت و کوه و جنگل و دریا به باد خروشان خواند و همه در جهان لقلقه اش را حال به زبان شده شدهی ملعون به زبان یاغی و سرکش به زبان تخلانگری که در برابر هر که عرضش پوسیده است ایستاده شنیده اید و با او تکرار کنید برخی به خاندن غزلهایش غزلی سرودند فریادهایش را به اماق جان به طول هزاران سال به عربده دیگران و به ترس از تغییر فرو خورده بودند و حال به ندای او غزل سرودند به ندای او پاسخ گفتند که ندا از او نبود از جان جهان بود از آزادی در دلها بود از آنچه همه آن را شنیده بودند بود اما باید که یکی آن را فریاد میکرد باید یکی دیگران را ندا میداد تا به آهنگ جان جهان گوش فرادهند تا مرتبت زندگی را پاس بدارند تا همان گونه که همه جانان عاشق به زیستنند زیستن را پاس بدارند اما همه برای پاس داشتن زیستن به میان نیامده بودند همه به تغییر درود نفرستادند همه این گونه نبودند که برای ندای درونشان حرمتی قائل شوند و از جان جهان آن بشنوند که به طول تمام بودنها فریاد زده است بیشمارانی دل در گروه قدرت داشتند، بیشمارانی آلوده به نجاست مالک بودن بودند، بیشمارانی به ترس دست و پابسته در تعصب وامانده بودند، هزارانی دیوانوار دل در گروه دیوانگی داشتند. ایوای که بیشمارانی هیچ نمیخواهند جز قصب قدرت، جز کنیزگی و غلامبارگی در برابر شهوت جز پاسخ به ندای دیوانگی با اشرت، آنان مالکان جهانند آنان صاحبان قدرتند آنان بر گرده های کولوران نشست دیگران را به پیش فرا می خانند. گاه به فدیه آنان را به هربه همرنگ کردند گاه به تیز تیغ قدرت جانان دریده را به رقص درآورده تا در ترس چنیزکی آنان کنند و گاه به شهوت و ثروت دیگران را بر کردند و بر گرده ها نشستند صاحبان، مالکان، قدرتمندان، خدایان، بازی خوردگان، مسخ شدگان، دیوانگان، زرپرستان، زورخویان حال باز آسمان و زمین، فاسده در افکارتان، کاخ ساخت بر انوارتان، ندای پیشترها را خوانده است بدوید و بدرید باز در برابرتان کسی است که خوی وحشی صفتیتان را سیراب خواهد کرد باز به ندای دویدن و دریدن پاسخ گویید که این ندا به گوشتان به طول تمام محص شدن در قدرت و ثروت و شهفت بیدار شد بالو پر گرفت و جز این ندا هیچ نشنیدید کاخهای دور و قربنگه دیوانگیتان در تلاتم و نابودی است، باز ندا می شنوید هر به نیست، زر و ثروت و شهفت به دادتان نخواهد رسید این فریاد به هیچ خاموش نخواهد شد زورتان تنها ایده برای نابودی است تنها راه برای خاموشی تنها فکر برای تنکوشیست. بیایید سینه آزادگان جای خنجر شماست بیایید و بدرید باز فرا تا بدرید تیخها را به دست گیرید، خنجرها را تیز کنید، تفنگها را پرفشنگ کنید، دست بر ها بچکانید، کنید بوم به تنبه بندید، به میدان بیایید تا صدایی شنیده نشود اما صدا فرا است، ندا به میان آمده است فکر به پیش است و اندیشه در خیشتن بارور و باز همزایش خواهد کرد باز هم به پیش خواهد رفت آنقدر بدرید و بدوید که آخرش ندای همان فریاد پیشترها گوشتان را پر کند ندای یکی از آنان که دریده اید از پیشتری دوباره به گوشتان خواهد رسید دوباره خواهید چنید اما این بار نه از دور دستان که یکی از قاتلان دستاموز خودتان آن را تکرار کرده است وطن را باید از نو ساخت به سراسر گیتی نه شد و ندای رحیم زمین و آسمان را فرا گرفت. فرا گرفت تا به آنان بگوید دوباره جهان را ببینند. برای ساختن آنچه چه وطن خانده اید بکوشید وطن را برای آرمان های خود بسازید. های بارور ایمانهای نوساخته به پیش آمده تا دیار خیشتن را بسازند به هم باوران و باورمندان به جان خانه ای را تدارک ببینند که همه در آن جان و والایند همه آزاد نگهبان آزادی دیگران هند. همه برای برابری آن که تفصیل خیشه است را به خاک خواهند سپرد تا هرچه زشیست را به خود ببلد و از یاد ببرد که روزی دیوانگانی خاک را پرستیدند رحیم میدانست: میدانست، که فریادهایش آن ندای به سالیان دراز محتاجه است که جهان را دربرگیرد. گیرد که هزاری به میلیون بدل شوند و سراخرش جهان یک بار که برای جان به میدان آید آری همه را از پیشتری میدانه است میدانه که این آرمان والا آغازگر راه طولانی برای بیداری همگان است برای درگیر شدن در تغییر بیشماران است که طول و درازایش را باید که به دورتری از خیشتن و عمر خیش نسبت داد اما خشت اولش را بر زمین نهاد تا بی شماران جان جهان برایند و این بنای تازه از آزادی و برابری و جان انگاشتن را به پیش برند. میدانست و می‌دید که هنوز خاک را پرسیدند، هنوز نجاد را گرامی داشتند. هنوز بر تربتهای خاکون زمین سجده بردند هنوز بر آلت قدرت سرخم کردند هنوز در شهفت منزل دارند و این ندا آنان را به تغییر فرا خواهد خاند آنان را به باز آفریده شدن فرا خواهد خواند اما حال دید که چگونه به روز استقلال به روز والاش خاک اجدادی به روز والادانستن نجاد پاک به سرزمین مادری بیشمارانی به بیرون خانه ها آمدند تا این خاک اجدادی این کاخ ریشه دوانده در فساد را بپرستند بار دیگر جولانگاه بیشمارانی از روسایان شد روسایانی که می‌دانستند. رهین رجیم مل اون کیست می دانستند نگاشتش چه طوفانی به راه انداخته است میدانستند دانستند که دولت پنهانی برای نیست و نابودیش فدیه ها در نظر گرفته است میدانستند دانستند که کمی دیرتر او را به جوخه های دار خواهند فرستاد لیگ کودکان را هم دیدند آنان که دیگر به مثال دیر باز خیش نبودند آنان که دیگر جان دیگران را آزار نگفتند آنان که آزار دادن را بزرگترین زشتی شمردند آنان را دیدند که چگونه برای برابری دیگران از هرچه چه و برتر شمردنه از دور ماندند همه را دیدند و هیچ تن نتوانست خوبی را نفت کند زیرا که خوبی به دل همگان یکسان و برابر است نبریدن سر حیوانی برای سیر کردن دوری خونخارگی است همه صدای ناله های او را شنیدند همه ترس را به چشم های حیوان دربند دیدند و همه آنگاه که گوشت در خون او را به دندان میکشند به پسی خیش درود میفرستند و میخوانند که زشترین و خونخارترین جان جهان بر زمینند که اغرا را به اسارت غریزه برده حال خون میخورند و بر این زشتی خیش میبالند آری همه ی روز آن چه رحیم کرده بود را به چشم دیدند. آنچه چه او میخاند را شنیدند و آنان که دورتر از آن چه قدرت و قدرت پرستی والانشینان بود به مدد از آن مهرمانده بر جانشان خواندند که او آن چه خانده است را به مهر دریافته و خوبی به نزد خانده های اوست. لیک بودند جماعتی از توندخویان که خیشتن را به تعصب وا اند. که ترس به دنیایشان مصولی است که فرمانده دنیایشان همان دیوانگی پیشترهاست هاست بودند آنانی که به هر ها پاسخ بگویند که خشونت را بستایند که این دویدن و دریدن را آموزه و آوازه دنیایشان کنند بودند آنانی که به شهفت پاسخ گویند گاه به پیشکش قدرت گرفتن در دوردست است گاه به در خود گرفتن ثروت در کویبه بس و گاه به آوازهای شهفت در خیشمه است شوند بودند آنان بودند که در میان پرستیدن خاک، در میان خاک بر سر ریختن بیشمارانی، در میان آن چه سرود خوانده شد، در میان فریادهای تهجر و تنفر، در میان شرخانی برای برتری جستن خاکها و نجات‌ها، برای جشن و آین اشاعی نفرت بر دیگران بودند آنانی که دست به خنجر برند، بودند آنانی که ماشه ها را بچه کنند بودند آنانی که به فریاد، به دوید و بدرید درید لبکش بگویند بودند آنانی که خیشتن را به آتش کشند تا دیگرانی که فریاد زدند را خاکستر کنند آنان بودند و خیشتن را به هرچه در برابرشان از تعصب و ترس تا هربه و فریب تا آرزو و رویا تا قدرت و شهفت فروختند و به پیش رفتند برای جنازه تویانگران چقدر در نظر دیده اید؟ به دنیایی که همه چیز را کالا خانده اید آنان را به چند معامله کرده اید؟ خون آنان را به چند فروخته اید؟ به صداهای خاموشیشان کشته اید و بند نگاه داشته اید بر بندهای پولادین آنان خودکشی را به جانشان خورانده اید. گاه تیغ بر دستانشان، گاه شکنجه بر کردارشان و گاه دیوانگی بر رفتارشان. به چند خون آنان را معامله کرده اید. تعصب را فروختید و خشونت را خریده اید. معامله در تفریق میان مهر و زیستن است. آری بکشید. بدارید به ترس فرا بخوانید به تعصب در بند بکشید و به آنچه ساخته و در قدرت دارید هربه کنید و سرخرش فریادی که به خشونت فروخوانده اید را دوباره خواهید شنید. دست و پا نزنید. این تغییر و ساختن در راه است هر چه کنید به پیش می رود و همه جهان را دربر خواهد گرفت. چه کشید؟ چه در بند نگاه داشتید چه به هر به فرونشان دید و چه هرچه به عقل های در بند تان بود به کار بسید باز هم ندایی جهان را فرا خواهد گرفت وطن را باید ساخت فراتر از آن دنیا را باید دگرگون کرد ها را باید که دوباره جان داد باید جان را دوباره آفرید باید که جهان را دگرگون کرد و هر ارزش را از نو آفرید و ساخت جهان را باید ساخت روز استقلال وطن پیشینیان بود همه در گوشه گوشه کشور آمده بودند تا این روز تاریخی را پاس بدارند آمده بودن تا بر این ارزش دیربازان سهن هند و آن را بزرگ بپندارند، اما نداهایی از گوشه گوشه شنیده می شد این بار نه به مثال دیربازان که همه خاموش بودن نه چون آن پیشتری که همه هر چه خانده شده بود را می خاندند که این بار برخی صدای شنیده را به نگاه شکالود خود پاسخ گفت. پرسش کرد بر جای نماند و حرکتی را به پیش برد باید وطن را از نو ساخت یکی آنگونه گفت آنجا که در میان شعر تملقامیز وطن همه جان و ایمان و باور خانده شد آنجا که وطن ساخته از پیشینیان چرامت داده شد کسی در میانشان بود که بخواند وطن را باید دوباره ساخت باید آن را تغییر داد و باید که در جا نماند کسی از گوشهی سخن گفت و در میان آوازها هم یکی فریاد دیگری سرداد آنجا که همه فریاد وطن سردادند صدای تنی شنیده شد که فریاد جان گفت و همه او را نظاره کردند همه صدای او را شنیدند و این یک صدا در میان هجوم صداهای همانند بیشتر به گوش رسید اما حال دیگران دانستند که تغییر راهی در میان بودن آنان است. حال با هم خواندند و هر بار از یکدیگر پرسیدند. روز پرستش خاک بود. باید که به خاک می‌ماندند، باید که سجود می‌کردند، باید در برابر عظمت و بزرگی این خاک اجدادی سر تعظیم فرود می‌آوردند. و در گوشه گوشه وطن اجدادی در خاک بسیاری نشستند در میان صحرای تبعیدی ها هم برخی بر خاک نشستند اما در میان این صحرا بودند آنان که در خاک ننشسته ای در دل کار بودند آنان به این آین حتی پای هم نگذاشتند آخر دانستند برای ساختن باید که تلاش کرد. برای تغییر باید که در کار بود باید که ایستادگی کرد و در خود نماند پس در خاک نماندند و از تمام جلدهای ساخته برایشان بیرون آمدند اما باز هم بود در دل صحرا آنانی که خاک را به آسمان می بردند تا این علوهیت و قداست را به آسمان پیشکش کنند. همه در خاک ماندگان در برابر عظمت این خاک اجدادی گاه عشق ریختند گاه خیشتن را کوکک و خار شمردند و گاه هر که در پیش بود را به گرده سوار کردند که او دایدار وطن بود او مالک بر این خاک بود و بر کول وران ایستاد به قله ها رسید در کاخی از این، گون هزاری برای همه از عباهت و بزرگی خواند تفاوتی بر کیسی این عباهت به میان نبود. تنها خواندن این بزرگی احساس کوچکی را به آنان داد که بدانند باید در برابر بزرگان به خاک افتند. باید کولهای زخمی خیش را برابر آنان به خاک بنشانند تا آنان در آن بزرگی فرمان روایی کنند. صحبت از خاک، بزرگی و بزرگ انگاشتن بود که رحیم در دل صحرا با برخی از همراهان کار می کرد. کار می کرد از دل صحرای در بی آبی و بی زیستن مانده جرعه آب و زره قوت پدید میآورد. تا دریدن که به زیستن آبادی با هم باشند. برخی در روستا به دور از آنچه چه بزرگ داشت وطن و وطن پرستی بود به کار مشغول بودند و آنانی که این کرده آنان را دیدند خونشان به جوش آمد رحیم را تصویر کردند آن هربه ها، آن فریب ها، آن نداها، آن فدیها همه در برابر دیدگانشان بود از آن فراتر رفتند به یاد خیانتش افتادند که چگونه نداداد ندا ندوید و ندرید چگونه اسیران ایران وطن که باید در برابر آنان به خاک می باید غلام و برده و کنیز میشدند، باید خدمت آنان می کردند را برابر دانست و آزادیشان را پاس داشت که همه آزاد باشند. به یاد زشتی ها و پلیده های او افتادند که چگونه با خواندنش کودکان را به راه دوری از وطن خوانده است. چگونه جوانان شهر را دور از آرمان های گذشتگان کرده است. باز دیدند، دیدند که چگونه به کتاب کفرالود خود همه را به تقیان فراخانده است. جماعتی بودند از روستایان، از شهریان، از پای تخت نشینان، از همباوران و قدرتمندان. از آرزومندان به قدرت و صاحب شدن، از آنان که می‌دانستند آن جنازه را چند معامله کردن. از آنان که برای ریختن آن خون و برای داشتن آن ثروت برنامه ها داشتند و رهینی که باز در حال کندن و خاک ریختن بود خاک بر سر برخی ریخته میشد، چه که عشق می ریختند که گریه می کردند. از ارزش های رفته بر بادشان داد سخن می دادند. از آنانی که آمده تا آن از پیشینیان دارند را بر خاک ریزند و آن خاک را به صورت خود ریختند کاخ در برابر که تلاگون بود با فرماندهی، حاکمی، پادشاهی، خدایی فرمان داد محکومین به پیش رفتند و در حالی که خنجرها را تیز می کردند را به فشنگ می آراستند بومبها را به کمر می بستند، مدام قزل از حب به وطن می خاندند. یا قدرت معلوم یا مالک مظلوم یا صاحب درخون وطن هم جان و هم ایمان و هم راه وطن معنای بودن در دل ما وطن قدرت قصاوت خون هر شاه وطن حب است این احباب در راه رحیم خاک در برابر را میکند و بالا می آورد که اولین خنجرها به جانش فرو رفت از پشت خنجری جانش را شکافت و داخل شد خونش زمین را سرخ کرد آنچه همه هستی و بودن همه جانان بود را پیشکش جانان خواند جان یکدیگر را ندارید فشنگی از رو به دستش رسید و جانش را شکافت آمده بود تا سینه بکشاید آمده بود تا جانش را به خون درآمیزد آمیزد که رحیم خواند نجنگید جنگیدن نابودی است به پاس داشت دیگران میتوان حریم خیش را پاس داشت. آنان که در کنارش بودند خواستند که دست به بیل ها برند و به جنگ درایند. آنان که راهش را پاس می داشتند، آنان که برای تغییر آمده تا در روز جشت خاک و کاخ بکارند و کار کنند دست به سلاح بردند تا بدرند. که این فریاد کنند گفت ندرید، نجنگید. بسازید، کار کنید که به تلاشمان جهان را خواهیم ساخت جوانان توندخوی، متعصبان رزمجوی، و تمپرستان دیو همه و همه دورش کردند خنجرها بالا رفت، سینه را شکافت، تیغ بر جانش درآمد و او را به خون غرق کرد زدند و پاره کردند، تیغها را بردند و جاودانه کردند دورتر از آنان یکی خاند. رحیم ماناست. او جاودانه است. او آمده بود تا ما را فرا بخواند او آمده بود تا به ما راه زیستن بیاموزد. او یک تای جهانیان است. رحیم جانی نداشت تا فریاد بزند. خون همه وجودش را در نوردیده بود و جان می داد که آرام زیر لب خواند برتری را برانی. یکی از کودکان فریاد زد رحیم خاند بر من نداداد که بخانید این صدای جان جهان است. این صدای همه جانداران جهان است. این ندا را همه با هم سرداده اند. بخانید که هیچ تن چنین نخواند و همه با هم خاندند. همه آرام به او نگریستند که در خون قرق ماند و میخاند. بسازید آنچه چه است است را بسازید بی شمارانی در حال ساختن بودند و بیشمارانی در برابرشان در خاک نشسته خاک قدسی را می ستاییدند. کاخ بزرگی به نماد از خاک اجدادی در برابرشان بود و گاه و بیگاه در برابر آن کرنش می کردند. خونی را ریخته آن خون را به قربانگه کاخ تقدیم کردند و با خونش به در و دیوارهای کاخ کشیدند تا بداند چه ارزش والایی دارد آنان که کار می در پی ساختن دنیای استازهی بر آمده بودند و آنان که سجده می کردند آمده بودند تا دنیای پیشترها را پاس بدارند و با آن زنده باشند کاخ تلاگون در برابر به نداهای بیشمار گوش فراداد بیشمارانی که غزل خواندند که شعر سرودند که خاک بر سر ریختند که آواز خاندند خون ریخته را در برابر کاخ بزرگ بر زمین کوفتند و آنگاه بود که باد به آسمان غرید طوفان به پا شد آسمان را در خیش فرا و همگان از نعره آسمان و باد به لرزه آمدند کاخ خاند نه آسمان و باد آمده تا مرا به ستایند آمده تا این خاک قدسی را پاس بدارند طوفان به پیش آمد و با آمدنش خاک را به آسمان برد همگان در برابر بزرگی کاخ و خاکشان به سجده افتادند و این بزرگی را ستاییدند مردمان فریاد می زدند. بزرگی جاودان از آن این خاک اجدادی است باد و آسمان آمده تا این خاک قدسی را به آسمان برد آمده تا به همگان بگوید که والاترین ارزش به نزد این خاک نهفته است بیشماران دوباره بر خاک میافتادند و توفان به پیش می آمد. آنان که کار میکردند فاصله گرفتند و به دورترین گریستند شک به دلشان راهدار شد گفتند این باد به خدمت خاک اجدادی آمده است آیا آمده تا این خاک قدسی را به آسمان برد؟ ندای بیشماران در خاک مانده به تشکیک آنان افسود و باز همه و همه را نگریستند و از زیر نظر گذراندند باد پیش می آمد و به کاخ می رسید که شدت گرفت طوفانی تر از پیش شد دیوانوار به پیش آمد که پرستندگان از ترس به دورتری پناه بردند و مثال آنان که کار می کردند نظاره کردند خاک به آسمان می رفت و به کاخ می رسید کاخ با غرور فریاد میزد. این است آنچه بزرگی خاک اجدادی خواندم ببینید که چگونه خاک ما را به آسمان میبرند. جنازه قربانی هم در برابر کاخ به زمین بود و خاک و باد و طوفان به آسمان میرفت که باد جنازه را به خود گرفت و در بر گرفت و به آسمان برد همگان به آن نگریستند و در چشم بر هم زدنی غیب شدن آن را دیدند. تا خواستند چیزی بگویند و یا کاخ بتواند چیزی بگوید باد پیش رفت و کاخ را در گرفت آمد تا در برابر کاخی که ریشه از هرچه در پیشترها بود را در گیرد آمده بود تا در برابر آنچه از ریشه های پیشتر می خانند. آنچه در فساد، در آب و گاه، در خاک، در ترس و تعصب، در دیوانگی و خرافات، در افثانه ها و در جنون ریشه داشت را به مساف بنشاند. باد آمده و کاخ را در بر گرفت. همگان به باد و کاخ و خاک چشم دوختند. همگان دیدند که چگونه باد، کاخ را در بر گرفت و در چشم برهم زدنی آنکه ریشه از او بود را با خود از زمین برکند. ریشه بر آ، ریشه در فساد و ریشه در خاک هرچه بود را با خود برد و از زمین برکند جنازه قربانیان را هم برکند همه چیز را با خود برد و در دور دستی هیچ از هیچ باقی نگذاشت کاخی به میان نبود، خاکی نبود، جنازهی نبود اما باز هم اندیشه بود باز هم خرد بود و شاید این باد و توفان توانست آنکه دیوانگی و جنون، آنکه بقا و غریزه، آنچه پسیه در پیش و سنته هست را از خود برکند و دوباره خیش را بسازد باد طوفان کرد، ریشه ها را برکند و آخرش اندیشه را باز فرستاد دیگر هیچ نبود، هیچ نامی از آنان که فریاد زدن نبود و نباید که بود اما فریادشان ندایشان تغییرشان آرمار و هر آنچه اندیشه کردند مانا و جاودان بود کوه ها زمین و دریا ندای رحیم را خواندند از پیشترها درها خواندند همه خوبی را دیدند و کافی است به ندای آنان گوش فرادهند و از آن بیاموزند تا صدای رجیم درون خیش را بشنوند صدای یاغیان، گران، صدای اعتراض و زندگی را بشنوند، باید که صدای را شنید و آنگاه ندای رهیم در گوش ها تنیده خواهد شد. که این نه صدای من، این صدای همه جانداران است. صدای همه و طریقت همه آنان است که جانند و جان والاترین ارزش دنیای آنان است. صدای آنانی است که آمده تا در برابر قدرت بایستند آمده تا رویای خیش را خیشتن بسازند این صدا در سینه ها فریاد شده است و حال دنیایی خواهد ساخت به بزرگی تمام اندیشه ها به آزادی تمام باورها به برابری همه جانها به احترام و آزار نرساندن به که جان است این جهان آمده تا آرمان و رویا را بسازد آمده تا آرزو کند آمده تا آرزوها را به پیش برد و سرآخرش جهان آرمان است که همه وطن خیش را به دست خیش خواهند ساخت